به درستی که آنها در راه بودند او وارد ای شد زنی به نام مارتا او را میزبان شد این زن خواهری داشت مریم نام که در محضر حضرت می نشست و کلام او را می شنید مارتا برعکس با کارهای مختلف خود را مشغول می کرد به او نزدیک شد گفت ای حضرت ناراحت نمی شوی که خواهرم همه کارها را به من واگذاشت پس به او بگو که به من کمک کند برای جواب حضرت او را گفت مارتا مارتا تو خود را نگران می کنی و با کارهای زیاد ناراحت می شبی. کارهای کمی هستند که اهمیت دارند یک قسمت خوب آن را مریم انتخاب کرد که از او گرفته نمیشون انجیل لغ باب دهم ده آیات 38 تا چه2. اسری پاولو کویلو ترجمه حسین نعیمی با صدای احمد گنجی کاری از گروه فرهنگی باوانامه با همکاری نشر سالس پیش گفتار کیمی اگر کتابی بدون جلد را به دست گرفت که به همراه کاروان آورده بودند با این همه توانست نبیسنده را بشناسد پسکار وایلد آن را ورق زد و به افسانه نارسیس رسید کیمیاگر اگر قصه نارسیس را می‌شناخت جوان زیبایی به نام نارسیس هر روز در آبگیری صورت خود را میدید و به تماشای زیبایی خود مینشست تا تا که روزی محو زیبایی خود شد در آب افتاد و غرق شد در آبگیر گلی رویید به نام نرگس اسکار وایلد تعبیر تقذلی بر افسانه داشت و پایانش را چنین نوشته بود. بعد از مرگ نارسیس، پریان کوهستان به کنار آن آبگیر رسیدند که روزگاری از آبی شفاف و شیرین سرشار بود و اکنون جامی لبریز از عشقهای تلخ. فرشتگان پرسیدند چرا عشق میریزی؟ آبگیر گفت برای نارسیس گریه می کنم. گفتند تعجبی ندارد ما همه وقت در تمامی جنگل ها به دنبال آن آفریده زیبا روی بودیم. ولی فقط تو می توانستی هر روز در مقابل زیبایی او به سجد درایی. آبگیر پرسید نارسیس مگر زیبا هم بود؟ با تعجب جواب دادند چه کسی بهتر از تو خبر داشت بر ساحل تو خم میشد در آینه ات هر روز نقش رخ خود میدید آبگیر ای خاموش شد پس آنگاه گفت برای نارسیس گریه می کنم ولی هرگز زیبایی او را ندیدم برای نارسیس گریه می کنم چون هر بار که بر ساحل من خم می شد در آینه چشمانش زیبایی خود را می دیدم کیمی گفت این است یک افسانه زیبا قسمت اول اسمش سانتیاگو بود وقتی روز سرازیر شد و آسمان به تاریکی زد با گلش به کلیسای متروک و مخروبهی رسید که سقف آن سالها پیش فرو ریخته بود و درخت چنار بزرگ و پرشاخ و برگی از محل نمازخانه آن رو به آسمان داشت تصمیم گرفت شب را آنجا بخوابد گوسفندها ها را از درگاهی فروریخته وارد محبته کلیسا کرد منطقه را می شناخت و میدانست گرگی در کار نیست ولی یادش آمد یک بار یکی از میشهایش با استفاده از تاریکی فرار کرده بود و او تمام روز بعد را به جستجوی حیوان گم شده گذراده بود بهتر دید درگاه را با تخت پاره بپوشاند تا مانع فرار آنها در تاریکی شب شود. بالا پوشش را روی زمین پهن کرد و دراز کشید. کتابی را که تازه از خواندنش فارغ شده بود زیر سر گذاشت. فکر کرد بهتر است کتاب‌های پرهجمتری بخواند تا هم دیرتر تمام شوند و هم بالش‌های راحتتری. برای شب ها باشند وقتی بیدار شد آسمان هنوز تاریک بود نگاهش از پس خرابه ها در نیمه راه آسمان در آن دورها به ستاره ها می رسید ستاره هایی که سوسو می زدند به خود گفت کاش بیشتر می خوابیدم. چون خوابی دیده بود خوابی ناتمام همان خواب هفته پیش که یک بار دیگر در سای روشن ذهنش دویده بود و باز قبل از اینکه که به های پایانی برسد بیدار شده بود. از جایش بلند شد، جرعی شراب سرکشید، چوب دستیش را برداشت و گوسفندهای خواب آلودش را بیدار کرد. بسیاری از آنها را می دید که همزمان با او بیدار شدهاند و آماده حرکتند. در این دو سالی که با جللاش دشت ها را زیر پا می گذاشت، متوجه شده بود که نیروی اسرارآمیزی زندگی کوسفاند ها را به زندگیش پیوند داده است. نیرویی که زاده نیاز قریزی آنان بود، نیروی جستجوی آب و خوراک. نجوا به خود گفت آنها به من عادت کردند ساعات و حالات مرا خوب میشناسند. لحظهای بعد ادامه داد می تواند برعکس هم باشد منم که خود را به وقت و حال گلم عادت دادم چند میش هنوز روی زمین ولو بودند در حالی که آنها را با نامشان صدا می زد با چوب دستیش بلندشان کرد تا آمادهی حرکت باشند. تبهمی ناشناخته در زمیرش نشسته بود اینکه گوسفندها حرفهایش را میفهمند هر گاهی قسمتهایی از کتابی را که در دست داشت برایشان میخواند یا از تنهایی و شادی زندگی شبانی خود در صحرا با آنها حرف میزد زمانی هم از تازه ترین دیده ها و شنیدههایش در شهرها از محل و کوچه هایی که پشت سر گذاشته بود برایشان میگفت. ولی از روز قبل یاد آن دخترکی بود که در شهر زندگی میکرد و او باید چهار روز تمام راه درازی را میپیمود تا به آنجا برسد. بنابراین فکری به فکر او و حرفی به حرف او. نداشت دخترک فرزند بازرگانی بود که در شهر پارچه فروشی داشت سانتیاگو سال قبل به توصیه یکی از دوستانش فقط یک بار به آنجا رفته بود بازرگان عادت داشت پشم گوسفند در حضورش چیده شود تا فریبی در ترکیب و تحویل جنس روی ندهد و او گلش را به آنجا برده بود به بازرگان گفته بود مایلم مقداری پشم گوسفند بفروشم. دکان پر از مشتری بود و بازرگان از او خواسته بود تا غروب صبر کند. کتابی از خرجینش بیرون آورده بود و کنار پیاده رو مقابل دکان او نشسته بود که صدایی به نرمی باد به گوشش خورد. نمیدانستم که چوپانها هم سواد دارند. دختر جوانی بود با شمایل دخترهای منطقه اندولوس با موهایی به رنگ شب و چشمانی که انسان را به یاد چشمان سیاه همیشه مرطوب مغربیان میانداخت همان کسانی که از آفریقا آمده بودند و در گذشته دور سرزمین ما را اشغال کرده بودند. چوپان جوان در پاسخ گفت چرا چون این سؤالی کردی؟ فکر می که چوپان بیشتر از کتابها از گوسفندها آموزند و نیازی به خواندن کتاب ندارند بیش از دو ساعت به پرحرفی گذشت گفت که دختران آن است زندگی در شهر را خالی از ماجرا میبیند و روزهای یک نباخت آن را دوست ندارد. چوپان هم در بار دشت های به کرد و از آخرین رویدادهایی که تهیه سفرش چه در مسیر و چه در شهر دیده بود حکایت کرد و از اینکه مصاحبی داشت و مجبور نبود فقط با گوسفندهایش صحبت کند راضی به نظر می رسید. دخترک پرسید: خواندن را چگونه یاد گرفتی؟ مثل همه مردم در مدرسه تو که می توانی بخانی؟ پس چرا فقط چوپانی جوان فکر کرد که اگر علت را برای دخترک بگوید او چیزی نخواهد فهمید بنابر این بهتر دید به سوالش جواب ندهد و به ادامه شرح ماجراهای سفر پرداخت میدید که چشمان دخترک از تعجبگاه گاه بزرگ و از حراس گاه بسته می‌شوند زمان می‌گذشت و او آرزو داشت آرزو داشت روز به قروب ننشیند کار پدر دخترک انقدر زیاد شود تا از او بخواهد سه روز تمام به انتظار بماند خود را در حالت متفاوتی می دید. چیزی در درونش می دوید. احساسی که تا آن روز برایش ناشناخته بود میل داشت برای همیشه در همان شهر با همان دخترک موسیا. با چشمان سیاه درخشان باقی بماند برای همیشه آن هم در روزهای لبریز از بیخیالی روزهایی که هرگز شبیه به هم نباشند اما بازرگان سر رسیده بود و از او خواسته بود پشم چهار گوسفند را برایش بچیند پولش را هم داده بود و دعوتش کرده بود سال آینده دوباره بیاید. موسیقی اکنون چهار روز دیگر راه در بیش دارد تا به آن شهر برسد ناباور بود و بسیار ملتحه نکند دخترک فراموشش کرده باشد کم نیستن چوپانانی که از آنجا گذشته اند و پشم گوسفندهایشان هایشان را به بازرگان عرضه داشتند در حالی که با گلهش حرف میزد، ادامه داد من هم همینطور خیلی از دخترها را در شهرهای دیگر می شناسم اصلا مهم نیست اما در عمق وجودش میدید که او برایش بی اهمیت نیست و میدانست که شبانان مانند ملوانان یا فروشندگان دور گرد همیشه شهری را میشناسند که کسی در آن سکونت دارد که قادر است لذت سیاحت و جهانگردی آزادانه را موقتاً از یادشان ببرد. بنابراین نمی توانست قبول کند که او برایش مهم نیست. اولین شعاع صبحگاهی که ظاهر شد، چوپان گله خود را به سمت خورشید در حال طلوع هدایت کرد. در اندیشه بود که آنها تا زمانی که در کنارم هستند، نیازی نمی بینند تصمیمی بگیرند. تنها نیازشان آب و خوراک است. وقتی چوپانشان بهترین چراگاه های اندلس را میشناسد مسلما از او تمکین می کنند، حرفش را می‌شنوند و در کنارش دوستانه باقی میمانند. حتی اگر همه روزها یکی پس از دیگری شبیه هم باشند یا روزها کش بیایند و زمانشان در فاصله برآمدن و فرونشستن خورشید طولانی شود حتی اگر زبان آدمها را که از حوادث صحراها سخن میگویند نفهمند یا در طول عمر کوتاه خود هرگز کتابی نخوانده باشند در همه حال در پناه چوپان خود هستند و از آب و خوراکشان هم راضی هند در مقابل آنها هم قدر شناسند جواب محبتها را هم با محبت میدهند هر از گاه، در کمال سخاوت پشمشان را به همراه خود هدیه می کنند و گاه هم گوشتشان را به خود می گوید اگر زمانی از خود حیولایی بسازم و به جانشان بیفتم و یکی یکیشان را بکشم تا تمامی گله از به این برود آنها نه چیزی میفهمند و نه چیزی میگویند از شعور قریزی خود دست کشیدند خودشان را به من سپردند و به من اعتماد کردند البته علتش معلوم است این منم که آنها را به چراگاه میبرم جوان از تصور حیولا شدن و کشتن حیوانات وحشت کرد افکار خود را در هم و عجیب دید و از چون این تصوری شگفت زده شد با خود اندیشید شاید این مکان مخروبه، این کلیسای متروکه که درخت چناری از نمازخانه آن سر به آسمان کشیده محل آمد و رفت کولی جادوگر باشد؟ یا شاید اجنه فضای آن را اشغال کرده هند که چونین پراکنده اندیشید و چونین فکری در ذهنش جان گرفت؟ و در ادامه این فکر از خود پرسید، آیا خواب ناتمامی که دوباره به سراغش آمد نمیتواند علت افکار در همش باشد؟ و نمیتواند سبب شود آنچنان تصوری در ذهنش بدود و بخواهد عصبانیتش را بر سر دوستان همیشه وفادارش بر سر گوسفندهایش خالی کند فکرش به جایی نرسید شراب باقی مانده از شب قبل را سرکشید و بالاپوش خود را دور بدنش بیچید می دانست که تا چند ساعت دیگر با نیش خورشید هوا گرم می شود و او نخواهد توانست گلش را به اطراف ده ببرد. تابستان در این ساعت همه اسپانیا خوابیده است و گرما تا شب ادامه دارد. او ناگذیر بود تمام روز بالا خود را همراه داشته باشد. گاه و بیگاه به سرش میزد که این بار اضافی را از خود دور کند ولی بلافاصله یادش میآمد همین بار اضافی او را از سوز و سرمای سهرگاهی دشت‌های اندلس در امان نگه می‌دارد به خودش گفت اگر علت وجودیش چنین روشن است دلیلی ندارد در گرمای روز تحملش نکنم بهتر است برای مقابله با حوادث غیرمنتظره همیشه آماده باشم و از آن زمان وزن بالاپوش را با علاقه تحمل کرد تای دو سال گذشته همه دشتها و دهکده اندلس را زیر پا گذاشته بود و همه شهرهای منطقه را می شناخت و این چیزی بود که به زندگیش مفهوم میداد. مفهوم سفر کردن تصمیم داشت در این دیدار برای دخترک توضیح دهد که چگونه و چرا یک چوپان ساده با سواد است و می بخواند. و علتش را شعر دهد که تا شانزده سالگی در ای آموزش می‌گرفت که پدر و مادرش علاقه داشتند از او کشیش بسازند تا مایی قرور و سربلندی خانواده فقیری گردد که همه عمر سخت زحمت می‌کشید تا همانند گوسفندها فقط آب و خوراک کافی داشته باشد که لاتین، اسپانیولی و علوم دینی آموخته بود. با وجود این از بچگی آرزو داشت دنیا را بشناسد چرا که در آن چیزی میدید مهمتر از شناخت کائنات شناخت خدا یا شناخت گناهان مردم یک شب که از صومعه به دیدار خیشانش رفته بود در فرصتی مناسب به خود جرأت داد و به پدرش گفت نمیخوام کشی شوم میخوام سفر کنم بسرم، مردان و زنان بسیار با انگیزه های متفاوت از تیره ها و نجات گوناگون به این ده آمدند تا چیزهای تازه بیاموزند یا برای این که بفهمند گذشته از حال با عرضش است، کفش و کلاه می از آن تپه مرتفع کنار دهکده بالا می رفتند تا از نزدیک برج و باروی کاخ قدیمی را ببینند و به بررسی آن بنشینند آنها چه از روی هوس یا هر علتی دیگر سفر میکردند و سفر کردن را دوست داشتند. ولی این آمد و رفتها تغییری در آنها به وجود نمیآورد. از کوچه های خاکی ده میگذشتند از تپه بالا میرفتند، ساعت ها در پای کاخ می مینشستند. ولی همانطور که می آمدند، همانطور هم می رفتند. جوان گفت. اما من کوچه های خاکی سرزمین آنها را ندیدم. از تپه مشرف به دهکده آنان هیچ شناختی ندارم. کاخ قدیمی کسانی را که به اینجا آمده اند نمی شناسم. پدر ادامه داد وقتی آنها زنان و مزاره ما را میبینند میگویند می که دوست دارند برای همیشه اینجا زندگی کنند. جوان جواب می دهد آنها که هرگز اینجا در بین ما نماندند، من هم مایلم که زنها و سرزمین آنها را بشناسم و مزاره شان را ببینم. پدر گفت، این آدمها جیبهای پرپولی دارند، سفر کردن خرج دارد و از هرکس بر نمی آید. این فقط چوپان ها هستند که میتوانند سرزمین ها را زیر پا بگذارند. از دشت از دهکده ها، از شهرهایی با کوچه های باریک و تاریک و دراز بگذارند. همه جا را ببینند، سفر کنند، سفر. پس من هم چوپان می شدم. پدر بر این گفته حرفی یا سخنی اضافه نکرد. فردای آن روز در حالی که سه سکه یه به او میداد گفت روزی آنها را در مزرعه پیدا کرده و فکر می کردم به مناسبت کشیش شدن تو به کلیسا هدیه خواهم کرد. حال با آنها برای خودت یک گله گوسفند بخر و به سفر برو. ولی روزی خواهی فهمید که کاخ قدیمی دهکده ما بهترین کاخ و زنان دهکده ما زیباترین زنان هستند و دعای خیرش را بدرقی او کرد جوان در این حال میل سفر را در چشمان پدرش دید و فهمید با وجود اینکه دهها سال سعی در فروکوبی امیالش داشته و سرزمینی را انتخاب کرده و در آنجا ساکن شده تا ای داشته باشد و سرپناهی ای داشته باشد و خانوادهی تا در آنجا بخورد بنوشد و شبها بخوابد آرزوی سفر هیچگاه از او دور نشده و همیشه در او باقی مانده است این رنگ سفر در عمق نگاهش دیده میشد فوق به سرخی زد. آنگاه خورشید پدیدار شد. جوان از یادآوری گفتگویی که با پدرش داشت راضی به نظر می‌رسید. حال بسیاری از کاخ‌های قدیمی را شناخته است و خیلی از زنها را، اما آن دخترک که همه فکرش را تسخیر کرده بود، آفریده‌ای بود متفاوت و هیچ زنی را با او برابر نمی میل داشت پرواز کند و فاصله چند روزه را در لحظه ای بپیماید. ولی هوا گرم بود و گوسفندها در پناه سایه درختی لمیده بودند. فانگهی گوسفندها ها که پرواز نمی کنند پس باید کندی گذشته روزها را تحمل کند. همراه خود کتابی داشت که در اولین فرصت با کتابی دیگر عوض می بالاپوشی گرم در مقابل سوز و سرمای سهرگاهی داشت و گلهی گوسفند. مهمتر از همه تشنه سفر بود و هر روز که بیش از گذشته به این بزرگترین رؤیای زندگیش می رسید خوشحالتر می شد چه رؤیای وسوس است رؤیای سفر کردن به خود گفت وقتی از صحراهای اندلس خسته شدم، گوسفندها را می فروشم و ملوان می شدم. وقتی از دریا خسته می شدم، به ساحل می رسم، به شهرها، به زنها، به فرصتهایی ناشناخته که لذت بخشند و شادی آفرین. در حالی که به تولد خورشید خیره شده بود از خودش پرسید، چگونه میتوان خدا را با رفتن به کنیسه و کلیسا شناخت در حالی که وظیفه ما کامل کردن ذهنیات است تا از طریق اینیات به او برسیم عطل مقدور سعی میکرد مسیرهای تازهی بجوید، جوید دشتها و نقاط تازهی را بشناسد از این راه بارها و بارها گذشته بود ولی هیچ وقت تا پای کلیسای متروکه که درخت چناری از نمازخانه آن سر به آسمان داشت نیامده بود تا در آنجا شب را به صبح برد و در سپید دمان برای دومین بار خوابی ناتمام ببیند اندیشید دنیا گسترده و شگفت بی انتها و شگرف است فکر می کرد اگر خود را در اختیار گوسفندها بگذارد تا هدایتش کنند، چه اتفاقاتی ممکن است پیش آید؟ آیا خیلی طول می کشد که به پدیده های تازه و چیزهای پر جاذبه برسد؟ آیا آنها به حکم غریزه قادرند روزی خود را بجویند به آب خونک و علف تازه برسند؟ آیا آنها میدانند که در مقابل گرما باید سرپناهی بجویند، به به سایهی پناه برند یا شبها از خطر گرک خود را در امان نگه دارند؟ ولی آنها مشقلهی جز خوراک و آب ندارند. آنها از غریزه طبیعی خود دست کشیدند و خود را در اختیار چوپانشان گذاشتند. فکر نمی که راه تازهی می یا به چراگاه جدیدی رسیدند و حتی تشخیص هم نمی دهند که فصلها تغییر کردند. چون همیشه در همه فصول روزها را شبیه به هم دیدند، چراگاهها را پر پرالف و چشمه را با آب فراوان. جوان به خود گفت، چونین است گردش دنیا. اگر گوسفندها ها فکری جز آب و علف ندارند، او هم فکری جز فکر آن دخترک در سر ندارد. به آسمان نگاه می کند. به حساب خودش قبل از ظهر به تاریف خواهد رسید. آنجا کتابش را می تواند با کتاب پرحجمتری عوض کند. شیشهش را از شراب پر سازد و موهایش را کوتاه و مرتب کند. چرا که باید برای پیدا کردن دخترک آماده شود به هیچ وجه نمیخواهد تصور کند که ممکن است چوپانی دیگر با گوسفندهای بیشتر قبل از او برای دیدار دخترک به آنجا رسیده باشد در حالی که گامهای تندتری برمی داشت دوباره نگاهش را در آسمان جولان داد و اندیشید سلما هر خواب تعبیر خود را دارد بسیاری از آنها هم با واقعیت های عینی همراهند و همین وپسه بس ها به زندگی جذابیت میدهند و به تلاش در راه آن مفهوم. شنیده بود که در شهر تاریفا پیرزنی زندگی می کند که زبان خواب ها را میشناسد و قادر است خواب را تعبیر کند و او خوابی دیده بود و دیشب. در پای آن درخت چنار، در محووته کلیسای متروک، همان خواب و همان مشخصات دوباره تکرار شده بود. پس... پیرزن جوان را در انتهای راهروی خانهش به اتاقکی که با پرده نایلونی رنگ و وارنگی از سالن جدا میشد، هدایت کرد. آنجا یک میز، دو صندلی و تصویری از عیسی مسیح وجود داشت. پیرزن نشست و از او هم خواست بنشیند. دستانش را در دست گرفت و به آرامی شروع کرد به ورد خواندن و دعا کردن دعای او نوعی عبادت بود عبادت کولیها چه؟ او در مسیرش بارها و بارها کولیها را دیده بود و به نحوه عبادتشان آشنایی داشت و آنها را می و میدانست که مرتب سفر می کنند ولی هیچ گاه به گوسفند و گلداری نمی پردازند در مورد کولیها حرف و شایعه بسیار شنیده بود که کولی ها موی شیطان برتن خود دارند به مردم آزار می رسانند اموال دیگران را میدزدند گاو و گوسفند را در مسیر خود میگیرند و میبرند به بهانه کفبینی به خانه مردم میروند و به راه‌های مختلف آنها را فریب می دهند و پول میگیرند همچنین شنیده بود که کولی ها با همزادشان عهد کردند که بچه‌های نابالغ را بدزدند و در اردوگاه های اسرارآمیز خود از آنها برده و فرمانبردار بسازند. جوان هم زمانی که خیلی کوچک بود از فکر اینکه کولی ها او را بدزدند همیشه در حراس بود. این ترس وقتی به سراغش آمد که پیرزن کولی دستان او را در دست خود گرفت. در حالی که سعی میکرد به خود آرامش دهد فکر کرد در اینجا که تصویر مسیح مقدس وجود دارد میل نداشت دستانش بلرزند و پیرزن متوجه آن شود. ساکت بود و در درون خود خدا را به یاری میخوند پیرزن بدون اینکه نگاهش را از دست پسرک منحرف کند گفت جالبم و بار دیگر خاموش شد جوان بیش از پیش آشفته بود کم کم خود را عصبانی حس میکرد با وجود اینکه به خود تلقین می کرد که نباید به همه تنش می لرزید. وقتی دستانش را پس کشید، پیرزن متوجه شد که رنگ جوان سفید شده و بر پیشانی او عرق ترس نشسته است و صدای او را شنید که برای کفبینی به اینجا نیامده حال، با تصف از اینکه چرا حساب نکرده وارد این خانه شده است، فکر کرد بهتر است پول مشاوره را بپردازد و راهش را بگیرد و برود بدون اینکه مطلب تازه ای از پیرزن شنیده باشد. ولی به خوابی که دیده بود و تکرار هم شده بود اهمیت می داد و نسبت به تعبیر آن بسیار کنجکاف بود. پیرزن گفت تو آمده ای تعبیر خوابت را از من بپرسی. خواب ها بیان خدا هستند. وقتی خدا از این دنیا حرف می زند، من می توانم تعبیرش کنم. ولی وقتی به بیان روحتو می پردازد هیچ کس تو نمی تواند از آن سر درآورد. به هر جهت باید حق مشاوره مرا بپردازیم. جوان نجوا گفت از این حرف بوی فریب به مشام می رسد. با وجود این تصمیم گرفت خطر را پذیرا شود. به خود تلقین کرد که چوپانها همیشه در معرض خطرند خطر گرک ها، خطر خشکسالی خطر امراض دامی و معتقد بود همه این اتفاقات به شغل شبانی هیجان میدهند. دهند. بنابراین شروع کرد به گفتن اینکه دو بار پشت سر هم همان خواب را دیدم با گوسفندهایم در چراگاهی بودم ای سر رسید و با حیوانات شروع کرد به بازی خیلی دوست ندارم هر کسی بیاید و با گوسفندهایم بازی کند آنها از آدمهایی که نمیشناسند شناسند اما هر از گاهی بچه ها می توانستند با آنها بازی کنند بی آنکه که میشها بترسند این برایم جالب بود که بدانم حیوانات چگونه سن آدمها را تشخیص می دهند چرا از بچه ها نمی ترسند و با آنها زود انس میگیرند. پیرزن گفت پول زیادی که نداری پس همه وقت مرا نگیر دیگی روی آتش دارم که باید به آن برسم کوتاه کن داستانت را ادامه بده و به موضوع خوابت برگرد چوپان با کمی تردید ادامه داد پسر بچه مدتی با میشهایم بازی کرد اما ناگهان به سمت من آمد دستم را گرفت و مرا تا اهرام برد کمی مکس کرد، ببیند پیرزن اهرام را میشناسد یا نه اما او ساکت بود در مقابل اهرام مصر این کلمات را شمرده با واضح تلفظ کرد تا پیرزن بتواند بهتر بفهمد به چه میگوید پسرک به من گفت اگر تا اینجا بیایی گنجی به دست خواهی آورد زمانی که میخواست محل دقیق گنج را نشانم دهد هر دو دفعه از خواب پریدم پیرزن بدون اینکه چیزی بگوید چند لحظه‌ای در خود فرو رفت. سپس دوباره دستان جوان را گرفت و با دقت به مطالعه آنها پرداخت و گفت: حالا از تو پولی مطالبه نمی کنم. اما اگر گنج را پیدا کردی دهمین ده قسمت آن را می خواهم. جوان به خنده افتاد. خنده از روی رضایت به خود گفت: این گونه می توانم حق مشاوره را هم ذخیره کنم این پیرزن کلی باید خیلی احمق و تمما باشد نقد را گذاشت و دندان برای نسیه تیز کرد قسمتی از گنج را میخواهد. از پیرزن پرسید خب این خواب را چگونه تعبیر می کنی؟ قبلا باید سوگند یاد کنی برایم قسم بخور که در مقابل آنچه به تو خواهم گفت ده همین قسمت گنجت را به من خواهی داد قسم خورد پیرزن از او خواست که به تصویر عیسی مسیح بنگرد و سوگندش را تکرار کند پیرزن ادامه داد این خواب بیانیست از این دنیا با وجود اینکه تعبیرش نسبتاً مشکل است اما تعبیرش می کنم بنابراین سهم من از آنچه پیدا خواهی کرد به نظر عادلانه است و یک دهم ده از گنج تو حق من است. تعبیرش این است که باید تا اهرام مصر بروی. هرگز از آنجا سخنی نشنیدم، ولی اگر بچه ای آنها را به تو نشان داده، لابد وجود دارند. در آنجا به گنجی می رسی که از تو آدم ثروتمندی میسازد. جوان ابتدا متحجب و سپس عصبانی شد، برای این چند کلمه احتیاج نداشت این زنک را پیدا کند ولی به یاد آورد که پیرزن فعلا از او حق مشاوره را نمیگیرد. بنابراین ضرری متوجه خود ندید. با این وصف گفت: «اگر میدانستم تعبیر خوابم همین چند کلمه است، هرگز این همه وقت خود را تلف نمیکردم. بینی؟ به تو گفته بودم که تعبیر خوابت خیلی مشکل است. چیزهای ساده با وجود سادگی رویدادهای شگفتانگیزی هستند. فقط متفکران و آلمان هستند که آنها را میبینند و به بررسی میگذارند. من که از آنها نیستم. پس باید هنر دیگری یاد بگیرم که با آن بتوانم گذشته و حال مردم را ببینم و برایشان بگویم. مثلا همین کفبینی را. برای رفتن به مصر چه کاری باید بکنم؟ پیرزن گفت جز تعبیر خواب کاری نمیتوانم بکنم. در توان من نیست که خواب را به واقعیت بدل کنم. راه رسیدن به آن را هم نمیشناسم. به همین دلیل است که این ندارم و با کمک دخترانم سیورسات زندگی را فراهم می کنم و به زندگی خود ادامه می دهم. و اگر به مصر نرسیدم؟ خب معلوم است. اولین بارم که نیست، چیزی به من نخواهی داد پیرزن ساکت می شود و حرفی نمی زند جوان وقتش را زیاد گرفته است، از او می خواهد که راهش را بگیرد و برود دوپان تصمیم گرفت هیچگاه خوابها را باور نکند و با آنها دل نبندد از پیرزن و حرفهای او هم راضی نبود کمی هم خود را سرخورده و معیوس میدید به یاد آورد کارهای دیگری هم دارد که باید انجام دهد قضایی برای خود پیدا کرد کتابش را با کتاب هجیم عوض کرد و سپس در میدان شهر روی نیمکتی نشست تا از وقت اضافی استفاده کند و فارق شراب تازه را که خریده بود مزه کند و لذت ببرد. روز گرمی بود. شراب با رمز و رازی که در خود نهفته داشت کمی خونکش کرد. گوسفندهایش را در ورودی شهر به استبل تازه سازه یکی از دوستان جدیدش هدایت کرد. این دوروبرها خیلی را می شناخت. به همین خاطر هم سفر کردن را این همه دوست داشت به خودش می گفت همیشه میتوان دوست جدیدی پیدا کرد بی آنکه اجباری باشد هر روزش را با او بگذراند وقتی با اشخاص معینی دائم در آمد و شد باشیم و همیشه همانها را ببینیم مثل حالتی که در سومه وجود داشت به مرحله ای می رسیم که آنها را جزئی از زندگی خود بدانیم در این صورت آنها مایلند در زندگی ما اثر بگذارند و تغییرش بدهند. حال اگر هماوا با تصورات آنها نباشیم، بدیهی است که نارضایتی ها بروز میکند. زیرا که مردم خیالاتی اند و بر این تصور که دقیقاً میدانند دیگران چگونه باید زندگی کنند. اما هیچکس هرگز در طول عمرش یاد نگرفته است خود چگونه زندگی کند. مثل آن که کولی که به قولی از گذشته میگفت و از آینده حرف میزد، تعبیر خواب می شناخت و به دیگران میگفت که چه باید بکنند، ولی خودش در گیر زندگیش بود و نمیدانست چگونه میتوان رموز خوابها را شناخت. قبل از بردن گوسفندها به دشت، تصمیم گرفت درنگ کند که خورشید کمی پایین بیاید. تا سه روز دیگر دختر بازرگان را خواهد دید. شروع کرد به خواندن کتابی که کشیش تاریفا به او داده بود. کتابی پرحجم که از اولین صفحه آن موضوع یک خاک سپاری مطرح می به علاوه، اسامی شخصیت ها فوقلاده مشکل و پیچیده بود. فکر کرد اگر روزی بخواهد کتابی بنویسد، شخصیت را یکی یکی آنچنان وارد داستان می کند که خاننده براحتی بتواند آنها را در کنار موضوع اصلی تغییب کند. همین که فکرش را و جور کرد و افکارش را روی کتابش متمرکز ساخت، شرح مراسم تطوینی بود در برف، چیزی که در زیر آفتاب سوزان به او احساس خونکی می داد و برایش دلچسب بود. پیرمردی در کنارش نشست، و شروع به حرف زدن کرد پیرمرد در حالی که آبران میدان را نشان میداد گفت اینها چه کار می کنند؟ چوپان با تظاهر به اینکه مجذوب موضوعی است که, که میخواند خیلی خشک جواب داد به دنبال کارشان هستند اما در حقیقت سوار بر یابوی خیال بود که جلوی دخترک مشغول چیدن پشم گوزفند است و نگاه سرشار از تحسین دخترک را بر حرکات ماهرانه خود دارد این صحنه بارها و بارها در بستر ذهنش روان شد خود را می دید و او را و زمانی را که با آب و تاب فراوان شروع می کرد به گفتن اینکه پشمگوس پشم ها را حتما باید از عقب به جلو چید نگاه مات و مپوت او را میدید که چگونه به دانشش ارج می و هنرش را می ستاید. یا زمانی که داستانهای مختلف از سفرهای دور و دراز و ماجراهای متفاوت خود می ساخت و برایش تعریف می کرد، باز هم تصویر دخترک در ذهنش جان می گرفت که مرعوب است و متعجب البته خودش میدانست که همه داستان‌ها، همه ماجراها را در کتاب‌های مختلف خوانده است ولی آنها را برای دخترک به شکلی تعریف می‌کرد که گویی وقایع زندگی خود او بودند. با خود می‌گفت تفاوتی هم ندارند. زندگی زندگی است. آنها می‌توانستند ماجراهای زندگی من هم باشند. چه فرق می‌کند؟ دخترک که با شنیدن آنها راضی می‌شود. وانگهی او که سواد ندارد تا کتابها را بخواند و پیرمرد در این میان اصرار دارد که با او حرف بزند میگوید خسته است تشنه است و جرئهای شراب میخواهد جوان شیشه شراب خود را به او داد به تصور اینکه شاید راحتش بگذارد اما پیرمرد دلش میخواست پرحرفی کند از چوپان پرسید چه میخوانی جوان فکر کرد خودش را عصبانی نشان دهد و جایش را عوض کند ولی پدرش به او یاد داده بود به آدمهای پیر و مسن احترام بگذارد کتابش را به دو دلیل سمت پیرمرد گرفت اولا خودش قادر نبود عنوان کتاب را تلفظ کند ثانیا فکر کرد پیرمرد سواد ندارد و برای اینکه شرمنده نشود ناگزیر خواهد بود جایش را عوض کند پیرمرد پس از وارسی همه جای کتاب درست مثل اینکه چیز عجیبی دیده باشد گفت کتاب با اهمیتی است ولی خیلی کسل کننده و ملالت بار است چوپان متوجه شد که او نه تنها سواد دارد بلکه این کتاب را هم خوانده است متعجب و قافلگیر شد اگر این کتاب آنطور که او میگوید کسل کننده باشد هنوز وقت دارد با کتاب دیگری عوضش کند. پیرمرد ادامه داد، این کتاب تقریبا مثل همه کتاب از چیزهای مشابهی حرف میزند. از عدم توانایی انسانها در انتخاب سرنوشت خود می و در خاتمه اجازه می بزرگترین فریب دنیا را باور کنیم. جوان متحجب پرسید، بزرگترین فریب دنیا دیگر چیست؟ اینکه در یک لحظه از حیات خود مالکیت و فرمان زندگی را از دست میدهیم و تصور میکنیم سرنوشت بر زندگی مسلط شده است همین نکته بزرگترین فریب دنیاست جوان گفت برای من سرنوشت به این شکل نگذشت میخواست از من کشیش بسازد و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم پیرمرد گفت درست است این طور بهتر است. دوست داشتی که مسافرت کنیم. سانتیاگو به خود گفت: افکارم را حفظ میزند. در این بین پیرمرد کتاب را ورق می‌زد، بی آنکه تصمیم داشته باشد آن را به او برگرداند. چوپان وراندازش کرد، متوجه شد به نحو خاصی لباس پوشیده و حالت عربها را دارد. چیزی که در منطقه خیلی خارق‌العاده نبود. آفریقا تنها چند ساعتی با تریفا فاصله داشت. کافی بود با قایق از ترعی کوچک بگذرند. بسیاری از مباقه دیده می شد اعرابی که برای خریدهایشان به شهر آمدند روزانه چند بار به نحو خاصی عبادت می سوال کرد کجایی هستید؟ از جاهای خوب؟ به سرک گفت هیچ کس نمیتواند اهل چند منطقه باشد. خود من چوپانم. میتوانم در مناطق مختلف باشم ولی فقط اهل یک جا هستم. روستایی که یک کاخ خیلی قدیمی دارد. آنجاست که متولد شدم. پس بگوییم که اهل سالیم هستم. چوپان نمیدانه سالیم کجاست و سؤال هم نخواست بکند تا از ناآگاهیش شرمنده نشود. چند لحظه میدان را نگاه کرد. مردم را دید که در رفت آمدند و سخت مشغول. برای اینکه نشانی به دست آورد پرسید سالیم چطور است؟ مثل همیشه تغییر نکرده. اینکه برایش نشانی نشد. مطمئن بود سالیم در اندولوس نیست چون در آن صورت آن را می شناخت. و در سالیم شما چه کار می من در سالیم چکار میکنم؟ برای اولین بار پیرمرد قه, قه زد. چه سوالی؟ من پادشاه سالیم هستم. مردم چیزهای عجیبی میگویند. بهتر است گاهی وقتها آدم با میش ها زندگی کند چون هم ساکتند و هم از پیدا کردن آب و خوراک راضند. یا اینکه با کتابها که داستان های باورنکردنی حکایت میکنند البته هر وقت که انسان بخواهد به آنها مراجعه کند اما وقتی با مردم حرف میزنی چیزهایی میگویند که آدم بیان که بداند چگونه گفتگو را دنبال کند حیرت زده باقی می پیرمرد گفت اسم من ملکی صدق است و پرسید چند رست گوسفنداری؟ چوپان جواب داد تعدادی که لازم است و اندیشید کارهایم به این پیرمرد چه ربطی دارد که چون این کنچکاوی می کند. بنابراین مشکلی داریم. تا زمانی که فکر می کنی به اندازه کافی گسفنداری قادر نخواهم بود کمکت کنم. پسرک شروع کرد به هرس خوردند. به هیچ وجه کمکی از اون نخواسته بود. این پیرمرد بود که از او تقاضای شراب کرده بود. که کتابش نظر او را جلب کرده بود و میل داشت با او پرحرفی کند. گفت، باید سراغ گوزفند هایم بروم و به راه هم ادامه بدهم. کتابم را پس بده. پیرمرد گفت، یک دهم آن را به من بده. چگونگی رسیدن به گنج را به تو خواهم گفت. جوان دوباره خوابش را به خاطر آورد. همه چیز برایش روشن شد. پیرزن از او پولی نخواست ولی این پیرمرد که گویا شوهرش است با اطلاعات ناقص خود به نظر می رسد می خواهد از او چیزی کش برود و پولی تلکه کند. با خود گفت این مرد هم باید کلی باشد. آن وقت قبل از اینکه حتی کلمه ای بگوید دید که پیرمرد شاخه ای را از زمین برداشت و روی خاک نرم میدان شروع به نوشتن کرد. زمانی که خم شد چیزی روی سینه‌اش درخشید که برقش چشم‌های پسرک را خیره کرد با حرکت سریعی که برای سن او بعید بود عبا را روی نیم کشید وقتی چشمان پسرک از خیرگی فرونشست توانست آنچرا که پیرمرد مشغول نوشتنش بود با وضوح بیشتر ببیند روی خاک نرم میدان اصلی شهرک، اسم پدر و مادرش را خواند. داستان زندگیش را تا آن لحظه، بازیهای دوران کودکی و شبهای سردی را که در صومعه داشت. همچنین، مواردی را که هرگز برای کسی تعریف نکرده بود، مثل اولین تجربه جنسی یا کش رفتن تفنگ پدرش برای رفتن به شکار بوز کوهی، همه و همه را خاند. پیرمرد گفته بود، من پادشاه سالیم هستم. گوان ناراحت و غرق در تعجب پرسید، چرا یک پادشاه با یک چوبان حرف میزند و وراجی میکند؟ دلایل گوناگونی برای این کار وجود دارد، اما مهمترینش این است که تو شایستگیش را داری که حدیث خیش را کامل کنی. جوان نمیدانست منظور او از حدیث خیش چیست چیزی که همیشه آرزوی انجامش را داشتیم هر یک از آدمها از آغاز جوانی حدیث خیش را میشناسد. در این دور از زندگی همه چیز روشن است و انجام شدنی انسان از رؤیاها و آرزوهایی که دوست دارد در زندگی انجام دهد وحشتی ندارد با گذشت زمان نیروی عجیب و اسرارآمیزی سعی می کند به آدم بفهماند که شکل دهی و انجام حدیث خیش ناممکن است. آنچه پیرمرد گفت برای چوپان جوان مفهوم خاصی نداشت ولی مایل بود بداند که نیروهای اسرارآمیز کدامند. چون این موضوع می توانست دختر بازرگان را با دهان باز به تعجب وادارد به نظر میرسد رسد این نیروها نیروهای مانع هستند. ولی در واقع به تو یاد می دهند حدیث خیش را بسازیم. اینها عواملی هستند که به عقل و اراده تو نظم می دهند. حقیقت بزرگی در این دنیا وجود دارد که از این قرار است. چه کاری باید بکنی و چه کسی باید باشی؟ زمانی که واقعا خواستار چیزی هستی، باید بدانی که این خواسته در زمیر جهان متولد شده است و تو فقط مأمور انجام دادنش بر روی زمین هستی. حتی اگر فقط حوث سفر کردن باشد یا ازدواج با دختر یک بازرگان یا جستجوی گنج. روح دنیا از خوشبختی یا بدبختی هوس یا حسادت مردم انباشته است. هیچ نیست مگر یک چیز. تکمیل حدیث خیش که آن هم تنها اجبار انسان هست. وقتی خواستار چیزی هستی، همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواستهت برسی. کمی سکوت کردند، نظری به میدان و آبران انداختند و این پیر مرد بود که آغاز سخن کرد. چرا ها را نگه داشتیم؟ چون دوست دارم سفر کنم. پیرمرد یک فروشنده دور گرد زررت بوداده را با چهار چرخه قرمز رنگش در گوشه از میدان نشان داد و گفت این شخص هم در کودکی علاقه داشت سفر کند. اما ترجیح داد چهار چرخه کوچکی بخرد و زررت بوداده بفروشد و سالها پول جمع کند. وقتی هم که پیر شد سفری به اینجا و آنجا به آفریقا می میکند ولی هیچ وقت نخواهد فهمید که همیشه امکان این که آدم بتواند رؤیایش را تحقق بخشد وجود دارد. چوپان همانطور که میاندیشید با صدای بلند گفت: "باید شغل چوپانی را انتخاب کند." پیرمرد گفت: "فکر خوبی است." اما فروشندگان ذرت بوداده از چوپان ها مهمترند. آنها سخف و خانهی دارند که از آن خودشان است. در صورتی که چوپان زیر آسمان پرستاره می خوابد. مردم ترجیح می دهند دخترشان را به فروشنده ذرت بوداده بدهند تا به چوپان. جوان به دختر بازرگان فکر کرد و قلبش گرفت و سوزشی در آن احساس کرد. در شهری که او زندگی میکند مطمئنا یک فروشنده ذرت بوداده وجود دارد و بالاخره اندیشه مردم درباره فروشندگان ذرت و چوپانها برایش مهمتر از حدیث خیش شد پیرمرد کتاب را ورق زد و خود را با خواندن صفحه‌ای از آن مشغول کرد چوپان کمی درماند کرد سپس رشته خواندن او را به همان شکلی که برای خودش اتفاق افتاده بود قطع کرد چرا این چیزها را به من میگویید چون میکوشی در حدیث خیش زندگی کنی در صورتی که دقیقاً در مرحله انصراف از آن هستی و شما همیشه در چنین مواقعی ظاهر میشوید همیشه به این شکل که نه ولی هیچگاه کوتاهی نکردم گاهی به یک فکر خوب بدل میشوم تا کاری صورت گیرد و زمانی دیگر در لحظه حساس تصمیم گیری به نحوی عمل میکنم که همه چیز آسان تر شود به این ترتیب است که نقش هایم ادامه پیدا میکنند ولی اکثر مردم به هیچ وجه متوجه دخالت های من نمی شود. تعریف کرد که هفته گذشته ناچار شد برای یک جوینده زمورد به شکل تکه سنگی ظاهر شود. مردی که همه چیز را گذاشته بود تا در جستجوی زمورد باشد. پنج سال متمادی در طول یک رودخانه زحمت کشیده بود و کار کرده بود و 999999 ,999 سنگ را به امید پیدا کردن زمرد. شکسته بود و زمانی که فقط یک قلو سنگ در مقابل داشت فکر کرده بود از کار دست بکشد و از ادامه آن سرف نظر کند در این لحظه پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند چون او را مردی دید پاک باخته که همه زندگی خود را در قمار حدیث خیش از دست داده بود بنابراین به سنگی بدل شد که زیر پای جوینده زمرد می آن مرد مقبون و نادم از پنج سالی که گم کرده بود با خشونتی هرچه تمام در سنگ را به نقطه دور پرتاب کرد. ولی شدت پرتاب چنان بود که در برخورد با سنگ دیگر شکست و از درون آن زیباترین زمرد دنیا هویدا گشت. پیرمرد در حالی که از نگاهش نیش و کنایه می ریخت گفت مردم سهل و آسان به انگیزه زیستن خیش می‌رسند. شاید به همین دلیل است که خیلی زود هم از دستش میدهند و این چنین است که دنیا به گردش خود ادامه می‌دهد. جوان به خاطر آورد که پر حرفی‌هایشان از ابتدا پیرامون گنج بود که پیرمرد در ادامه حرفایش گفت گنج ها با حرکت سیل از خاک درآدهاند و با بالا آمدن همان جریان آب بار دیگر زیر خاک رفتند. اگر میخواهی اطلاعاتی دقیق تر از گنج خود داشته باشی، یک دهم گلت را باید به من بدهیم. با یک دهم گنج معامله نخواهد شد؟ پیرمرد که میوس به نظر می رسید ادامه داد: اگر درباره قسمتی از آنچه هنوز در اختیار نداری قولی بدهی و راحت را بگیری و بروی، حوس و انگیزه مالک شدنش را از دست خواهی داد. چوپان به او گفت، «فعلا به زن قولی قولی دادم که یک دهم گنج را به او بدم. پیرمرد آهی کشید و گفت، کلی ها خبیس و موزی هند. در جهت بهتر است در زندگی یاد بگیری که هر چیز و هر کاری قیمتی دارد و این درسی است که جویندگان راستی سعی می‌کنند بیاموزند. سپس کتاب جوان را به او داد و اضافه کرد: یک دهم ده از گوسفندهای گلت را فردا همین ساعت برایم می‌آوری و من هم به تو خواهم گفت چگونه موفق می‌شوی گنج خود را پیدا کنی. کافی است برویم. عصب بخیر. و در یکی از گوشه های میدان فرو رفت و ناپدید شد. جوان سعی کرد دوباره کتابش را بخواند اما موفق نمیشد. ذهنش در هم شفته بود. خود را در غلیان و هیجان میدید. میدانست که پیرمرد درست میگوید فروشنده دور را پیدا کرد و از او پاکتی ذرت بو داده خرید. در حالی که از خود میپرسید گفته های پیرمرد را برایش بگوید یا نه؟ فکر کرد؟ گاهی بهتر است بقایه را همانطور که هستند فراموش کرد. بنابراین چیزی به دورگرد نگفت. چه اگر از اتفاقات سخنی گفته می دورگرد برای فهمیدنشان باید همه چیزش را رها می کرد و سه روز به فکر مینشست در حالی که به چهار چرخه کوچکش سخت عادت کرده بود. بهتر بهتردید دورگرد را به حال خود بگذارد و بگذارد تا از تردید و شک درناک درون خود بیخبر بماند. سرگردان در شهر به هر طرفی رفت، به بندر رسید. در آنجا ساختمان کوچکی وجود داشت که از سوراخی شبیه پنجره مردم اطلاعات سفر می و بلیت می خریدند. مصر، این که در آفریقاست، متصدی گیشه سوال کرد، چیزی میخواستید؟ در حالی که از آنجا دور میشد جواب داد، شاید فردا، فقط با فروش یک میش می از طرع بگذارد، این فکر او را به وحشت انداخت. متصدی گیشه وقتی جوان از او فاصله گرفت، رو کرد به همکارش و گفت، باز هم یک شوریده خیالاتی دیگر، چیزی ندارد تا هزینه سفرش را بپردازد. وقتی جلوی گیشه بود به گوسفندهایش فکر کرد. وحشت داشت به سراغشان برود. طی دو سال اخیر همه چیز را در مورد گلهداری یاد گرفته بود. میدانست چگونه پشمانها را بچیند، از میشهای باردار مراقبت کند یا چگونه گلش را در مقابل گرک ها حراست کند. همه مراتع و های اندلس را هم می شناخت. مهمترین اینکه ارزش واقعی تک تک گوسفندهایش را میدانست. تصمیم گرفت از دورترین راه ممکن به استابل دوستش برود. قصری قدیمی در شهر بود. دلش می‌خواست از پلکان سنگفرش شده آن بالا رود و روی دیوار بلند آن بنشیند که رفت. از آن بالا می توانست قسمتی از آفریقا را ببیند زمانی کسی برایش تعریف کرده بود که مغربی ها از آن راه به اسپانیا آمدند و تا مدت ها تقریبا همه اسپانیا را در تصرف داشتند از مغربی ها بیزار بود چون به نظرش کولی ها را آورده بودند دیگر اینکه از آن بالا قسمت اعظم شهر از جمله میدانی که در آن با پیرمرد پرحرفی کرده بود دیده میشد. فکر کرد: لعنت بر آن ساعت که با این پیرمرد آشنا شدم. رفته بود زنی را پیدا کند که در تعبیر خواب مهارت داشته باشد نه این زنک را و نه این پیرمرد را که برای شغل چوپانی او پشیزی ارزش خوائل نبود. اینها کسانی هستند که در زندگی هیچ چیز و هیچ کس را قبول ندارند، حرف خودشان را میزنند و حتی نمیخواهند بفهمند چوب پانها به حیواناتشان وابسته و دلبستهاند. به خوبی هر یک از گوسفندهایش را می شناخت. میدانست کدام یک میلنگد؟ کدام یک تا دو ماه دیگر میزاید و کدامشان با ارزش و قیمتی است. همچنین به خوبی میداند چگونه پشمشان را بچیند یا اینکه چگونه ضبهشان کند اگر تصمیم به رفتن بگیرد و برود آنها رنج خواهند برد باد شروع به وزیدن کرد این باد را میشناخت به آن لوان یا باد خاوری میگفتند با همین باد بود که آن کافران صحرا گرد آمده بودند. قبل از شناخت تاریفا تصور نمی کرد آفریقا اینقدر نزدیک باشد. این خود خطری جدی بود خطر اینکه که مغربی ها دوباره کشور را تصرف کنند. باد خاوری با شدت بیشتری می وزید و او فکر می کرد این منم که بین گوسفندهای خود و گنج هستم. باید تصمیم بگیرد بین چیزهایی که به آنها عادت کرده و چیزهایی که دوست دارد به دست بیاورد یکی را انتخاب کند. دختر بازرگان هم وجود داشت اما نه نه به اهمیت گوسفندایش. بانگهی هنوز به او وابسته نبود. اطمینان داشت اگر تا پسین فردا دوباره نبیندش در ذهن دخترک خاطره ای از او باقی نخواهد ماند. برای دخترک همه روزها شبیه به هم بودند چون آدمها سعی ندارند چیزهای خوب زندگیشان را ببینند و با وجود گذر خورشید در آسمان خود را از دیدن آنها محروم می کنند چون این است که روزها یکی پس از دیگری شبیه به هم میشوند. به خود می گوید، پدرم مادرم قصر قدیمی روستایی که در آن متولد شده هم همه را ترک کردم. کاری را که آنها کرده بودند من هم کردم. گوسفندهای من هم همان کار را در غیبت من خواهند کرد. از آن بالا میدان را دید و فروشنده دور گرد را که مشغول فروش بو بوداده بود. پسر و دختر جوانی را دید مشغول مغازله روی همان نیمکتی که او و پیرمرد ساعتی قبل نشسته بودند. باد خاوری با شدت هر چه بیشتر به صورتش فرو کوفت و او جمله فروشنده ی بوداده را که زیر لب برای خود زمزمه می کرد ناتمام رها ساخت. بدون شک این باد مغربی ها را می آورد. یا که بوی زنها را بوی زنهایی بارو بنده بوی را، و شاید خبر از دشواری می دهد. دشواری راه راه رویاه رویاهای انسان هایی که روزی از روزها به جستجوی ناشناخته ها به جستجوی طلا در پی ماجراها و اهرام رفتند جوان به آزادی باد حسادت کرد ولی فهمید که اگر بخواهد میتواند مثل آن آزاد باشد چون هیچ کس و هیچ چیز مانع آزادی او نمی شود، مگر خودش. گوسفندها، دختر بازرگان، دشتها و مزارع اندلس مگر چیزی بجز حدیث او بود. شش راس گوسفند با خداورد و نزدیک ظهر پیرمرد را دید و گفت از اینکه دوستم فوراً گله را از من خرید حیرت کردم به من گفت تمام عمرش آرزو می‌کرده فرصتی پیش آید که روزی چوپان شود قافلگیر شدم ولی آن را به فال نیک گرفتم پیرمرد در پاسخ گفت که همیشه این است چون این شرایطی را شروع مناسب میگوییم. اولین بار که ورق بازی کنیم مطمئن خواهی برد شانس شانس مبتدی هاست برای چه؟ چون زندگی مایل است که تو با حدیث خیش زندگی کنیم سپس به وارسی گوسفندها پرداخت و دید یکی از آنها می لنگد. پسرک گفت این مهم نیست؟ حیوان باهوشی است و پشم فراوان هم میدهد و پرسید گنج کجاست در مصر نزدیک اهرام جوان از جای خود پرید پیرزن هم بدون اینکه چیزی از او بگیرد همین را به او گفته بود برای رسیدن به گنج لازم است خیلی مواظب نشانه ها باشید خداوند برای هر یک از ما در این دنیا راهی تعیین کرده که باید ادامه دهیم. کاری نداری جز این که آنچه را برای تو نوشته شده بخانی. پیش از آن که جوان بتواند حرفی بزند، پروانه ای را دید که بین او و پیرمرد به پرواز در به یاد آورد، هنگام کودکی پدر بزرگش به او گفته بود، پروانه ها علامت شانس هند، جیر سنجاغک های سبز، مارمولک‌های خاکستری و شبدرهای چارپر هم همینطور پیرمرد می توانست فکر او را بخواند. گفت همانطور که پدر بزرگت به تو یاد داد همینها نشانه هستند سپس ابایی را که به دور بدنش کشیده بود پس زد جوان از آنچه دید بهت زده شد یادش آمد که روز قبل هم چشمش از برق آن خیره شده بود. پیرمرد جلیغ مانندی از طلای خالص مزین به سنگهای قیمتی پوشیده بود. واقعا پادشاهی بود که برای پرهیز از خطر راه زنان خود را به این شکل درآورده بود. در حالی که از وسط جلیق مانندش سنگی سفید و سنگی سیاه را می رو به او کرد و گفت بگیر، اینها اسمشان اوریم و تومیم است. سنگ سیاه به مفهوم آریست و سنگ سفید علامت نه. وقتی نتوانستی نشانه ها را تشخیص بدهی، آنها کمکت خواهند کرد. اما همیشه سوالی واقعی و حقیقی مطرح کن. بیشتر سعی کن تصمیمهایت را خودت بگیری. از قبل میدانستی که گنج نزدیک احرام است ولی باید به معادل شش رأس گوسفند می پرداختی تا تصمیمی جدی بگیری چون من بودم که به تو کمک کردم از تردید و دودلی وارهی و در راه حدیث خیش مصمم باشی جوان دو قطعه سنگ را در خرجینش گذاشت و گفت بعد از این خود به تنهایی تصمیم خواهد گرفت فراموش نکن رمز و راز و زبان نشانه ها را خصوصا فراموش نکن که حدیث خیش را به پایان بری و پیش از آن فراموش نکن که جهان و آنچه در اوست جز یک حقیقت نیست با وجود این دوست دارم داستانی کوچک برای تعریف کنم بازرگانی پسرش را نزد عالم زمان خود فرستاد تا از او اسرار نیکبختی بیاموزد پسر جوان چهل روز تمام صحرای سوزان و بی آب و علفی را زیر پا گذاشت تا بالاخره بر قله کوهی مقابل یک کاخ بسیار زیبای قدیمی رسید. مردی که به جست و بود آنجا زندگی می کرد. پسر بازرگان به عوض برخورد با مردی زاهد وارد سالونی شد شبیه بازار مکاره. سخت در فعالیت. مردم در رفت آمد بودند. جماعتی در گوشهای به وراجی و پرحرفی مشغول بودند. ارکستر کوچکی نغمه های مطبوع و دلپسند می و میزی وجود داشت انباشته از بهترین و دلپذیرترین غذاهای آن منطقه از دنیا. مرد عالم با اشخاص مختلف سرگرم گفتگو بود. پسر جوان دو ساعت تمام منتظر ماند تا بالاخره نوبت به او رسید. سپس علت و انگیزه دیدارش را شهر داد. آن مرد با دقت به حرفهای او گوش کرد و گفت اکنون وقت ندارد اصرار نیکبختی را برایش بگوید. از او خواست در کاخ گردشی کند، دوری بزند و دو ساعت دیگر برای دیدارش به همین مکان برگردد. زمناً در حالی که قاشقی لبریز از روغن به جوان می‌داد، اضافه کرد. از شما خواهشی دارم دقت کنید در طول گردش خود در کاخ این قاشق را طوری بگیرید که روغنش نریزد مرد جوان شروع کرد به بالا و پایین رفتن از پله های کاخ در حالی که چشمانش بیوقفه به قاشق دوخته شده بود رأس دو ساعت به حضور بخرد بخردان رسید از اون سوال شد آیا قالی ایرانی را که در اتاق غذاخوری پهن شده دیده است؟ آیا باغی را که سرباغبان ده سال تمام برای به وجود آوردنش زحمت کشیده دیده است؟ آیا به پوستهای زیبایی که در کتاب بوده توجه کرده است؟ پسر جوان با حالتی درهم و آشفته اعتراف کرد که هیچ چیز را ندیده. چون تنها فکرش این بوده که قطرهای روغنی را که به او سپرده شده بود نریزد. مرد دانا گفت که اینطور بهتر است برگردی و زیبایی های دنیای مرا بشناسی. نمی شود به کسی اعتماد کنی تا زمانی که خانه ای را که در آن زندگی می کند نشناسی. پسر جوان، با آسودگی و اطمینان بیشتر قاشق را به دست گرفت و به گردش در کاخ پرداخت در حالی که در این گردش نسبت به همه چیز دقیق بود به تمام آثار هنری که به دیوار و سقف نصب شده بودند به باغها و کوه‌های اطرافش به لطافت گل‌ها به زرافتی که برای نصب آثار هنری به کار رفته بود و در مراجعت همه ی آنچه را که دیده بود با جزئیات کامل بیان کرد اما مرد که از او سوال کرد دو قطره روغنی که به تو سپرده بودم کجا هستند پسر جوان در حالی که به قاشق نگاه می کرد دریافت قطرات روغن را ریخته است و آن مرد وقتی متوجه آشفتگی پسر جوان شد مدتی در خود فرو رفت و دوباره گفت ک این طور و ادامه داد نکته جاست. تنها نصیحتی که برای تو دارم این است که سر نیکبختی حشیار بودن در وقت دیدن زیبایی های اقبا کننده جهان است بیان که قطری روغن درون قاشق از یاد برود جوان بدون اینکه سخنی بگوید، گوید مات و متحیر پیام پاچاه پیر را دریافت و داستان را فهمید. فهمید که چوپان جوان هم می تواند سفرها را دوست داشته باشد. اما هرگز نباید میشها را فراموش کند. پیرمرد نظری به جوان انداخت و دستهایش را به طرز قریبی روی سرش تکان داد. وانگاه گوسفندهایش را جمع کرد و رفت. در کمرکش شهرک تاریفا قلعه‌ای بود قدیمی که در گذشته دور مغربیها آن را ساخته بودند. با نشستن روی دیوارهای مرتفعش میتوان میدان شهر فروشنده دور گرد زورت بوداده و قسمتی از آفریقا را دید. ملکی صدق پاچاه سالیم آن روز روی باروهای قلع نشست. روی صورتش، وزش بادی را که باد خاوری نام داشت احساس کرد. میشها در کنار او آرام نمی گرفتند. ناراحت و آشفته بودند. همه این پریشانی ها ناشی از عوض شدن صاحبشان بود. با وجود اینکه تنها نیازشان خوردن و نوشیدن بود، ولی به چوپان هم عادت کرده بودند. ملکی صدق قایق کوچکی را دید که از بندر دور میشد؟ او چوپان جوان را دیگر نخواهد دید همانطور که ابراهیم را پس از پرداخت عشریه هرگز ندید ملک ها نباید آرزویی داشته باشند چون با حدیث خیش نیستند ولی ملک سالیم در عمق وجود خود برای جوان آرزوی موفقیت کرد اندیشید متأسفانه او به زودی نام مرا هم فراموش خواهد کرد باید آن را چند بار برایش تکرار میکردم تا وقتی از من سخن میگوید بتواند بگوید که او ملکی صدق پادشاه سالیم بود سپس کمی ها شفته از آنچه اندیشیده بود رو به آسمان کرد و گفت میدانم خدای من تو گفته ای که این است. خودپسندی انسانهای فناپذیر، اما ملکی پیر هم گاه نیازمند است که خود را با اعمالش راضی ببین. قهوه خانه همانند دیگر قهوه خانه هایی که در موقع عبور از کوچه های تنگ شهر دیده بود وارد شد و نشست مردم چپق بزرگی را پک می‌زدند و دست به دست می‌دادند. در فاصله چند ساعت دیده بود که مردان دست در دست یکدیگر گردش می کنند. که زنان همه اندام حتی صورت خود را پوشانیدند که معزنن به بالاترین نقطه مناره رفتند و از آن میگویند که همه مردم با شنیدن آن صوت در آن حوالی جمع شده زانو میزنند دست و آسمان برمیدارند گاه نجوا کنند گاه با صدای بلند با خود حرف میزنند و هر از گاهی هم پیشانی خود را به خاک میسایند. به خود گفت: عبادت متفاوت، عبادت اغیار، عبادت کافران در دوران کودکی عادت داشت، در کلیسای دهکده مجسمه سنجاک را سوار بر اسب سفید با شمشیر برهنه در حالی که جماعتی شبیه آنان را به زیر سم اسب خود داشت، تماشا کند. در نگاه کافران شرارت موج میزد و او خود را در میان آنان ناراحت و بسیار تنها احساس میکرد. ضمننا در شتابی که برای تدارک سفر بزرگ خود داشت جزئیاتی را فراموش کرده بود. مثل موردی کوچک و بی اهمیت که به خوبی می توانست او را برای مدت نسبتاً زیادی از گنجش دور کند. در این سرزمین، همه مردم به زبان عربی حرف می زدند به او نزدیک شد و او با انگشت نوشابه ای را که روی میز دیگری دیده بود نشانش داد چای بود، چای تلخ و او شراب را ترجیح می داد. اما مطمئنن وقت، وقت این گونه بهانه نبود بهتر است جز به گنج و نهوه به دست آوردن آن به چیز دیگری فکر نکند. از فروش گوسفندهایش مبلغ قابل توجهی پول در جیب داشت و میدانست که پول وسیلهیس رامیز و جادویی است. چرا که با پول هرگز کسی تنها نیست و تمامی مشکلات با کمک آن از بین میروند و در اندک زمان کار، چند روزه انجام می شود و او خودش را در پای اهرام خواهد دید به خود گفت پیرمردی با آن همه طلا تلاک روی سینهش برخ می زد احتیاجی نداشت برای به دست آوردن شش رأس از گوسفند دروغ بگوید پادشاه پیر از نشانه ها برایش گفته بود و او هم هنگام عبور از ترعه به نشانه ها فکر کرده بود بله خوب می دانست که اندرز او چه بود چرا که طی اقامتش در دهشت های اندلس عادت کرده بود برای مسیری که باید دنبال می کرد در زمین و آسمان نشانه های خاصی را تغییب کند و مفهوم آنها را بگیرد یاد گرفته بود که فلان پرنده از وجود ماری در آن حوالی خبر می دهد. یا اینکه فلان درخت نشان می دهد در چند کیلومتری آنجا آب وجود دارد این چیزها را میشها به او آموخته بودند به خود گفت اگر خداوند به این خوبی گوزفندها را هدایت می کند، به همان خوبی یک مرد را هم هدایت خواهد کرد با این فکر خود را راحت و مسمم احساس کرد و در این حال تعم چای به نظرش خیلی هم تلخ نیامد شنید که کسی با زبان اسپانیولی از او میپرسد. تو کیستی؟ آرامش فوقلاده ای را دوباره در خود احساس کرد و از او پرسید چطوره که تو اسپانیولی حرف میزنی؟ تازه وارد پسرکی بود کم و بیش همقد و هم سن و سال او که شبیه قربی ها لباس پوشیده بود ولی پوست صورتش نشان میداد که از اهالی آن شهر است جواب داد اینجا تقریبا همه مردم به زبان اسپانیولی حرف میزنن ما بیش از دو ساعت با اسپانیا فاصله نداریم. بنشین و به حساب من چیزی برای خودت سفارش بده. برای من هم بگو شراب بیاورند. از این چای بدم می آید. در این کشور شراب وجود ندارد. مذهب ما من اش کرده است. جوان به بررسی وضع خود پرداخت و اندیشید این جوان عرب به خوبی می تواند او را تا اهرام ببرد. حرفهای پیرمرد درباره در باری تناسبها و بهای هر چیز به یادش آمد. فکر کرد سهمی هم به او خواهد داد. گفت باید خود را به احرام برساند. نزدیک بود از گنج هم حرفی بزند ولی ترجیح داد فعلا سکوت کند. و ادامه داد اگر برایت امکان دارد مایلم تا آنجا همراهیم هم کنی. می توانم مبلغی به عنوان راهنما پرداخت کنم. به سرت زده که حتماً تا آنجا بروی ؟ قهوه چی را دید که در نزدیکی آنها به دقت مقالماتشان را گوش می کرد. حضور او کمی آزارش میداد اما راهنمایی پیدا کرده بود و مایل نبود از دستش بدهد. تازه وارد گفت: « از تمام صح را باید عبور کرد. برای این کار پول لازم است. قبل از هر چیز می خواهم بدانم که تو پول به اندازه کافی داری؟ جوان؟ سؤال او را بی دید، اما به حرف های پیرمرد اعتماد داشت. به او گفته بود، زمانی که با همه وجود خود حقیقتا آرزویی داشتی، کل کائنات به نحوی عمل می کند که تو بتوانی به آرزوی خود برسیم. بنابراین، پولش را از جیب درآورد و به همراه جدیدش نشان داد. قهوهچی بار دیگر با آنها نزدیک شد و باز هم نگاهشان کرد. آن دو مرد چند کلمه به زبان عربی با هم حرف زدند. قهوچی سخت عصبانی به نظر میآمد. به سرک گفت: "برویم. او نمیخواهد که ما اینجا باشیم." جوان از اینکه قائل را ختم شده میدید احساس راحتی و آسودگی کرد. بلند شد که پول چای را بدهد ولی قهوهچی بازوان او را گرفت و تند و سریع شروع کرد به گفتن مطلبی که برایش نامفهوم بود. جوان با وجود ورزیدگی از درگیری در سرزمینی ناشنا پرهیز داشت. بنابراین دوست جدیدش قهوچی را به گوشه پرت کرد و او را به بیرون از قهوخانه برد و گفت او پولت را میخواست. تنجه مانند بقیه آفریقا نیست. اینجا ما در بندر هستیم و همیشه در بندرها به فراوانی دوست وجود دارد. جوان از دوست جدیدش که در شرایطی بحرانی به کمکش آمده بود، فوق‌العاده راضی شد. پولش را از جیب درآورد و شمرد. و آن دیگری در حالی که پول را از دست او می‌گرفت، گفت: "می‌توانیم فردا به پای احرام برسیم، ولی باید دو شتر بخریم." و به اتفاق هم از کوچه های تنگ و تاریک تنجه گذشتند و نهایتا به میدان بزرگی رسیدند که بازار روز بود. در هر گوش و کنار میدان بساطی گسترده، دکهای به پاداشته و ای آراسته شده بود. همه نوع جنسی در بازار عرضه شده بود. از وسایل کشاورزی و کاری گرفته تا داس و عرب و قالی و انواع چپق و غیره. صاحبان بساط با صدای بلند برای جنس خود تبلیغ می کردند و دک داران و قرفیه ها هم در این مورد کوتاهی نمی کردند. هم همه ای بود، هزاران نفر در آنجا گرده هم در رفت آمد بودند. می خریدند، می و سر قیمت جنس چانه می زدند. جوان فراموش نمی کرد که همه داراییش در دست دوست جدیدش است. بنابراین، زیر چشمی او را می پایید. فکر کرد که پولش را از او بگیرد ولی به خودش گفت این کار به دور از نزاکت است او به ادب و نزاکت فکر می کرد در حالی که عرف و عادت این سرزمین بندری را نمی شناخت. خود را از او تنومما و من تر, تر میدید به خود گفت: فقط کافیست مراقبش باشم ناگهان در بین این جماعت به هم فشرده چشمانش روی زیبا ترین شمشیری افتاد که هرگز نظیر آن را ندیده بود. دستش زیاه و قلاف آن از نقره بود و سنگ مختلف قیمتی روی آن نشانده بودند. به خودش قول داد که در مراجعت از مصر این شمشیر را بخرد. به همراهش گفت از فروشنده قیمت آن را بپرس. اما فهمید، فهمید وقتی به تماشای شمشیر مشغول بوده، تنها دو ثانیه بی کرده است. ناگهان قفسه سیناش تنگ و تنگ تر شد، قلبش گرفت، در حالی که خوب میدانست آنچه آنچرا که منتظرش بوده اتفاق افتاده است. وحشت داشت به دور و بر خود نگاه کند. لحظه ای به شمشیر خیره شد، به خود تلقین کرد که با شهامت باشد. آنگاه برگشت و به اطرافش نگریست پیرامون او همه چیز بود بازار روز، بسات ها، و قرفه‌ها و همه و همه انباشته از جنس مختلف صنعتی، کشاورزی، خوراکی و عطر قضاهای منطقهی در سینی بزرگ مسی و مردم مردمی که در آنجا گرد آمده بودند صدها نفر، هزاران نفر که فریاد می کردند، می, خریدند، می فروختند، بر سر قیمت جنسی چانه می زدند، حتی مردانی که دست در دست یکدیگر داشتند یا زنانی که صورتشان را پوشانیده بودند. پیرامون او همه چیز بود. اما هیچ کجا، هیچ کجا حتی شبه همراهشم دیده نمی شد. هنوز دلش میخواست و سعی میکرد باور کند که اتفاقی همدیگر را گم کردند. تصمیم گرفت در میدان منتظر کسی که رفته بماند به امید اینکه شاید برگردد. لحظه بعد شخصی از یکی از همان مناره‌های های معروف بالا رفت و شروع کرد به اذان گفتن. همه مردمی که در آنجا بودند زانو زدند، پیشانی خود را به خاک ساییدند، با صدای بلند عبادت کردند سپس فروشندگان همانند اجتماع مرچگان کارگر بساتشان را جمع کردند و رفتند جوان مدت ها به آن خیره ماند تا پشت ساختمان های سفیدی که میدان را احاطه کرده بودند پنهان شد در خودش فرو رفت فکر کرد وقتی همین خورشید صبح امروز در آنجا طلوع کرد او در سرزمینی دیگر و در ای دیگر بود چوپانی بود با شهست گوسفند که با دختری قرار دیدار داشت صبح هنگامی که دشت و صحرا را می پیمود همه چیز مطابق میلش بود از همه آن چه باید اتفاق میافتاد آگاهی داشت با این وصف حالا که خورشید غروب کرد خود را در کشوری متفاوت و قریب در سرزمینی عجیب میدید که حتی قادر نیست زبان مردمش را بفهمد دیگر چوپان نیست هیچ چیز از خودش ندارد، حتی مختصر پولی که بتواند روی پایش بایستد و همه چیز را از نو شروع کند. به خود گفت، همه این اتفاقات تنها در فاصله یک طلوع و قروب خورشید رخ داد. دلش به حال خودش سوخت، در حالی که فکر می کرد گاهی وقتها در فاصله چشم به هم زدنی، رویدادهای خارج از توان عینی و ذهنی روی میدهند که انسان به هیچ وجه قادر به درک و پیگیری آنها نیست. شرم داشت از اینکه گریه کند. هرگز در مقابل گوسفندهای خود گریه نکرده بود، اما میدان بازار روز خالی بود و او دور از گوسفندها، دور از سرزمینش گریه کرد. گریه کرد که خدا با او عادل نبوده و آدمی را که تصوراتش را باور داشته و در رویاهایش به جست و جوی او بوده چون این پاداش داده است. وقتی با گوسفندهایم بودم خوشحال بودم. خوشحالیم را با اطرافیانم قسمت می کردم و وقتی مردم می دیدند که من می آیم، از من به گرمی استقبال می کردند. مردم با من شاد بودند و من با آنها خوش حالا غمگین و بدبخت هستم. چه خاکی به سرم بریزم؟ با قم خود بسوزم و بسازم یا ترش رو و تلختر باشم و به هیچ کس و هیچ چیز اعتماد نکنم؟ چرا که به یک نفر اعتماد کردم و او به من خیانت کرد؟ و خیانت او گنج را از من دور ساخت. از آدم هایی که گنج پیدا کردند هم متنفرم. من گنج خود را پیدا نکردم. به خود گفت از باید همواره در جستجوی راهی باشم که بهتر و بیشتر خود را حفظ کنم چون ضعیفتر از آن هستم که بخواهم یا بتوانم جلوی مردم و حوادث ناشی از آنها را بگیرم خورجینش را باز کرد تا ببیند از ای که در قایق خورده تکی باقی مانده است یا نه ولی جز کتاب پرحجم، بالا و دو قطعه سنگی که پیرمرد به او داده بود چیز دیگری پیدا نکرد. با دیدن سنگ ها گرفت و آرامش بیشتری در خود احساس کرد. به ازای دو قطعه سنگ پربه که از روی جلیغهی تمام تلاکنده شده بودند، شش رأس گوسفند داده بود. اکنون آنها را میتواند بفروشد و خرج برگشت خود را تهیه کند. در حالی که سنگ ها را از خرجین در می آورد که در جیبش بگذارد، اندیشید، اعتماد بی حساب آور است و بی شناخت با آب زدن هم قماور پس بهتر است پس از این هوش و حواسم جمع باشد تنها حرف راست آن پسرک این بود که اینجا بندر است و همیشه در بندرها به فراوانی دوست وجود دارد جوان حالا میفهمید هر و جوش قهوهچی برایش شکل می و حالات و کلمات نامفهوم او برایش با معنی میشد قهوهچی در مانده میکوشید به او بفهماند که نباید به این مردک اعتماد کرد من شبیه دیگر مردمان هستم گردش دنیا و حوادث آن را آنطور که دلم میخواهد و آرزو میکنم می بینم نه آنطور که حقیقتا اتفاق افتاده و نتیجه میدهند به ارزیابی سنگ هایی به آرامی روی هر یک از آنها دست کشید سطح صاف آنها را گرم و لغزنده دید از لمس کردن و دست کشیدن روی آنها تسکین پیدا کرد آنها گنجش بودند خاطره پیرمرد در ذهنش جان گرفت و حرفهای او را به یاد آورد که گفته بود زمانی که به راستی با همه وجودت آرزویی داشته باشی کائنات به نحوی عمل میکند که تو بتوانی به آرزویت برسی دلش میخواست بفهمد که آن گفتار تا چه اندازه میتواند درست باشد خودش را در میدان، در بازاری بدون جنبنده میدید نه دیناری در جیب داشت، نه گوسفندهایی که برای نگهداریشان در شب دلشوره داشته باشد اما سنگ ها به خوبی نشان میدادند که او با یک پادشاه برخورد داشته پادشاهی که افسانه زندگی او را می شناخت و میدانست که او چگونه از تفنگ پدر خود استفاده کرده مهمترین که از اولین تجربه جنسی او هم با خبر بود سنگ ها برای پیشگویی هستند اسمشان اوریمو تو میمست سنگ ها را در جایشان داخل خورجین گذاشت و تصمیم گرفت با آنها آزمایشی کند پیرمرد به او گفته بود از آنها باید سوالی کرد که روشن و خالی از ابهام باشد چون اگر انسان خودش نداند که چه میخواهد معلوم است که سنگ ها نمیتوانند خوب عمل کنند این جوان پرسید دعای خیر پیرمرد هنوز همراه او هست یا نه؟ یکی از سنگ ها را بیرون آورد. جواب آری بود. سوال دیگری مطرح کرد. آیا خواهم توانست گنج خود را پیدا کنم؟ دست کرد داخل خورجین که یکی از آنها را بردارد. آن هم وقتی که هر دو سنگ از سوراخی که در قسمت پارچه‌ای خورجین به وجود آمده بود لیز خورده بود. بیرون افتاده بودند هیچ وقت تصور نمیکرد که خرجینش هم پاره شده باشد خم شد که اوریم و تمیم را جمع کند و داخل خرجینش بگذارد اما با دیدن آنها روی زمین به یاد جمله دیگر پادشاه پیر افتاد که گفته بود یاد بگیر که نشانه ها را ببینی و دنبال کنی نشانه و شروع کرد به خندیدن سپس هر دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خرجینش گذاشت. حال و حوصله نداشت پارگی خرجینش را بدوزد و هر لحظه امکان داشت سنگ ها از سوراخ خرجین بیفتند و گم شوند. فهمیده بود در دنیا موارد و مسائلی وجود دارند که در آنها نباید کنکاش کرد و در سیر عادی سرنوشت هم نباید کنجکاوی نمود. به خود گفت قول دادم که شخصا تصمیم خود را بگیرم اما سنگ ها گفته بودند که پیرمرد همیشه در کنارش است و این جواب به او اعتماد به نفس داده بود بازار روز را دوباره خالی از جنبنده دید ولی این بار مثل گذشته خود را معیوس و ناامید حس نکرد آن سرزمین دیگر برایش بیگانه نبود دنیایی بود تازه و جدید، با این همه اعتقادش دقیقا این بود که سرزمین های جدید و تازه را کشف کند. حتی اگر سرنوشت نخواهد، او به اهرام برسد. وانگهی تا اینجا هم که پیش آمده بود، به شناختی فراتر از دیگر دست یافته بود. آه، اگر میدانستند در مسافتی کمتر از دو ساعت با قایق این همه چیزهای جالب و، مختلف وجود دارد دنیای جدید پیش چشمانش به شکل بازار روزی خالی از جنبنده جلوگر شد بازاری که همین چند لحظه قبل آن را لبریز از زندگی یافته بود آن را هرگز از یاد نخواهد برد شمشیر را به یاد آورد قیمت زیادی برای یک لحظه قفلت پرداخته بود ولی قبول داشت که تا کنون هیچ شمشیری به زیبایی آن ندیده است ناگهان ذهنش جرقی زد و احساسی در او بیدار شد میتواند دنیا را با چشم مرد بدبخت و مفلوکی نگاه کند که قربانی راهزنی شده یا با چشم ماجراجویی در جستجوی گنج پیش از اینکه هوا کاملا تاریک شود و از شدت فرسودگی به خواب رود به خود گفت ماجراجویی هستم در جستجوی و حالی که حس می‌کرد شخصی شانهش را گرفته بود تکان می‌دهد از خواب پرید شب را زیر سقف آسمان پر در فضای باز میدانی که دوباره حیات خود را از سر می‌گرفت به صبح آورد نگاهش به جستجوی گوسفند ها رفت ولی به یاد آورد همکنون در سرزمین دیگری است به جای اینکه به غم بنشیند خود را سبکبال بال و, و آسوده خیال یافت گوسفندی نداشت تا به دنبال آب و الف باشد در عوض می توانست همه همه خود را در راه پیدا کردن گنج بگذارد دیناری در جیب نداشت ولی زندگی را با همه فراز و فرودش دوست داشت چون از شب قبل راه خود را انتخاب کرده و تصمیم گرفته بود ماجراجویی در جستجوی گنج باشد شبیه قهرمانهای کتابهایی که عادت به خواندنشان داشت. در میدانی که دوباره روح میگرفت و زنده میشد، بی هیچ عجله یا شتابی به تعنی به گردش پرداخت. فروشندگان در تلاش بودند تا قرفه و دکههایشان را مهیا سازند و او به مردی که فروشنده شیرینی بود. کمک کرد تا بساتش را بچیند. روی آن مرد لبخندی می متفاوت از دیگران. لبریز از شعف و شادمانی گشاد رو به زندگانی آماده برای مقابله با یک روز کامل کاری. لبخند آن مرد او را به یاد پادشاه انداخت پادشاه اسرارآمیزی که می شناخت. حرکات و رفتار آن مرد درجه علاقه و وابستگی او را به حرفش نشان میداد جوان به او دقیق شد و فکر کرد فروشنده به کارش دلبسته است و این کار را نه به جهت سفر کردن انتخاب کرده و نه به خاطر ازدواج با دختر بازرگان او شیرینی سازی و شیرینی فروشی را صرفا به خاطر نفس عمل و نفس کار دوست دارد به نظرش رسید که نوری بر تاریک خانه ذهنش تابید. میدید که میتواند همانند پیرمرد از حرکات و رفتار عینی به روحیات و افکار ذهنی اشخاص دست یابد و زمیر مردم را بخواند و با یک نگاه بفهمد که شخص در چه فاصله از حدیث خیش است. با خود گفت: تا این وقت هرکس چنین نوری بر من نتابیده بود و چنین نیرویی را در خود ندیده بودم، در صورتی که اکنون قادرم به آسانی افکار نهانی و تمایلات دیگران را بخوانم و بفهمم. وقتی کار پهن کردن بساط را تمام کردند، آن مرد اولین شیرینی را که پخته بود به او داد. با لذت تمام آن را خورد، تشکر کرد و راه خود را گرفت و رفت. با آنکه که کم و بیش از آنجا دور شده بود، فکری در ذهنش جرقه زد و این اکاس آن را می دید. بساط فروشنده به دست دو نفر استوار شده بود که یکی عرب زبان بود و دیگری به زبان اسپانیولی تکلم می کرد. با وجود این، این هر دو نفر کاملا و به راحتی همدیگر را درک می کردند. به خود گفت، بیان دیگری وجود دارد که فراتر از کلمات است. این تجربه را با گوسفندهایم داشتم و حالا هم با انسانها تجربه اش می کنم. خود را می دید که چیزهای مختلف و تازه فرا میگیرد و افقهای جدیدی در شعور و ذهنش پیدا می شبند. در اندیشه بود همه ی آن کنون در مسیر زندگی دیدم و تجربه کردم، همه و همه موضوعات جدید و تازهی هستند که اهمیتی برایشان قائل نبوده. به خود گفت، اگر بتوانم رمز و راز بیانی را که فراتر از کلام است کشف کنم، قطعا در کشف اسرار کائنات موفق خواهم شد. پیرمرد گفته بود، جهان و آنچه در اوست به جز یک حقیقت نیست، تصمیم گرفت با آرامش کامل در کوچه های تنگ و تاریک تنجه گردش کند و با شکیبایی و تحمل و تعمل به دنبال نشانه ها باشد. البته میدانست که تحمل اولین فضیلتی است که چوپان ها فرامی گیرند. بار دیگر متوجه شد همان درس هایی را که در زندگی شبانی خود از گوسفند یاد گرفته، باید در این دنیای عجیب و اسرارآمیز هم به برد مگر نه اینکه پیرمرد گفته بود جهان و آنچه در اوست به جز یک حقیقت نیست به پا می‌خیزد و بلور فروش به روال معمول بار سنگین استراب و نگرانی را روی خود حس می کند سی سال می‌شد که در آن مغازه به سر می برد مغازه در انتهای کوچه شیبدار که به ندرت یک مشتری از آن میگذشت. حالا برایش خیلی دیر بود که کار را عوض کند چون همه آنچه چه در طول زندگی یاد گرفته بود خرید و فروش ظروف کریستال بود و بس زمانی مغازش شهرت فراوانی داشت بازرگانان عرب زمینشناسان انگلیسی و فرانسوی و سربازان آلمانی که غالبا پولدار بودند او را می شناختند. فکر میکرد مرد ثروتمندی خواهد شد و روزی هم زنهای زیبایی در کنار خود خواهد داشت حتی در دوران پیری و فرسودگی اما بازار خرید و فروش ظروف کریستال خراب شده بود و ادامه این تجارت نوعی حادث جویی به شمار می رفت. زمان آرام و به گذشت و شهر هم در پی آن تغییر کرد شهر سوتا آبادتر از تنجه شد این تجارت مسیر دیگری گرفت طولی نکشید که همسایه کسب و کار خود را به نقاط دیگر بردند و در مکانی جدید مستقر شدند و فقط چند مغازه در آن راسته باقی ماند. برای چند مغازه فرسوده و فقیر هم هیچ کس به خود زحمت بالا رفتن از سربالایی آن کوچه را نمیداد. اما بلور فروش چاره ای نداشت. سی سال از عمرش را در این راه از دست داده بود. اکنون بسی دیر بود که در مسیر جدیدی گام بگذارد در آن کوچه رفت آمد بسیار کم بود ولی او هر روز به عادت همیشگی روی چهار پایی در کنار درگاه مغازش می نشست و وقت خود را به تماشای آمد و شده مردم می گذارند. هنوز چند دقیقه به ظهر مانده بود جوان قریبی که مثل مردم آن سوی ترعه لباس پوشیده بود جلوی مغازه ایستاد چشمان پر تجربه فروشنده کریستال با نیم نگاهی به او فهمید که جوان قریب دیناری در جیب ندارد با وجود این تصمیم گرفت به داخل مغازه رود و پشت پیشخان منتظر بماند تا جوان از آنجا دور شود. در مغازه نوشتهی بود حاکی از آن که صاحبش به زبانهای مختلف حرف میزند. جوان مردی را پشت پیش خاندید به او نزدیک شد و گفت اگر بخواهید می توانم این گلدانها را پاک کنم در وضعیتی که هستند هیچکس آنها را نمی خرد. فروشنده بدون اینکه چیزی بگوید او را نگاه کرد در عوض کمی پول به من بدهید که بتوانم غذا بخورم موافقید؟ مرد ساکت ماند و او فهمید که باید دست به کار شود بالا پوشی را که در خورجین داشت بیرون آورد و شروع کرد به تمیز کردن گلدان ها. بیشتر از نیم ساعت طول نکشید که همه گلدان های کریستال داخل ویترین را تمیز کرد در همین زمان کم دو مشتری وارد مغازه شدند و بسیاری از آنها را خریدند. وقتی کار را تمام کرد از صاحب مغازه تقاضا کرد به او چیزی بدهد که بخورد. فروشنده کریستال در جواب گفت: "برویم نهار بخوریم." نوشته ای را به در مغازه آویخت و به اتفاق به رستوران کوچکی رفتند که در انتهای کوچه قرار داشت. وقتی پشت تنها میز موجود در آن نشستند، فروشنده کریستال با خنده گفت: برای لغم اینان، چرا زحمت تمیز کردن هر چیز را به خود می دهی؟ دستورات قرآنی قاطعانه حکم می کند که به گرسنه تعام بده. جوان پرسید، اگر اینطور است، چرا گذاشتی این کار را بکنم؟ برای اینکه ظروف کریستال فوقلاده کثیف و خاک گرفته بودند، وانگهی تو هم مثل من لازم است که هر از گاه ذهن خود را از افکار بد و بیراه پاک کنیم موقعی که خوردن غذا به آخر رسید بلور فروش رو کرد به جوان و گفت ما یلم که در مغازه من کار کنیم امروز وقتی مشغول تمیز کردن ظروف بودی دو مشتری وارد شدند و مقداری کریستال خریدند این نشانه را به فال نیک گرفتم چوبان جوان فکر کرد مردم خیلی زیاد درباره نشانه ها حرف میزنند ولی دقیقا نمیدانند از چه صحبت می کنند مثل من که هیچ وقت دقت نکرده بودم سالها با گوسوندهایم با بیانی بدون کلام حرف می زنم بلور فروش سالش را با تأکید بیشتر تکرار کرد میل داری برای من کار کنی؟ جوان جواب داد می توانم برای بقیه روز کار کنم. همه ی ظروف را تا صبح تمیز خواهم کرد. در عوض به پول احتیاج دارم که فردا در مصر باشم. ناگهان مرد شروع کرد به خندیدن و گفت اگر یک سال تمام همه ی کریستال هایم را تمیز کنی حتی اگر کمیسیون خوبی هم از فروش هر یک از آنها آیدت شود برای رفتن به مصر لازم است که مبلغی هم قرض کنی. از تنجه تا اهرام هزاران کیلومتر راه از صحراهای خشک و بیآب و علف است وقتی او حرف میزد جوان به تیرکهای سقف رستوران نگاه میکرد و هر کلمه او چون تیرکی بر سرش کوفته میشد خود را میدید که از درون میپاشد چشمانش سیاهی می رود و جایی را نمی بیند. چنان سکوتی سنگین در آنجا سایه سایفکند که گویی شهر در خواب و خاموشی فرو رفته است. دیگر نه میدانی بود نه بازاری. گفتگوی فروشندگان به آخر رسیده بود و مردانی که بالای مناره ها می رفتند تا از آن بگویند دیده نمی شدند. حتی شمشیر زیبایی که روی آن سنگ های قیمتی نشانده بودند وجود نداشت. عواصا ماجراها پادشاهان پیر و حدیث های خیش همه و همه تمام شدند نه اهرامی بود و نه گنجی وقتی جوان در خود فرو رفته و ساکت بود گویی جهان و هر آنچه در اوست همه ساکت و خاموش بودند نه اندوهی داشت نه رنجی و نه خود را فریب خورده می‌دید نگاه او در خلع از در کوچک رستوران گذشت و در این لحظه از زندگی آرزو کرد بمیرد و برای همیشه به همه چیز خاتمه دهد. فروشنده یک که خورده با, با تعجب به او نگریست. جوان را در قمی ناشناخته دید. گویی خنده ها و شادی ها پرواز کردند و دنیا هم به غم نشسته است. گفت پسرم می توانم پولی به تو بدهم تا به کشورت برگردیم. جوان پس از سکوتی نسبتا طولانی بلند شد، لباسش را مرتب کرد، خورجینش را به دست گرفت و گفت، برایت کار خواهم کرد. و به دنبال سکوت ممتد دیگری اضافه کرد، برای خریدن چند گوسفند به مقداری پول نیاز دارم. ماهی میشد که جوان نزد بلورفروش فروش کار میکرد. کاری هم نبود که راضیش کند فروشنده تمام روز از پشت پیشخان خود نق میزد و مدام سفارش میکرد. کرد به اشیاء باشد که مبادا بشکنند پیرمت با وجود اینکه خود را نقنقون نشان میداد، ولی مردی وارسته با با انصاف بود بنابراین جوان در مغازه ماند و به کارش ادامه داد علاوه بر دست ثابت، کمیسیون خوبی هم از فروش هر قطعه از ظروف کریستال آیدش می شود. حتی توانسته بود مقداری پول هم صرف جویی و ذخیره کند. آن روز حساب کرد که اگر اتفاقی نیفتد و شرایط تغییر نکند، یک سال کامل زمان لازم دارد تا بتواند چند رأس گوسفند بخرد. بر بابش گفت، میل دارم تبخچهی برای کریستال ها درست کنم. با آن خواهیم توانست بیرون مغازه نفسهی بزنیم که از پایین سربالایی توجه آبران را جلب کند. فروشنده پاسخ داد. تبقچه؟ هرگز چون این فکری نکرده بودم. مردم در حال عبور به آن میخورند و ظرفهای کریستال میشکنند. وقتی با گوسفندهایم از دشت ها عبور می کردم، به سادگی ممکن بود آنها قربانی مارگزیدگی شوند و این خطر خود جزئی از زندگی است. فروشنده خود را با مشتری علاقمند به خرید سه گلدان کریستال مشغول کرد. اکنون بهتر از همیشه فروش می گویی زمان به عقب برگشته بود. به دوره ای که این کوچه یکی از پر ترین محلات تنجه بود. وقتی مشتری رفت، رو کرد به شاگردش و گفت بیش از پیش مشتری وجود دارد. آنچه آید من می شود، به من فرصت می دهد بهتر زندگی کنم و به تو هم امکان خواهد داد در آینده نزدیک گوسفندهایت را بخریم. بیش از این، از زندگی چه توقعی داریم؟ جوان گفت، نشانه ها، باید دنبال نشانه ها باشیم. بلا فاصله از گفتن این حرف پشیمان شد چون بلورفروش هیچگاه فرصت ملاقات با یک پادشاه نصیبش نشده بود و از حرفهای او هم چیزی نمیفهمید پادشاه گفته بود به شرایط موجود میگویند شروع مناسب یا شانس مبتدیان چون زندگی میخواهد که تو با حدیث خیش زندگی کنی با این همه فروشنده فهمید شاگردش از چه حرف می زند. حضور او خود یک نشانه بود، علامتی که در آخر هر روز استفاده خوبی آیدش میکرد. از این بابت راضی بود و راضی تر میشد وقتی به یاد میآورد که در چه شرایطی این جوان غریب را به کار گرفته. موقع استخدامش تصور میکرد که درآمد مغازه زیاد نخواهد شد. بنابراین، قول کمیسیون نسبتاً بالایی به او داده بود حالا که آیدی جوان را میدید اغلش به او می میگفت تا چند وقت دیگر پسرک به سوی گوسفندهایش خواهد رفت برای اینکه گفتگو درباره طبخ را عوض کند پرسید چرا میخواستی به دیدن اهرام بروی پسرک از خوابش چیزی نگفت جواب داد درباره آنها زیاد چنیدم اکنون گنج برایش خاطره ای بود و سعی میکرد فکرش رو هم نکند. فروشنده گفت، در اینجا کسی را نمی شناسم که بخواهد تنها به منظور دیدن اهرام از زهرا بگذارد. مگر چیزی بجز تبهی از قلو سنگ و سنگ ریزه است. تو میتوانی به همان خوبی، هرمی در باقچه خود بسازی. جوان، در حالی که مشتری دیگری را که وارد مغازه شده بود راه میانداخت، بربابش بر گفت شما هرگز رؤیای سفر نداشته اید؟ پس این فردا آن مرد دوباره موضوع تبخچه را مطرح کرد و با شاگرد جوان به گفتگو نشست گفت زیاد از تغییرات خوشم نمی آید نه تو نه من مثل حسن که نیستیم او تاجری ثروتمند است. اگر با خرید یک جنس اشتباهی بکند، خیلی به او تحمیل نمی شود و زیاد هم صدمه نمی بیند، در حالی که ما باید سنگینی اشتباه خود را تحمل کنیم. جوان فکر کرد، این یک واقعیت است. فروشنده سوال کرد، چرا میل داری این طبقچه را بسازی؟ دلم میخواهد هرچه زودتر به سوی گوزفندهایم برگردم، وانگهی، وقتی شانس در کنار ماست باید از آن استفاده کنیم همانطور که شانس به ما کمک میکند ما هم باید وسایل لازم را برای آن فراهم آوریم این همان چیزی است که به آن شروع مناسب میگویند یا به عبارت بهتر شانس مبتدیان پیرمرد فروشنده چند لحظه بدون اینکه سخنی بگوید مکس کرد سپس گفت پیامبر قرآن را به ما داد و رعایت پنج اصل را در طول زندگی برایمان واجب دانست. مهمترین آنها این است که خدایی نیست بجز خدای یگانه و واجبات دیگر عبارتند از نماز گذاردن پنج بار در روز، روز گرفتن در ماه رمزان، دستگیری از فقرا و مستمندان و ساکت شد. او مردی با احساس و خوش بود. اگر وقتی خود را مقید و محتاط نشان میداد برای این بود که سعی میکرد زندگیش را در چارچوب قوانین اسلام و منطبق با آیین آن نگه دارد. آدم دینداری بود و دیندار واقعی به خود فشار میآورد و هر باری را بر خود هموار می کند، ولی آزاری به کسی نمیرساند. جوان پرسید: پنجمین رکن واجبات کدام است؟ فروشنده در جواب گفت دو روز است از من میپرسی که هرگز رؤیای سفر نداشتم چرا؟ پنجمین اصل واجب برای هر مسلمان خوبی این است که سفری انجام دهد ما حداقل یک بار در طول عمر خود باید به مکه برویم مکه خیلی دورتر از اهرام است وقتی خیلی جوان بودم پول کمی داشتم. آن را به کار گرفتم و این کاسبی را راه انداختم. امیدوار بودم که روزی غنی شوم و به زیارت خانه خدا بروم. بالاخره کسب و کارم گل کرد و پول خوبی هم به دست آوردم، ولی نمیتوانستم به کسی اعتماد کنم و مغازه را به او بسپارم. این کار به مراقبت مستمر نیاز دارد و کریستال هم ظریف و شکننده است در تمام این مدت مشتریانم گروه گروه راه مکه را پیش گرفتند و رفتند در بین آنها همه نوع آدمی بود زائرانی ثروتمند که همراه خود کاروانی از خدمه و شترهای فراوان راه انداخته بودند و کسانی تقریبا تنگده است که حتی کمتر از من پول داشتند همه خوشحال رفتند و برگشتند و جلوی در خانه خود هجله زدند که نشان بدهند از حج برگشتند. یکی از زائران پین دوزی بود که کفش های این و آن را تعمیر میکرد. به من گفت برای رفتن به مکه یک سال تمام در صحرا راه رفتم ولی خسته نشدم. برعکس اینجا در تنجه وقتی برای خریدن مقداری چرم از خانه خود فقط چند قدم دور می شوم احساس خستگی و کوفتگی می کنم. جوان از او پرسید: حالا چرا به مکه نمیروی؟ برای اینکه مکه انگیزه ای است که بتوانم زندگی کنم. با آن نیرو می گیرم تا روزهای یک نباخت و بی‌انگیزه را تاپ بیاورم یا مراقب ظروفی باشم که روی طبقات چیده شده و شام و نهار خود را هم در آن رستوران محقر و کوچک بخورم می ترسم اگر به آرزوی خود برسم پس از آن دلیلی برای ادامه زندگی نداشته باشم تنها آرزوی تو گوسفند و اهرام است مثل من که نیستی تو می خواهی به رؤیاهایت برسی و من می خواهم مکه را در رویای خود داشته باشم تا کنون هزاران بار تصور کردم که از صحرا گذشتم و در میدان آنجایی که حجرالاسود قرار دارد هستم قبل از دست کشیدم روی زریح آن هفت بار به دورش گشتم حتی آنهایی را که کنار یا جلوی من بودند می دیدم. با وجود این میترسم که تصورات دست و پاگیرم چیزی جز یک توهم بزرگ نباشد بنابراین ترجیح میدهم همچنان با آرزوی خود بسر برم آن روز فروش به جوان اجازه داد تبخچه را بسازد هرکس در پی رؤیایی است و رؤیاها شبیه یکدیگر نیستند دو ماه دیگر گذشت، تبخچه از پایین کوچه دیده می و مشتریان بیشماری را به کریستال فروشی میکشند. جوان با یک حساب سرنگشتی به خود گفت شش ماه دیگر که کار کنم خواهم توانست به اسپانیا برگردم و شست گوسفند حتی بیشتر بخرم. در کمتر از دو سال، گله خود را دو برابر خواهد کرد و از آنجا که موفق شده بود زبان عربی را یاد بگیرد، خواهد توانست با اعراب وارد مذاکره و معامله شود. بعد از آن صبح کذایی، دیگر موردی پیش نیامد تا از اوریم و استفاده کند. مصر برایش رؤیا شده بود و همان مقدار دور بود که مکه برای فروشنده کریستال. با این وصف اکنون از کارش راضی بود و به روزی فکر میکرد که پیروزمندانه در تاریفا پیاده میشد. پادشاه پیر به او گفته بود همیشه یاد داشته باش که خواستن از دانستن جدا نیست پس باید بدانی که چه میخواهی. جوان میدانست چه میخواهد و هدفش چیست. میگفت گنج او شاید همین فرصت بود فرصتی که به این سرزمین بیاید، در دام یک دزد بیفتد و همه دارایی خود را از دست بدهد ولی در اندک زمانی بدون اینکه دیناری هزینه کند تعداد گوسفندهایش دو برابر و حتی بیشتر شوند از سرنوشت خود راضی بود در این مدت چیزهای مهم فراوانی فرا گرفته بود تجارت ظروف کریستال را می شناخت و کم و بیش به راز بیان بدون کلام دست یافته بود و زبان نشانه ها را هم میفهمید. بعد از ظهره یک روز گرم مردی را بالای کوچه شیب داردید که سربالای دشوار را طی کرده بود و خسته و نفسزنان و خیس از عرق در جستجوی مکان مناسبی بود تا چیزی بنوشد و از خستگی وارهد جوان یک نشانه دید به دنبال اربابش رفت تا با او مذاکره کند و موضوع تازه ایران را مطرح نماید به او گفت ما باید با آنهایی که سربالایی دشوار کوچه را می کنند و برای خرید به مغازه می چای تعارف کنیم فروشنده پاسخ داد در این حول و حش قهوه فراوان است می توان در آنها چای نوشید درست است ولی ما میتوانیم چای را در استکانهای کریستال به آنها بدهیم. مردم از این نوآوری خوششان می آید. برای چای ارزش بیشتری قائل می شوند و علاق خواهند شد که از ما استکانهای کریستال بخرند. زیرا آنچه مردان را بیشتر فریفته و جذب می کند زیبایی است. فروشنده حرفهای شاگردش را شنید و جوابی نداد. اما طرفهای عصر، بعد از انجام عبادت و بستن مغازه کنار پیاده رو نشست و از جوان خواست تا با او قلیان بکشد. از او پرسید دنبال چه میدویم؟ گفته بودم احتیاج دارم گسفند را دوباره بخرم و به همین خاطر پول لازم دارم. پیرمرد زغال های گلنداخته را با دقت روی تاج قلیان چید. پک عمیقی زد و حرفش را ادامه داد. سی سال است این مغازه را دارم. در این مدت همه زیر و بم کار را یاد گرفتم. با یک نگاه یا یک بار لمس کردن به خوبی جنس و ارزش کریستال را تشخیص می دهم. عمر خود را روی آن گذاشتم و با این تجارت آنطور که باید آشنا شدم. حالا دیگر به مغازه به اندازه با حجم آن و مشتریانش اونس گرفته و عادت کردم. اگر تو بخواهی به مشتریان چای در استکانهای کریستال تعارف کنی، شکی نیست که کار رونق میگیرد ولی زندگی من تغییر خواهد کرد به نظرت بهتر نخواهد شد نه چرا که به شرایط فعلی آنطور که هست دل ام و حرکت زندگی خود را با وضعیت موجود هماهنگ کردم. قبل از آمدنت فکر می کردم که همه عمر خود را برعکس دوستان و همسایگان در یک مکان تلف کردم. آنها رفتند، جا عوض کردند و به کسب و کار دیگری رو آوردند و زندگی پر رونق و راحتی به هم زدند. این فکر آزارم می داد و روحم را آزرده می کردم. اینک با تغییراتی که پیش آمد می بینم مغازه همان مغازه است. شکل و اندازه و جای آن هم عوض نشده اما مشتری آن بیشتر شده است دلیلش را نمیدانم ولی میفهمم آنطور که فکر میکردم هم نبوده با این وصف نمیخوام تغییری در زندگی خود بدهم نمیخواهم طبیعت خود را عوض کنم چون سال هاست که من به خودم عادت کردهام جوان نمیدانست چه بگوید. پیر مرد حرفهایش را دنبال کرد. با وجودی که می‌دانم هر نعمت رحمت الهی است و قبول نکردن آن مبدل به لعنت و زحمت می شود. با وجودی که از زندگی انتظار بیشتری نداشته و ندارم ولی لازم است که به تو بگویم تو برایم برکت بودی، نعمت بودی و رحمت الهی. حالا هم مرا مجبور می دیدگاهم را تغییر دهم. از عادات خود دست بشویم. به افق دیگری نگاه کنم. به ثروت فکر کنم. حال با شناخت آنها و با امکانات فراوانی که در اختیار دارم روحیه خود را خرابتر از گذشته می‌بینم، چون می‌دانم که می‌توانم به همه چیز برسم در شرایطی که روهن به آنها نیاز ندارم. پس از لحظهای سکوت ادامه داد میدانم که چه میخواهم جوان با شنیدن حرف پیر پیرمرد فروشنده به خود گفت خوشحالم از اینکه این فکرها را با فروشنده دورگرد در میان نگذاشتم همان فروشنده ذرت بودادهای که در آن شهر زندگی میکند شهری که دختر بازرگان آنها پک دیگری به غلیان زدند و به دنبال آن و پوک و پک های دیگر و تا غروب آفتاب به این کار ادامه دادند. خورشید آرام آرام خود را به پشت ساختمان های میکشید می کشید. افق را گلگون می کرد و بندر را به خون می نشاند. آنگاه از تیر رس نگاه معف شد. در آن دورها همچون ره گم کرده ای در دریا فرو نشست. هوا گرجومیش شد و روز به اکراه جای خود را عوض کرد و غروب شد. آنها به زبان عربی حرف میزدند و جوان کم و بیش آشنا به این زبان از اینکه می‌توانست گفتگو را تغییب کند و موضوع را درک نماید خوشحال بود. زمانی تصور می کرد که میتواند خیلی چیزها را از گوسفندهایش فراگیرد. ولی آن حیوانات بی زبان هرگز قادر نبودند به او عربی بیاموزند در حالی که به بلور فروش نگاه می کرد بدون اینکه سخنی بر زبان آورد در خود فرو رفت و اندیشید در دنیا چیزهای زیادی وجود دارند که برای گوسفندها ها ناشناختند و آنها نمی توانند چیزی از آنها به همراهشان یاد بدهند گوسفندها فقط در جستجوی آب و علف هستند کهی فکر نمی کنم که آنها چیزی به من آموخته باشند. این منم که در باره ناشناخته ها می و میکوشم جوهرشان را بشناسم. پیرمرد او را مخاطب قرار داد و گفت مکتوب این دیگر چه می تواند باشد؟ باید عرب به دنیا می آمدی تا این واژه را در می چون؟ بعضی از کلمات مفاهیم خاصی دارند و نا به روح زبان متوجه معانی آن نخواهند شد. در حالی که آتش قلیان را خاموش می کرد، رو کرد به جوان و گفت او می تواند به مشتریان مغازه چای در استکانهای کریستال تعارف کند. گاهی نمی توان جریان زندگی را متوقف کرد. مردم از سربالایی تند و سخت کوچه به زحمت بالا می آمدند. درست در انتهای آن مغازهی قرار داشت با ظروف کریستال بسیار زیبا، چای خست زدا و خونک نعنا. آنها وارد مغازه می شدند تا چای بنوشند، چایی که در استکانهای قیمتی و زیبای کریستال ریخته می شد. یکی میگفت هرگز چون این فکری به ذهن همسرم نرسید. شب میهمان داشت، ظروفی از جنس کریستال خرید، چرا که مایل بود آنها را به روخ دیگران بکشد و آنان را از ابتکار میزبان و زیبایی سرشار استقانهای کریستال به تعجب وادارد. دیگری هم گفته قبلی را تایید کرد و افسود، از آنجا که چای تعم و بوی خود را در ظروف کریستال بهتر حفظ می کند، نوشیدنش در چونین هایی به وضوح دلپذیر تر است و تعم و بوی چای هم محسوستر خواهد بود. سفومی فراتر رفت و گفت، در مشرق زمین رسم و سنت این بود که چای را در استکانهای کریستال بنوشند. هر دو نیروهای اسرارآمیزی دارند. طولی نکشید که خبر همه جا پخش شد. مردم از روی کنجکاوی راه پر زحمت آن کوچه باریک و تنگ را در پیش می تا در انتهای معبر در آن بالا مغازه را که چونین نوآوری آن هم در یک تجارت سنتی و قدیمی کرده بود ببینند. مغازه هایی که از قبل وجود داشتند یا دکان‌هایی که به تقلید باز شدند، همه با همه شروع کردند به توضیح چای در استکانهای کریستال. ولی همیشه خالی از مشتری بودند. چون آن بالا در انتهای کوچه شیبدار واقع نشده بودند. فروشنده کریستال با عجله دو شاگرد دیگر به خدمت گرفت. به زودی میبایست علاوه بر ظروف مختلف کریستال مقدار قابل توجهی چای وارد کند آن هم برای مصرف روزانه مردان و زنانی که تشنه نوآوری بودند بدین سان شش ماه از تلوه خورشید بیدار شد. از وقتی قدم به خاک قاره آفریقا گذاشته بود یازده ماه و نه روز می‌گذاشت. جلابی از کتان سفید که برای چنین روزی خریده بود، به تن کرد. دستاری به سر گذاشت که تسمه‌ای از چرم شتور به دورش چنبار می‌زد. و بالاخره سندل‌های تازش را پا کرد. به آرامی بدون اینکه صدایی ایجاد کند پایین آمد شهر هنوز در خواب بود لغمه با نان کنجد گرفت و یک چای در استکان کریستال نوشید سپس در درگاه مغازه نشست و به تنهایی شروع کرد به قلیان کشیدن در سکوت با آن پک می زد بدون اینکه به چیزی فکر کند یا حتی زمزمه ممتد وزش بادی را بشنود که بوی صحرا داشت. وقتی از کشیدن قلیان فارغ شد، دست در جیبش کرد و مدتی به تماشای آنچه از جیب خود خارج کرده بود، ایستاد. مبلغ قابل توجهی بود. میتوانست با آن صد و 120 رأس گوسفند بخرد، بلیت برگشتش را فراهم کند و مجوزی بگیرد برای توصیه تجارت بین کشور خود و سرزمینی که همکنون در آن زندگی می کند. با حوصله انتظار کشید، پیرمرد هم از خواب بیدار شود و مغازه را باز کند. آنگاه برای نوشیدن چای رفتند. جوان بغزش را در گلو شکست. آهی کشید، و در حالی که به سندلهایش نگاه می کرد گفت، همین امروز می روهم. برای خریدن گوسفندهایم به اندازه کافی پول دارم، و شما، شما هم برای رفتن به مکه ثروت و مال به کفایت دارید، پیرمرد چیزی نگفت، جوان دستی به چشمانش کشید و با ستایش از فروشنده ادامه داد، برای رفتن اجازه و رضایت شما را میخوا و تقاضای دعای خیرتان را دارم شما به من خیلی کمک کردید پیرمرد کوشید چشمان مرتوبش را از او پنهان کند ساکت بود و خود را به درست کردن چای مشغول کرد بالاخره پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت من از تو راضی هستم تو به فروشگاه من روح دادی ولی میدانی که من به مکه نخواهم رفت همانطور که تو خود میدانی گوسفند نخواهی خرید جوان ناباورانه و متحیر پرسید این موضوع را چه کسی به شما گفت پیرمرد بلورفروش سرتکان داد و به سادگی فقط گفت مکتوب. و او را دعا کرد جوان به اتاقش رفت تا خرط را جمع کند. آنها را به زحمت در سه کیسه چرمی جای داد. درست در لحظه که از اتاق بیرون می‌رفت، برای آخرین بار به آن نگریست. در گوشه ای از اتاق چشمش به خرجین کهنه چوپانیش افتاد که هنوز آنجا بود. وضعیت رقتباری داشت و او در تمام مدت اقامتش آن را از یاد برده بود. بالاپوش و کتاب قطورش هنوز داخل خرجین بودند. زمانی که بالا را از خرجین خارج می کرد تا به اولین پسر جوانی که سر راهش می دید بدهد دو قطعه سنگ، چرخ زنان سر خوردند و روی زمین افتادند. اوریم و تمیم بودند. جوان یاد پاچاه پیر افتاد و از اینکه مدتها به او و به آن ملاقات فکر نکرده بود، تعجب کرد. حدود یک سال بی وقفه کار کرد تا در مراجعت به اسپانیا به اندازه کافی پول داشته باشد و بین قریب و آشنا سرشکسته نباشد پادشاه پیر گفته بود هرگز از آرزوهایت صرف نظر مکن همیشه نسبت به نشانه دقیق باش اوریم و را از روی زمین برداشت و دیگر بار به شدت احساس کرد پادشاه پیر در آن حوالی است. در طول این یک سال سخت مشغول بود. اکنون نشانه ها به او میگویند گویند که زمان زمان رفتن است. باید کفش و کلاه کرد و پی حدیث خیش رفت. به خود گفت خود را دقیقا مثل گذشته می بینم با همان روحیه همان حال به جز زبان عربی که آن را هم ها به من یاد ندادند ولی فراموش نمیکنم، کنم میشها هم موضوع خاص و بسیار مهمی را به من آموختند اینکه در جهان بیان بدون کلامی وجود دارد که به وسیله آن همه چیز ممکن و قابل فهم می شود و خود او نیز در طول این مدت برای توسعه کسب و کار مغازه آن را به کار گرفته بود بیانی ملهم از هیجان روح که برای رسیدن از عشق و شیفتگی و وارستگی مایه می گرفت آن هم رسیدن به نتیجه دلخواهی که از عمق وجود باورش داریم و با همه توان در آرزوی آنیم تنجه اکنون برایش یک شهر قریب نبود احساس می‌کرد همانطور که این شهر را تسخیر کرده بود دنیا را نیز فتح خواهد کرد پادشاه پیر گفته بود، زمانی که به راستی با همه وجودت آرزویی داشته باشی، کائنات به نحوی عمل می کنند که تو بتوانی به آرزویت برسی. ولی پادشاه از دوزدها، صحراهای عظیم و سوزان و مردانی که رؤیای خود را می شناختند ولی نمی خواستند انجامش دهند، حرفی نزده بود. و پاچاه حتی نگفته بود احرام، تودهی قلب سنگ و سنگ ریزه است که هر کس می تواند نظیرش را در باغچه خود درست کند. زمنان فراموش کرده بود که بگوید اگر برای خریدن یک گله بزرگ گوسفند پول کافی وجود داشته باشد، باید آن گله را خرید. خرجین و کیسه های دیگرش را برداشت، از پلکان پایین آمد. نیک مرد پیر را دید که مشغول براه انداختن یک زوج خارجی بود و مشتریان فروشگاه را که مشغول نوشیدن چای نعنا در استکانهای کریستال بودند وجود این همه مشتری در این وقت صبح نشانه شروع یک روز خوب بود در جایی که ایستاده بود و به فروشنده پیر می نگریست برای نخستین بار دریافت موهای پیرمرد برایش تدائیگر موهای پادشاه هست لبخند شیرینی فروش نیز به یادش آمد و اولین روزی که در تنجه از خواب بیدار شده بود و نمیدانست در آن شهر قریب بدون دیناری پول کجا برود و چه بخورد آن لبخند هم او را به یاد پادشاه پیر انداخت و فکر کرد وقتی از اینجا عبور می کرد حتما از خود نشانه هایی به جا گذاشت تصور میکرد هر یک از این افراد در طول زندگیشان فرصت یافتند یک بار پادشاه را ببینند. راست بود که می گفت همیشه او برای آنهایی که با حدیث خویش زندگی میکنند به شکلی ظاهر می شود. رفت بدون اینکه با فروشنده کریستال خداحافظی کند چون دوست نداشت او را. گریان ببیند رفت با کول باری از دریغ و تحصف دریغ از این دوران و دریغ از همه امکانات و دریغ از آنچه توانسته بود بیاموزد از درونش به خلق مینگریست از شیب کوچه سرازیر شد تا در خم آن خود را گم کند به خود اعتماد بیشتری داشت حس می کرد با این روحیه می تواند دنیا را فتح کند اما به سوی دشت که می شناسم می رویم و را به آنجا به آن دورها به دشتهای اندلس راه بر شوم. این اندیشه خوشنودش نکرد او طول و عرض یک سال تمام را با کار پرزحمت پیمود تا به رؤیایش برسد رؤیایی که اندک اندک با هر دقیقهی که می گذشت اهمیتش را از دست میداد. مگر رؤیا، رؤیای واقعی او نبود؟ به خود گفت، با این همه کسی چه می داند شاید نخواهد یا نتواند بهتر از فروشندهی باشد که هرگز به مکه سفر نکرد، تنها در تصور خود با سفر زندگی کرد، در تصور خود هفت بار به دورش گشت و با تصور خود در آنجا به عبادت جمعی نشست. با این خیال مشغول بود که دستش به سطح صاف و لغزنده اوریم و تمیم رسید و بلافاصله فاصله احساس کرد آن سنگ های پربه ها با او از نیت نیک و نیروی پاچاه پیر سخن میگویند خود را دلگرم دید بر حسب تصادف به قهوه ای رسید که در اولین روز ورودش به تنجه آنجا رفته بود آیا؟ این یک نشانه بود دزدی که پولش را دزدید آنجا نبود قهوه‌چی برایش یک استکان چای آورد جوان در خود بود و فکر می کرد همیشه می توانم دوباره چوپان شوم چگونگی مراقبت از گوسفندها را به خوبی می دانم و هیچ وقت هم فراموششان نخواهم کرد ولی شاید هرگز نتوانم این فرصت را داشته باشم که تا اهرام مصر بروم پیرمردی که جلیق از طلای ناب داشت داستان زندگی مرا میدانست. او یک پادشاه واقعی بود، یک پادشاه اندیشمند با دشتهای اندلس دو ساعت بیشتر فاصله نداشت. ولی بین او و اهرام یک صحرا بود، صحرایی گسترده و سوزان. شرایط موجود را کمی جابجا جا کرد و فهمید که، وضعیت میتواند به نوعی دیگر هم تعبیر شود. او خود را حقیقتا در شرایطی ببیند که از نظر زمانی دو ساعت بیشتر با گنجش فاصله نداشته باشد. حتی اگر این راه دو ساعته یک سال به طول انجامد. میدانم چرا میل دارم به سمت میشها برگردم. روحیه آنها را می شناسم. کار زیادی از آدم نمیخواهند بنابراین، به راحتی میتوان دوستشان داشت اما نمیدانم که صحرا را هم میتوان دوست داشت یا خیر. ولی این صحراست که گنج مرا در خود نهفته دارد. اگر نتوانم پیدایش کنم هر آن می توانم به کشورم برگردم؟ نباید فراموش کرد که زندگی به اندازه کافی به من پول داد و زمان لازم هم در اختیار است. پس چرا نه؟ در این لحظه خوشحالی زاید الوصفی در همه وجودش دوید. با خود گفت، همیشه می تواند یک چوپان یا یک بلور فروش شود. ولی خود را فراتر می دید. با خود فکر کرد و ادامه داد شاید دنیا گنج های فراوانی در خود نهفته باشد. ولی او یک خواب دید. خوابی که یک بار دیگر تکرار شد. تصادفی هم نیست که او پادشاه را دید. و این چیزی نیست که برای همه مردم پیش آید. با این فکرها از قهوخانه که خارج میشد خود را خوشحال و سبکبال احساس کرد. به یاد آورد یکی از تاجران محموله کریستال خود را با کاروانی که از صحرا میگذشت حمل می‌کرد. اوریمو تومیم را در دست گرفت. به سبب وجود این دو سنگ قیمتی بود که دوباره خود را در مسیر گنج خیش دید و پاچاه پیر را به یاد آورد که گفته بود همیشه در کنار کسانی هستم که با حدیث خیش زندگی می کنند. چیزی گم نخواهد کرد اگر تا کاروان سرا برود و پرسجو کند. پرسجو کند و بداند احرام حقیقتم خیلی دورند؟ مرد انگلیسی درون ساختمانی نشسته بود که بوی عرق تن بوی حیوان بوی خاک میداد نمیشد آنجا را کاروان سرا نامید بیشتر به طویله میمانست فضایی پرچین شده برای حیوانات بود در حالی که یک مجله شیمی را ورق می زد به خود می گفت همه عمر را را گذاشتم که به اینجا برسم مطالعه ده سالم مرا به طویله رساند با وجود این، باید نشانه ها را باور داشت و با سماجت و سرسختی پیگیر کارها بود. زندگی و همه مطالعاتش را وقف تحقیق در چگونگی بیان واحدی که دنیا با آن سخن می گفت کرده بود. نخست به اسپرانتو روی آورد. سپس به ادیان و سرانجام به کیمیاگری. می توانست به اسپرانتو حرف بزند. شناخت لازم و کافی از ادیان داشت ولی هنوز کیمیاگر نشده بود. بدون شک به اصرار بسیاری از مبهمات رسیده بود ولی تحقیقاتش او را در مسیری قرار داده بود که هرچه می کوشید نمی توانست از آن عبور کند. سعی کرد با یک کیمیاگر هر کس و در هر کجا که بود تماس برقرار کند ولی موفق نشد. کیمیاگران شخصیت غیرعادی و غریبی دارند و جز به خود به کسی فکر نمیکنند و تقریبا همیشه از کمک علمی به دیگران امساک می‌ورزند. کسی چه میداند؟ اگر آنها ذات اصلی یا ترکیب اصلی را کشف نکرده بودند و کیمیا را نمیشناختند چه دلیلی داشت این, این خود را در سکوت زندانی کنند؟ تا کنون، قسمت اعظم ثروتی را که پدرش برای وی گذاشته بود، در جهت پیدا کردن اسرار کیمیا از دست داده بود. به بسیاری از مشهورترین کتابخانه‌های دنیا مراجعه کرده بود و کمیابترین و مهمترین کتاب های کیمیاگری را خریده بود. در یکی از این کتاب‌ها خواند خاند که سالها پیش یک کیمیاگر مشهور عرب از اروپا دیدن کرده بود که در بارش گفته بودند بیش از دویست سال داشت. به اکسیر حیات دست یافته بود و اسرار کیمیا را می شناخت. و مرد انگلیسی با خواندن شرح زندگانی آن مرد سخت مجاب و مجذوب شده بود. اگر یکی از دوستانش در مراجعت از حفاری باستانشناسی با او از دیدههایش حرف نمی زد و از قدرت العاده مرد عرب چیزی نمی گفت این داستان می توانست مثل همه داستانهای دیگر برایش همچون یک افسانه باقی بماند. به او گفته بود آن مرد عرب در یک آبادی به نام فایوم زندگی می کند و مردم میگویند دویست سالشه است و قادر است هر حرفل زیرا به طلا بدل کند. مرد انگلیسی اسیر افکار خود به ای رسید که حد و مرزی برایش نمی شناخت. به زودی همه قرارهای قبلی خود را به هم زد. مهمترین کتابهایش را جمع کرد و حالا آنجا بود. در آن به اصطلاح کاروانسرا که بیشباهت به طویله نبود. با وجود این بیرون کاروانسرا یک کاروان بزرگ سیورسات فراهم می کرد و خود را برای عبور از صحرا آماده می‌نمود. کاروانی که از فایوم هم میگذشت. مرد انگلیسی فکر کرد حتما لازم است به دیدار این کیمیاگر لعنتی بروم و بوی حیوانات برایش بیشتر قابل تحمل شد یک جوان عرب با مقداری محموله وارد ساختمانی شد که مرد انگلیسی در آنجا بود و سلام کرد جوان عرب پرسید شما به کجا می روید مرد انگلیسی پاسخ داد به صحرا و به خاندنش ادامه داد در این لحظه میل نداشت با کسی صحبت کند احتیاج داشت همه آنچرا که طی ده سال خوانده بود در ذهنش مرور کند چون تصور می کرد کیمیاگر به ارزیابی او می پردازد و به آزمایشش می گذارد. جوان عرب هم کتابی برداشت و در گوشهی به خواندن مشغول شد کتاب به زبان اسپانیولی بود مرد انگلیسی با دیدن آن اندیشید این هم یک شانس چون خود او به زبان اسپانیولی بیشتر آشنا بود و با آن بهتر از زبان عربی حرف میزد. فکر کرد اگر این جوان تا فایوم بیاید کسی را در کنار خود خواهد داشت تا در مواقعی که به مسائل مهم نمی پردازد بتواند با او صحبت کند جوان در اندیشه بود گذشته را مرور میکرد اتفاقات را پی در پی و همچون حلقه های به هم پی وصله دید. با دیدن مرد انگلیسی هم گفت همش کم و بی شبیه و چه موسکند رو آورد به کتاب تنها کتاب قطوری که همراه داشت همان کتابی که با شرح خاک سپاری آغاز میشد و بارها تصمیم گرفته بود به ولی موفق نشده بود. اینک یک بار دیگر شروع کرد به خواندن آن. به خود گفت بیش از یک سال است این کتاب را دست گرفتم که بخوانم ولی از چند صفحه اول آن فراتر نرفتم. پادشاهم هم نیست تا گاه و بیگاه فکرم را به خود مشغول کند و رشته خواندن کتاب را قطع کند. هیجان زده بود، دل شور داشت، به هیچ وجه نمیتوانست فکرش را متمرکز کند. هنوز مردد بود، دو دل بود، نمیتوانست تصمیم بگیرد. در این حال و هوا میدید که انتخاب چه کار شاق و مهمی است و تصمیم گرفتن چقدر مشکل. چون میدانست که تصمیمات فقط معرف آغاز کارند نه انجام آن. وقتی کسی تصمیمی میگیرد در حقیقت خود را در معرض جریان تند و تیزی میگذارد که او را به نقطه نامعلومی میبرد ای که او هنگام تصمیم گیری نه را دیده بود و نه حتی به طور مبهم پیش بینی کرده بود آری جریان او را به مقصدی مبهم هدایت میکند به افقی ناشناخته جوان برای اینکه دلایلش را توجیح کند فکر کرد و گفت مثلا خود من وقتی در صدد جستجوی گنجم برآمدم هرگز فکر نمی کردم که باید در یک بلور فروشی کریستال هم کار کنم. یا به همان ترتیب شاید برنامه حرکت و سفر این کاروان هم دقیقا منطبق با خواست و تصمیم من باشد ولی مسیر با توجه به اتفاقات غیر مترقبه کمانکان پوشیده و رازگونه خواهد ماند و معلوم نیست مرا به کجا خواهد برد. مقابل او یک اروپایی اخلاقا نفرت انگیز نشسته بود که او هم مشغول خواندن یک کتاب بود. و وقتی جوان وارد کاروان سرا شد با حالتی تحقیرآمیز برندازش کرد در صورتی که می توانست دوست خوبی برایش باشد. ولی آن مرد اروپایی خیلی سریع همه راه ها را بست و همه رشته ها را پار کرد. جوان کتابش را بست، نمی خواست کاری کند که شباهتی به کارهای آن مرد داشته باشد. از جیبش اوریم و تمیم را بیرون آورد و شروع کرد به بازی کردن با این دو سنگ. مرد خارجی یک خرد و فریادکی کشید. یک اوریم و یک تومیم؟ جوان فلفور سنگها را به جیبش برگرداند و گفت فروشی نیستند مرد انگلیسی در پاسخ گفت ارزشی ندارند آنها چیزی بیشتر از کریستالهای صخره نیستند میلیونها سنگ همانند آنها روی زمین پراکندند اما تنها برای کسی که شناختی دارد و اهل کار است مفهوم پیدا می کنند و منم که می دانم آنها اوریم و تمیم هستند. اصلا نمیدانستم که در این ناحیه هم چنین این سنگ وجود دارند. جوان گفت: یک پادشاه آنها را به من هدیه کرد. مرد خارجی خاموش شد. اندکی بعد دست در جیبش کرد و دو سنگ شبیه آنهایی که جوان داشت بیرون آورد و در حالی که آنها را تکان میداد گفت: از یک پادشاه حرف زدید؟ این بار جوان خواست به بحث خاتمه دهد. بنابراین گفت، باور نمی کنید که یک پادشاه بخواهد با یک چوپان حرف بزند؟ کاملا برعکس، این چوپانها ها بودند که پادشاهی را که بیشتر آدمها ها ترکش کرده بودند و قبولش نداشتند به ستایش نشستند، ارجش نهادند و تاج بر سرش گذاشتند. وانگهی، کار ای نیست که پادشاهان با چوپانها ها حرف بزنند؟ مرد انگلیسی خیال کرد، جوان از کنایه چیزی نفهمیده، این افزود این داستانیست از انجیل، کتاب مقدس، همان کتابی که چگونگی استفاده از اوریم و تمیم را به من آمخت این سنگ ها تنها وسیله پیشگویی هستند که خداوند استفاده از آنها را مجاز دانسته است و پیشوایان مذهبی آنها را روی جلیغه از طلا نصب می کنند و با خود دارند. جوان با شنیدن آن حرفها همه روی را در راستای اندیشه خود یافت و از آمدنش به کاروانسرا راضی و آسوده خاطر شد. خوشحالی را در همه وجودش احساس می کرد. مرد انگلیسی فکری را که از ذهنش گذشت با صدای بلند تکرار می کرد. شاید این هم نشانه باشد؟ چه کسی با شما از نشانه ها حرف زده است؟ توجه و علاقه جوان لحظه به لحظه افزوده میشد. مرد انگلیسی برای ادامه بحث مجله ای را که در دست داشت و مشغول مطالعه آن بود بست و به کناری گذاشت و رو کرد به جوان. همه چیز در زندگی روزمره نشانه است. در آغاز آفرینش، کائنات را زبانی بود قابل فهم برای همه ولی انسان طی هزارها به مرور فراموشش کرد البته هستند کسانی که در پی کشف آن باشند از جمله خود من که بین همه اسرار در جستجوی این راز و رمز جهانیم و به همین دلیل است که ما را در اینجا میبینیم چون این شهر نشانه است در مسیری که باید بپیمایم. و این کاروان هم نشانه دیگر است و با شناخت این نشانه‌ها و تعقیب آنها باید مردی را پیدا کنم که به اسرار هستی دست یافته و راز زبان یگانه دنیا را میشناسد یک کیمیاگر را حرفش به وسیله سرپرست کاروان سرا قطع شد مرد عرب چاقی آنها را مخاطب قرار داد و گفت شما دو نفر آدمهای خوش شانسی هستید بعد از ظهر همین امروز یک کاروان آماده ی حرکت می شود تا به فایوم برود. جوان به او گفت: اما من می خواهم به مصر بروم. مردک چاغ گفت: فایوم در مصر است و تو تو یک عرب مزحک به نظر آیی. جوان جواب داد که اسپانیایی است. مرد انگلیسی خوشحال از اینکه جوان با وجود جلابه‌ای که به تن داشت یک اروپایی بود، وقتی که مردک چاغ بیرون رفت با خود گفت اسم این نشانه ها را باید شانس گذاشت. اگر می توانستم یک دائرت المعارف عظیم فقط درباره کلمات شانس و تصادف می نوشتم. با این کلمات است که راز کائنات نوشته شد. سپس به ادامه حرفش برداخت و به مرد جوان گفت تصادفی نیست که اوریم و را در دست او دیده. و پس از مکس کوتاهی پرسید که آیا او هم در جستجوی کیمیاگر است؟ جوان پاسخ داد نه nah, من در پی یک گنج هستم بلا فاصله از گفتهش پشیمان شد ولی به نظر رسید که مرد انگلیسی به گفته او اهمیتی نداد وقتی سرپرست کاروان سرا صدایشان کرد که از اتاقک خارج شوند و خود را آماده سفر کنند جوان به دنبال حرفش افزود، جستجو هم می شود گفت، من هم به نوعی در جستجو هستم ولی نه جستجوی کیمیاگر، چون حتی نمیدانم که کیمیاگری چیست. که چشمان سیاه و ریشی بلند داشت گفت من کاروان سالار هستم مسئول مرگ و زندگی همه کس همه چیز و همه آنچه با کاروان هدایت می کنم. باید بدانید صحرا مانند یک زن بلحوث و دلفریب است گهگاه مردان را دیوانه می کنم. حدود دویست نفر خدمه و مسافر و بیشتر از دو برابر آن حیوانات گوناگون، شامل شترها اسبها قاطرها و پرندگان از هر نوع در آنجا بودند زنها بچهها و مردی که شمشیری به کمر بسته بود و تفنگی دراز هم برشانه داشت در کاروان دیده میشد مرد انگلیسی چند صندوقچه لبریز از کتابهای گوناگون با خود داشت داخل میدان صداهای مختلف در هم آمیخته و قشقرقی راه افتاده بود کاروان سالار هم در آن هیاهو می بایست سخنانش را به گوش دیگران میرساند تا دقیقا برای همه همراهان قابل فهم باشد. در اینجا همراه کاروان آدم های مختلف با ادیان مختلف وجود دارند. هر کس خدای خود را در قلبش احساس می کند. اما خدای من خدای واحد الله است. و الله قسم می خورم که آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا یک بار دیگر به سلامت از صحرا بگذرم. فقط از شما میخواهم که فرد فردتان هر یک به خدای خود، خدایی که میپرستد و به آن اعتقاد دارد، از عمق وجود و قلبش قسم بخورد که در هر حالت و وضعیت از من اطاعت خواهد کرد. در صحرا سرپیچی از اطاعت مفهومی به جز مرگ ندارد. نحوای سنگین و کرکننده در فضا و بین جماعت همراه راه افتاد. هر کس با صدای خفه و آرام سوگند می‌خورد و خدای خود را به شهادت می‌گرفت. جوان به عیسی مسیح قسم خورد و مرد انگلیسی موضوع را مسکوت گذاشت. پس از اینکه مراسم سوگند به سادگی گذشت، قلقله و سر و صدا اوج بیشتری گرفت. در این وقت مردم رو به آسمان می میکردند و سلامت و حفاظت خود و همه کاروان را در آن بالاها در آن دورها از او میخواستند صدای شیپور مدت نسبتا طویلی شنیده میشد و هر کس به بارگیری سیورسات خود پرداخت و برزینی قرار گرفت جوان و مرد انگلیسی برای خود شتر خریده بودند و در بار کردن خرتوپرت‌هایشان و, و سوار شدن کمی مشکل داشتند. جوان به حال آن مرد که های سنگین لبریز از کتاب داشت، دل سوزاند. ولی مرد انگلیسی به دنبال گویی که در کاروان سرا داشت اضافه کرد: تصادفات، اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی‌اند. و ادامه داد: حرف‌های یک دوست انگیزه سفرم شد و بادارم کرد به اینجا بیایم. می گفت که یک مرد عرب را می شناسد که در این لحظه کاروان به راه افتاد. سر و صدا آنچنان در فضا پیچید که شنیدن حرف های مرد انگلیسی غیر ممکن شد. ولی جوان به خوبی میدانست که او چه می خواست بگوید و مفهوم حرف چیست؟ تقدیر یا تصادف؟ این حلقه های به هم پیوسته را می شناخت. این سلسله را، این زنجیر اسرارآمیز را که هر اتفاقی را به دیگری پیوند می دهد. که از او یک چوپان می سازد که خوابی را برایش تکرار می کند که او را در شهری نزدیک آفریقا می گذارد که در میدان شهر پادشاه را وامی دارد تا با او گفتگو کند که دزدی پولش را می دزدد که با یک بلور فروش آشنایش می کند. و و فکر کرد هرچه انسان به آرزویش نزدیکتر شود حدیث خیش را دلیل واقعیتری برای زندگی می کاروان در جهت طلوع خورشید به راه افتاد صبحها به زحمت پیش میرفت زمانی که آفتاب گرم و سوزنده میشد توقف می و وقتی که خورشید سرخم کرده، و در ریگزارهای صحرا نهان میشد پیشروی خود را بار دیگر اثر میگرفت جوان با مرد انگلیسی که قالبا غرق در کتابهایش بود به ندرت حرف میزد بنابر این ساکت بود و همه وقتش را به تماشای راه رفتن حیوانات و انسانها در صحرا می و روحیه و حالات آنها را در طول پیشروی روزانه بررسی میکرد حالا وضعیت به کلی متفاوت با اولین روز حرکت بود. آن روز ازدهام بود و هیاهو، شیون و گریه بچه ها، شیه و سر و صدای دیگر چهارربیان و در میان آن همه بینظمی و آشفتگی که میرفت سامان بگیرد صدای بازرگانان نگران هم بود. فریاد راهنمایان نمایان که دستور می دادند، گاه بی حسله گاه مسترب و گاه دهنده اما در صحرا چیزی نبود به جز باد و سکوت و اثر سم چهارپایان حتی ساربان ها هم در گفتگو امساک داشتند و کم حرف می‌زدند. غروب یک روز ساربانی گفت من از این دشت های گسترده شنی بارها و بارها گذر کردم ولی صحرا بسیار وسیع است افقها بسیار دور انسان در مقابل آن خود را ذره ای می میبیند ناچیز کوچک و ناگزیر از سکوت و همواره در سکوت خود فرو میرود جوان فهمید که ساربان به او که تا به آن روز هیچگاه یک صحرا را نپیموده بود چه میخواست بگوید چون هر وقت به دریا یا به آتش نگاه میکرد میتوانست مدتها در سکوت باقی بماند و کلمه ای نگوید. در خود غرق شود و به عظمت منشأ و قدرت عناصر فکر کند. به خود گفت تا کنون از گوسفندها بسیار یاد گرفتم و از کریستالها و صحرا در پیش است. از صحرا هم به خوبی میتوانم بیاموزم. به نظر میرسد که قدیم است و قادر باد آرام نمیگرفت و او هم از اندیشه روزی را به یاد آورد که در شهر تاریفا روی دیوار بلند قلعه نشسته بود و همین باد را حس می کرد شاید همکنون این باد پشم گوسفندهایش را نبازش می کند هایی که در دشت های در در جستجوی آب و الفند بیان آنکه، علت واقعی دلتنگی خود را شناخته باشد به خود گفت آنها که گوسفندهای های من نیستند. تا کنون به طور حتم به چوپان جدید اونس گرفتند و به او عادت کردند و بی مرا هم از یاد بردند. چه بهتر که اینطور طور باشد. چون او هم که مثل گوسفندها ها عادت به سفر دارد میداند که همیشه لحظه ای می رسد که باید بار و بونه را بست و آماده عظیمت شد. سپس دختر بازرگان را به یاد آورد. اطمینان داشت که تا کنون ازدواج کرده است شاید با یک فروشنده دورگرد ذرت بوداده یا شاید با چوپانی که سواد دارد و می تواند برایش داستانهای عجیب تعریف کند. با این همه او که تنها چوپان با سواد نبود. از این فکر خود کمی لرزید. و از احساس ناشناخته ای که در او نطفه بسته جوانه زده و در حال رشد بود ترسید احساسی که در او قوت میگرفت و بارور میشد خود را آماده فراگیری زبان واحد و بیان بدون کلام کائنات می میدید احساس ناشناخته ای که او را قادر میساخت گذشته یا آینده آدمها را هم بشناسد احساس مبهم و قریبی که مادرش بارها و بارها از آن سخن گفته بود فکر می کرد که این احساس مبهم باید عبور سریع روح از جریان مادی زندگی باشد جریانی که در بطن خود افسانه زندگی همه انسانها را چنان در بر می که از مجموعشان به یک حقیقت می رسد. از آنجا که عناصر مظهر یا جزئی از آن حقیقت هستند در نتیجه انسان جزء هم بخشی از افسانه خواهد بود که از قبل دیده و نوشته شده است. به سان می در بطن باشیم و از متن آگاه شویم. به دنبال این افکار به یاد بلور فروش افتاد و گفت: مکتوب. صحرا گاه شنی و گاه سنگی بود. کاروان هنگام برخورد به یک قطعه سنگ بزرگ از کنارش رد می و توده های عظیم سخر مانند را دور می زد. به نحوی دایره بسیار بزرگی از خود به جای می گذاشت. وقتی ماسه ها برای پای شترها فوقلاد ریز و مبواج بودند، مسیری انتخاب می شد که فشردگی و ماسه بیشتر و جاده مقاوم تر باشد. گاهی سطح صحرا پوشیده از نمک بود بازمانده یک دریاچه پایان هم هر ازگاه از سختی از راه یا خستگی بار در وضع باری قرار می گرفتند در این حال ساربانها بار از پشت آنها و کمکشان می کردند بار آنها را به دوش می کشیدند و پس از عبور از معبرهای دشوار بار دیگر بر پشت حیوانات میگذاشتند و اگر یک راهنما مریض میشد یا میمرد ساربان ها برای انتخاب جانشین بین خود قرعه می کشیدند کاروان مجبور بود به اقتضای مشکلات سر راه مسیر جدیدی انتخاب کند سنگی یا صخره را دور بزند راهش را کوتاه یا بلند کند همه اینها تنها به یک منظور بود به مقصد رسیدن کاروان گاه نیز بر فراز همه مشکلات موجود ای در آن دورها نشانه بود. نشانه مسیری که به یک آبادی می رسید و وقتی کاربانیان در صبح سهرخیز اختری را در آسمان می دیدند که می در می که آن ستاره با جلوگری هایش نشانگر است که به آب می رسد. به سایه، به خرما، به زن. فقط مرد انگلیسی بود که با غرق شدن در کتابهایش خود را از دیدن این همه دیدنی‌های گرفتنی و زیبا محروم می‌کرد. جوان هم کتابی داشت و سعی کرده بود در روزهای اول سفرش آن را بخواند. ولی ترجیح داد حرکت کاروان را نگاه کند، صدای باد را بشنود و از درون خود بیرون را به ارزیابی بگذارد. شطرش را که بهتر شناخت و بیشتر به او عادت کرد، کتابش را به دور انداخت. بار اضافی بود. ولی همانند خرافاتیها تصور می کرد، هر وقت کتاب را در دست می گرفت که بخاند، گویی با یک شخص مهم برخورد نموده است. با ساربانی که تقریبا همیشه و همه وقت کنار او راه می رفت دوست شد. جوان در منزلگاه های شبانه، زمان بیخوابی در کنار آتش از ماجراهای دوران چوبپانیش داستانها میگفت. در یکی از این فرصت و در جریان یکی از این گفتگوها ساربان هم داستان زندگیش را برای او تعریف کرد. در مکانی نزدیک الکروم زندگی میکردم وچههایی داشتم و سیفی کاری کوچکی را انداخته بودم. طوری در آنجا مستقر شده بودم که، فرارسیدن مرگ هم تصور تغییری به ذهنم نمیرسید سالی که کشت بهتر و محصول بیشتر شد همه با هم به مکه رفتیم و من تنها وظیفه واجب خود را که تا آن روز انجامش نداده بودم عملی کردم بنابراین در آرامش کامل آماده بودم که عجل فرا رسد و از وضع خود هم خورسند بودم یک روز زمین شروع کرد لرزیدن. رودخانه نیل هم گویی لجام گسیخت و از بسترش خارج شد. اتفاقی که هیچ وقت به فکرم خطور نمی کرد، چهره کریه خود را نشانم داد. همسایه های من بیم آن داشتند که سیل باغ زیتونشان را ویران کند. زنم از اینکه ببیند آب بچه هایش را می وحشت داشت. و من هم بیم آن داشتم، سیفی کاریم که آن همه برایش زحمت کشیده بودم، به کلی خراب شود و از بین برود. ولی سیل آمد، چاری نبود، علاجی هم نداشت و راهی برای جلوگیری از آن به نظر نمی رسید. آمد، همه چیز و همه جا را خراب کرد و با خود برد و هیچ بر جای نگذاشت. نه باغ زیتون، نه سیفی کاری، نه زن، نه بچه هایم را. مجبور شدم برای بقا، برای ادامه زندگی، مکانی دیگر بجویم و راهی دیگر بپویم. و امروز یک ساربانم. با این وجود توانستم همیشه گفته الله را به یاد داشته باشم که هیچ کس از آینده مبهم وحشت نکند هر انسانی قادر است به آنچه میخواهد و نیازمندش است برسد ما از آن میترسیم که داشته های من را از دست بدهیم رسم و رسوم خود را آداب و سنت خود را و زندگی را و وقتی در آبیم که افسانه زندگی ما و افسانه دنیا را فقط یک دست نوشته است آنگاه هر سمان فروکش می کند و از بین می رفت در منزلگاه های شبانه به هم بر همیشه یکی از آنها نیازمندیهای دیگری را با خود داشت انسان با دیدن آنها میفهمید که یک دستی هست یک دست قیبی که همه چیز را از پیش نگاشته است ساربانها با هم مبادله اطلاعات میکردند و از حرکت شن، حرکت باد و توفنهای احتمالی سخن میگفتند یا دور آتش سهرگاهی جمع می شدند و از صحرا و حوادث آن داستانها می سرودند خرزگاه بومیانی که خود را سخت پوشانیده و نگهبان جاده کاربان را بودند دیده می شدند جلابه تیره به داشتند و سر و رویشان را به نحوی پوشانده بودند که فقط چشمانشان دیده می شد. در سکوت می آمدند و در سکوت هم میرفتند ولی در هر آمد و شد کاروانیان را از وضعیت احتمالی جاده پیش رویشان آگاه می کردند. از راه زنان می گفتند یا از قبایل یاغی و سر راهی در جریان یکی از این بیداری ها، یا شب ها ساربان به جوان و مرد انگلیسی که کنار آتش چنبتمه زده بودند نزدیک شد و گفت شایع شده که قبایل مختلف با هم در حال جنگند هر سنفر ساکت شدند جوان اسپانیایی توجه کرد چنان وحشتی بر فضا حاکم شد که هیچ کس را یارای سخن گفتن نبود تشخیص این ترس را در نتیجه درک بیان بدون کلام دانست بیان بدون کلام یا زبان جهانی پس از مدتی مرد انگلیسی پرسید: «آیا خطری وجود دارد؟ سابان پاسخ داد: مسئول راهداری صحرا در شرایطی است که نمیتواند برگردد. وقتی که نگاه به عقب غیر ممکن باشد چارهی بهتر از پیشروی وجود ندارد و در این شرایط خطرناک آنچه باقی می این است که همه به الله توکل کنیم. در خاتمه، کلمه متعارف و کم و بیش بر زبان آورد. گفت مکتوب. پس از دور شدن ساربان، جوان رو کرد به مرد انگلیسی و گفت لازم بود بیشتر به ها دقت می کردید. آنها به جهت موانع موجود تغییرات زیادی در مسیر خود دادند. ولی همیشه به یک نقطه چشم دوخته بودند و به سوی آن پیش می و مرد انگلیسی پاسخ داد: و تو تو هم می باعث درباره دنیا بیشتر کتاب میخواندی. چون کتابها هم شبیه کاروان ها هستند. کاروانیان از انسان گرفته تا حیوان خط طویلی بر ماسه صحرا نقش کرده بودند و با شتاب بیشتر میرفتند. روزها از جنبنده صدا بر نمیخواست و شبها نیز، کاروانیان در ساعاتی که عادت داشتند گرد آتش جمع شوند و پرحرفی کنند، دیگر به آن رو نمی آوردند. روز کاروان سالار تصمیم گرفت دیگر آتشی روشن نکند، چرا که فکر می کرد، نور آن در شب جلب توجه خواهد کرد. این بر دو سفه طویل روزها و شبها سکوت حاکم شد. شبها هنگام خواب مسافران همه با هم در میان دیواری از چهار بایان که دورشان کشیده میشد قرار میگرفتند و سعی میکردند بدین طریق خود را از گزند سرما و رویدادهای احتمالی صحرا حفظ کنند. رئیس کاروان هم چند نگهبان مسلح را به محافظت این جمع میگماشت. در یکی از این شبها مرد انگلیسی بیخواب شد و به جستجوی جوان اسپانیایی رفت. آنها به اتفاق به گردش روی تپه های شنی نزدیک مشغول شدند. ماه با همه لوندیهایش در آسمان به آنها نگاه می‌کرد. و جوان هم اتفاقات زندگیش را برای مرد انگلیسی تعریف می‌کرد. او مجذوب داستان کار کردن جوان در بلور فروشی شده بود، به ویژه، وقتی به رونق روزانه کاسبی در فروشگاه رسید، رو کرد به جوان و گفت اینجاست که علت قایی یا مبدع همه چیز را به حرکت وامی دارد. پدیدهی که در کیمیاگری به عنوان جان جهان یا روان دنیا شناخته می شود. وقتی که انسان با همه وجود خود به چیزی تمایل دارد، در حقیقت می خواهد به جان جهان نزدیک شود و میکوشد تمایلات خود را از قوه به فعل در آورد. در این مرحله نیرویی که ظاهر می شود یک نیروی مثبت است که در کنار خاسته قرار می گیرد. و گفت این پدیده امتیازی برای انسان نیست چه همه عناصر دیگر که بر روی ظاهری زمین دیده می شوند دارای روان یا جان هستند. از آب و باد و آتش گرفته تا عناصر معدنی عناصر گیاهی، عناصر حیوانی یا حتی یک اندیشه، همه و همه روان دارند. آنچه در پایین یا بالای روی ظاهری زمین قرار گرفته است، هیچگاه ثابت نبوده و در تغییر است. چون زمین هم یک پدیده زنده است و دارای روان. بنابراین ما جزئی از این روان هستیم. اما غالبا نمیدانیم که روان دنیا به نفع ما در حرکت است. فراموش نکن که در فروشگاه تمام ظروف کریستال برای موفقیت تو با تو همکاری داشتند. جوان در حالی که غرق تماشای قرص ماه و ماسههای سفید بود، مدتی را به سکوت گذراند. مرد انگلیسی ادامه داد: بالاخره توانستم حرکت کاروان را هنگام عبور از صحرا ببینم و دریابم که کاروان و صحرا دارای بیان مشترکند به همین دلیل یکی عبور دیگری را ممکن میسازد یا یکی حرکت و قدمهای دیگری را روی خود حس می کند و وقتی احساس یکی با حرکت دیگری هماهنگ شد آنگاه کاروان به آبادی خواهد رسید ولی اگر یکی از ما با وجود همه جسارت و اراده این بیان متفاوت را درک نکند، همان روزهای آغازین خواهد مرد. هر دو با هم به محتاب خیره شدند. جوان دنباله سخن را از مرد انگلیسی گرفت و چونین گفت، این افسون و فریبندگی نشانه هاست، من با چشم خود دیدم که راهنمایان چگونه نشانه ها را در صحرا تشخیص می دهند و دنبالشان می کنند و چگونه روح صحرا با روان کاروان هم نشینی دارد. لحظه بعد مرد انگلیسی رشته کلام را به دست گرفت باید به مطالعه حرکت کاروان و فراز و فرود آن در صحرا بیشتر بپردازم. و جوان پاسخ داد. و من هم بهتر است که کتاب‌های شما را بخوانم. کتاب‌های جالب و غریبی بودند. مطالبی از جیوه، نمک، اجتهاد و پادشهان در خود داشتند که از آنها چیزی سر در نیاورد. با این وجود از خواندن و بررسی موضوعات گوناگون کتاب‌ها به یک نتیجه رسید. همه آنها فکر ثابتی را دنبال می‌کردند و در جهت توجیه آن بودند. اینکه همه پدیدهها مصحری از یک واقعیت هستند. در یکی از کتابها متوجه شد که موضوع اصلی کیمیاگری فقط چند سطر است که روی یک زمرد ساده نوشته شده است. مرد انگلیسی گفت: به آن لوح زمرد میگویند. و از این تذکر خود راضی بود. چرا که میدید میتواند چیزهایی هم به او یاد بدهد. پس چرا این همه کتاب نوشته شده؟ مرد انگلیسی جواب داد، برای این که همان چند سطر برای دیگران قابل فهم شود. البته خودش فهمید که این جواب خیلی هم قانع کننده نیست. کتابی که بیش از همه نظر جوان را جلب کرد، کتابی بود پیرامون کیمیاگران معروف و بلند آوازه. مردانی که عمر خود را در آزمایشگاه‌ها گذرانده بودند و کوشیده بودند فلزات را تصفیه و خالص کنند آنها تصور می‌کردند اگر فلز زیرا را سالها در بوته ذوب کرده و بجوشانند آن فلز خود را از مختصات عینی آزاد می‌کند و بدل به مختصات ذهنی می‌شود یعنی به جان جهان می‌رسد تنها همین یک ویژگی میتوانست انگیزه کیمیاگران باشد. چرا که به این ترتیب میتوانستند، ماهیت همه آن چرا که روی زمین است درک کنند. چون آن زبانی بود که دیگر اشیا بدان وسیله بین خود رابطه برقرار میکردند. کیمیاگران این شناخت و این کشف خود را ذات اصلی نام نهادند. و آن را متشکل از دو جزء جدا شدنی دانستند. یک جزء مایه و یک جزء جامد. جوان پرسید، آیا نگاه کردن به انسانها و نشانه ها برای شناخت این زبان کافی نیست؟ مرد انگلیسی با خشونت پاسخ داد، تو عادت بدی داری، میخواهی همه چیز را ساده کنی. کیمیاگری یک کار است. بنابر تعالیم اساتید فن پیگیری هر مرحله از مراحل تکامل و پیشرفت اجتناب ناپذیر است. جوان طی مطالعاتش پی برد که جزء مایع از ذات اصلی که اکسیر حیات نامیده شده است، نه فقط شفا بخش همه امراض است که مانع پیر شدن کیمیاگران هم می شود و جزء جامد نیز کیمیا نامیده می شود. مرد انگلیسی گفت، پیدا کردن کیمیا آسان نیست. کیمیاگران گران سالها در آزمایشگاه خود به آتشی که برای تصفیه فلزات فل ذات روشن بود نگاه کردند. با گذشت زمان در عمق وجود خود هم خودپرستی های دنیایی را از دست می‌دادند. تا سرانجام یک روز عمل تصفیه یک فل ذات را دیدند که روح خود آنان را نیز از آلودگی های پاک نمود. جوان به یاد حرفهای بلور فروش افتاد که گفته بود، تمیز کردن ظروف کریستال کار درستی بود، چون با این عمل هر دو نفرمان از افکار بد رها شدیم. بیش از پیش یقین میافت که باید کیمیاگری را در زندگی روزانه یاد بگیرد. مرد انگلیسی ادامه داد، کیمیا خاصیت فوقلادهی دارد، ذره از آن قادر است، مقدار زیادی فلز بی اهمیت را به تلا تبدیل کند. از این زمان توجه جوان به کیمیاگری بیشتر شد. فکر کرد با اندکی شکی و تحمل خواهد توانست است همه چیز را به تلا تبدیل کند. شرح حال شخصیت مختلف و معروفی چون هلوسیوس الی، فولکانلی و جبر را خواند. داستان جذابی بودند، همه آنها تا آخر عمر با حدیث خیش زندگی کردند، سفر می کردند. با مردان عالم و دانشمند ملاقات و هم داشتند. هر از گاهی هم برای ناباوران کارهای اعجاباوری شبیه معجزه می کردند و همیشه و همه وقت اصرار اکسیر حیات و کیمیا را در نهانگاه خود به دقت حفظ و حراست می کردند. ولی، زمانی که می‌خواستند ماهیت آفرینش را بفهمند و دانش خود را به برند، خود را زبون میدیدند. از خود بی‌خود می‌شدند چون آنچه در اختیار داشتند، مقداری ابزار عینی و مادی بود که طرحهای گوناگون دستورالعمل‌های رمزدار و کد شده و متن‌ها و نوشته‌های گنگ و نامفهوم را در بر می‌گرفت. شبیه از شب‌ها جوان از مرد انگلیسی پرسید چرا آنها از زبان مشکل و غیرقابل فهمی استفاده می کنند؟ هنگام تره این پرسش متوجه شد که خواندن و در اختیار گرفتن کتاب مرد انگلیسی سبب شده که او نسبت به این موضوع حساس حسود شود چرا که بسیار کم حوصله و بد اخلاق به نظر می رسید. با این وجود در جواب مخاطب خود گفت آنها این بیان مشکل را انتخاب کردند تا همه مردم از آن سردر نیاورند این زبان و بیان فقط برای کسانی است که دانش و شعور لازم را برای درک آن دارند و به زحمات و دانسته های خود ارج می نهند و نسبت به حفظ اسرار آن متعهدند و احساس مسئولیت می کنند فکرش را بکن اگر قرار بود همه مردم از سرب طلب بسازند، چندان طول نمیکشید کشید که طلا به خاک مینشست و ارزش خود را از دست میداد رسیدن به ذات اصلی و درک آن فقط کار محققان و جویندگان سخت کوش و علاقمند است که از شعور و هوش سرشار برخوردارند این از دلیلی که مرا به این صحرا کشنده. دلیل واقعی آن که خود را برای دیدار با یک کیمیاگر آماده می کنم تا کلید کت را از او بگیرم و اسرار متون رازگونه را به دست آورم. جوان پرسید، کی و چه وقت این کتاب نوشته شدند؟ چندین قرن پیش. در آن زمان چابخانهی وجود نداشت و غیر ممکن بود مردم بدون دسترسی به کتاب بخواهند کیمیاگری را بفهمند و به رمز و راز آن پی ببرند پس دلیل قابل توجیه این بیان و این گفتار سقیل و این زبان غیر قابل فهم چیست و این همه نقش و نگار و تصویر برای چه منظوری است با وجود سماجت جوان مرد انگلیسی جوابی به این سوال نداد ولی گفت چند روزی است که با دقت حرکت کاربان را زیر نظر گرفتم موضوع تازه و جالبی در آن ندیدم مگر یک چیز و آن اینکه بیش از پیش سخن از جنگ است جوان در فرصتی مناسب از یک روز سرشار از زندگی کتابهای مرد انگلیسی را به او برگرداند و او با كنجكاوی خاصی پرسید چیزی یاد گرفتی با طرح این سوال می خواست پرحرفی کند تا ترس از جنگ را موقتاً فراموش کند. جوان پاسخ داد، فهمیدم که دنیا یک روح دارد، یک جان که کیمیاگران به آن جان جهان یا روح دنیا می گویند. و اگر کسی بتواند به راز آن پی ببرد و درکش کند، خواهد توانست اسرار بیان بدون کلام جهان و آنچه در اوست را بشناسد. فهمیدم که بسیاری از کیمیاگران با حدیث خیش زندگی می کردند و بالاخره موفق شدند راز جان جهان را کشف کنند. سر کیمیا را بفهمند و به اکسیر حیات برسند. زمنان فهمیدم که برای فهم مسائل و مبهمات آنچنانی ضرورتی نداشت که اهل دانش به خود زحمت بدهد و پای پیسوزشان بنشیند تا بر روی زمرد یا به قول شما لوح زمرد مطالب اسرارآمیز بنویسد و از مجموعه آن کلاف سردرگمی بسازد که خود هم در وقت مراجعه به آن به تعبیر و تفسیر نیاز داشته باشد مرد انگلیسی از گفته جوان دلخور شد و از اینکه سالها تحقیق و مطالعه شناخت نشانه‌ها و نمادهای سهرآمیز درک کلمات و عبارات مشکل و به کارگیری وسایل پیچیده آزمایشگاهی و غیره هیچی اکی نتوانست روی جوان اثر بگذارد متعجب شد و با خود گفت او باید بیشور باشد که نتوانست این موضوعات را درک کند کتابهایش را گرفت در صندوقچه گذاشت و بر پشت شطور جایشان داد رو کرد به جوان و گفت برگرد به تماشای کاروان خودت من که از آن چیزی نفهمیدم. جوان به سیر پیرامون خود پرداخت. در عظمت سکوت صحرای بی انتها غرق شد و میدید که جابجایی ماسه حاضر پای کاروانیان چگونه اشکال مختلف میسازد. و به تماشای زیبایی های نهفته مشغول شد و بر فراز عین یاد خود را گم کرد و با خود گفت: هرکس به اقتضای عادت خود موضوعی می آموزد. عادت او که عادت من نیست اگر رسم و رسوم و نحوه فراگیری من مقبول او نیست شیوه او نیز مرا راضی نخواهد کرد با وجود این من و او هر دو در جستجوی حدیث خیش هستیم و این دلیلی است که برایش احترام قائلم وان دیگر شب و روز طی طریق می کرد و هر زمان مردانی با صورت پوشیده به کاروان نزدیک می شدند پیامی می رسندند و می رفتند ساروان که با جوان دوست شده بود می گفت جنگ در بین قبایل شدت گرفته است اگر بتوانیم به آبادی برسیم خیلی شانس آورده ایم حیوانات خسته و وارفته بودند و کاروانیان هم بیش از پیش در سکوت خود فرو رفته بودند در شب سکوت صحرا حراسناک و اعجاب انگیز میشد و نعره یک شطور می توانست همه کاروانیان را به وحشت اندازد چرا که می توانست هم عامل حمله به آنها باشد و هم حامل خبر حرکات نامتجانس شبانه به هر صورت نشانه بود با این همه به نظر نمی رسید ساربان از خبر و تهدید جنگ در حراس باشد. در یک شب سرد، بی آتش و بی ماه، در حالی که چند دانه خورما در دهان می گذاشت، رو کرد به جوان و گفت من زنده ام. و ادامه داد وقتی چیزی می خورم، به هیچ چیز و به هیچ کس فکر نمی کنم مگر به خوردن. وقتی هم حرکت می کنم و راه میروم آن هم برای حرکت است و راه رفتن نه چیز دیگر و این چنین است که خود را زنده می بینم. اگر قرار شود روزی بجنگم، مهم نیست چه روزی باشد و اگر سرنوشت این باشد که بمیرم در آن روز و در آن جنگ خواهم مرد. این خاص تقدیر است و بر آن گردن می نهم نه در گذشته زندگی می کنم و نه از آینده با خبرم. آن چه دارم همین لحظه است. و همین لحظه برای من عین زندگی است. این باید از آن استفاده کنم. چون فقط در این لحظه است که خود را زنده می بینم. و تو، تو هم اگر بتوانی در حال باقی بمانی و در حال زندگی کنی، باید یقین داشته باشی، زنده هستی و شاد و فارغ از زحمت زنده هستی و شاکر از رحمت صحرا را میبینی که لبریز از زندگی است و آسمان پر از ستاره است اگر جنگجویان را میبینی که میجنگند همه و همه معرف یک چیزند و آن اینکه پدیدهای پدیده خاص در صدد توجیه وضع عینی انسان است انسانی که میاندیشد کی و چگونه از زندگی بهره گیرد. اگر حال را از دست بدهد بازنده است. ولی اگر در حال زندگی کند میفهمد که زندگی یک کاروان شادی است، یک جشن و پای کوبی است، یک سرور همیشگی است میفهمد که انسان تنها در لحظه است که زندگی می کند و خود را زنده می بیند. دو شب بعد، زمانی که خواب بر چشمان جوان غلبه می‌کرد، نگاهش به ستارهای رسید که جهت حرکت آنان را نشان می‌داد. به نظرش رسید افق و تر آمده است، چون صدها ستاره کمی بالاتر از سطح صحرا سوسو می‌زدند و بیننده را به سوی خود می‌خواندند. tsarvan گفت: آنجا یک آبادی صحرایی است. پس چرا فوراً به آنجا نمی رویم؟ برای اینکه به خواب احتیاج داریم. خورشید در حال طلوع بود که او چشمانش را گشود. در چشمانداز خود آنجایی را دید که صدها ستاره کوچک در دل شب تاریکی را می شکافدند و به هر طرف چشمک می زدند و رشده ای از نخلهای به صف ایستاده را دید که گویی گستره صحرا را پوشانده بودند. مرد انگلیسی هم بیدار شد و با صدایی که از شعف میلرزید گفت: رسیدیم. جوان در این لحظه کاملا ساکت بود. او سکوت صحرا را در ذهن داشت و از دیدن هایی که به روز جلوه‌ای متفاوت داده بودند، سخت مسرور و راضی بود. تا اهرام هنوز راه درازی در پیش داشت. این صبح شاد هم لحظه بود از لحظه ها، خاطره ای از خاطره ها. بانگهی. همین زمان زمان نورسیده با قابل لمس مگر نه این که حال بود، شادی بود، جشن بود، چیزی که ساربان از آن سخن می گفت. تصمیم گرفت با توجه به همه آنچه در گذشته فرا گرفته. و همه رؤیاهای شیرینی که برای آینده در ذهن خود نشانده بود در لحظه توقف کند در حال زنده باشد و زندگی کند روزی این چشمانداز پوشیده از هزاران نخل با همه زیبایی بدل به یک خاطره می شود ولی در این لحظه مفهوم سایه و آب را دارد و پناهگاهی است در برابر جنگ همانگونه که فقان یک شطر در شب میتوانست نشانه بدی باشد و حمله راهزنان را سبب شود، نخلها هم میتوانند نشانه خوبی باشند. نوید آب و سایه و زندگی را در صحرا بدهند. اندیشید چه زیباست بیان یگانه، زبانی که دنیا خود را با آن بیان می کند؟ کیمیاگر با دیدن صدها انسان و حیوانی که صحرا را پیموده و وارد آبادی شده بودند با خود گفت وقتی حرکت زمان تند می شود کاروان هم شتاب می گیرند قباری تیره آسمان را تیره و تار کرده و بر چهره خورشید سوزان صحرا سایه انداخته بود کاروان بود که رسید ساکنان آبادی با دیدن تازه از راه رسیده ها فریاد می زدند، شادی می کردند، می و خود را به آنان می رسندند. بچه ها با دیدن این موج کاروان و این فوج خارجی هیجان زده با بیتاب از شعف به هر سو جست می زدند. و کیمیاگر در آرامش خود می دید که رئیس قبیله افرادش را جمع میکند تا به کاروان سالار بپیوندند و به اتفاق در شورای قبیله به گفتگو درباره حوادث بنشینند این به هیچ وجه برای کیمیاگر جذاب نبود او توانسته بود شاهد حرکت گروهی انسان و حیوان در زمان باشد یا شاهد عبور دارا و ندار از زهرا همچنین توانسته بود شاهد عبور کاروانها از صحرایی باشد که با وزش باد ماسههایش جابجا میشدند. او حرکت را میدید و سکون را. آمد و رفت کاروان را که نمایشی از حرکت بود و هیهو و هم جواری آبادی و صحرا را که نمایشی دیگر از سکون و سکوت بود. باد را هم میدید که با وزش خود تلهای کوچک و بزرگ ماسهای را جابجا می‌کند ولی ماهیت ماسه و صحرا تغییری نمی‌کند و صحرا همان شنزاری باقی میماند که از دوران کودکی به یاد داشت با این وصف کیمیاگر با دیدن مسافرانی که از سرزمین زرد با آسمان آبی لاجوردی عبور کرده بودند و صفح طویل نخل سبز را مقابل خود میدیدند نمی‌توانست مانع بروز احساس خود شود. احساسی آمیخته با خوشحالی که در عمق وجود و در بستر قلبش جاری میشد. و فکر کرد خدا صحرا را فرید تا انسان از دیدن سایه نقلها شاد شود. سپس اراده کرد که از ذهنیات بپریزد و به اینیات بپردازد و ذهن خود را بر موضوعات عملی تر متمرکز کند. از نشانه ها دریافته بود، مردی همراه کاروان خواهد بود که او ناگزیر است قسمتی از اسرار دانش خود را در اختیارش بگذارد. او را نمی شناخت، ولی چشمان پرتجربه و تیزبینش با نگاه اول آن مرد را از دیگر همراهان کاروان متمایز می کند، به خواهد شناخت اما امید داشت که این شخص هم به اندازه شاگرد قبلی باهوش و مستعد باشد در خود غرق شد و گفت نمیدانم چرا این موضوعات حتما باید از راه دهان به گوش منتقل شود دلیل آن را فقط در حقیقت اسرار نمیدید. چرا که می آفرید آفریدگار همه اسرارش را به سادگی برای همه آفریده هایش بیان کرد و بالاخره تنها یک استدلال یافت این گونه موضوعات باید با چونین شیوهی منتقل شوند. از دهان به گوش آنها کنش هستی ناب هستند و بدیهی است که چنین شکلی از هستی در قالب تصویر و نوشته نمی کنجد. زیرا انسان همه وقت خود را به تحسین تصویر یا نوشته میگذارد و از بیان دنیا قافل میشود کاروانیان را بلافاصله فاصله به حضور رؤسای قبایل مختلف فایوم بردند. جوان با مقایسه آنچه فراروی خود می‌دید، با آنچه در تصور داشت به چشمهای خود هم شک کرد. به جای دیدن یک حلق چاه و مقداری نخل در اطراف تعریفی بود از آبادی در صحرا که در یک کتاب داستانی خوانده بود. منطقه گسترده ای را دید که از دهکده های اسپانیا وسیعتر و بزرگتر بود. در برابر چشمانش آبادی با بیش از 300 حلقه چاه و 5 هزار نخل بارآور بود و تعداد زیادی چادرهای رنگی که در نخلستان پراکنده بودند. مرد انگلیسی بیقرار دیدار کیمیاگر گفت گویی قسمتی از افسانه هزار یک شب است. به زودی بچه آبادی دور کاروانیان جمع شدند و با وسواس و کنجکاوی به سیورسات کاروان، به محموله، به حیوانات، به شترها و مسافرانی که از راه رسیده بودند یا به تعنی می رسیدند نگاه می کردند. مردان آبادی کنچکاو به سرنوشت جنگ و حمله احتمالی با مسافران به بحث نشسته بودند. زنان هم، با دیدن پارچه های رنگ و سنگ های زینتی درخشان، بر سر قیمت آنها با بازرگانانی که از راه رسیده بودند، چانه میزدند. زدند. سکوت سهرا پدیدهی فراموش شده بود. به نظر می رسید، یک خواب بود، یک رؤیا، یک دنیای تخیلی در گذشته‌های دور. هیاهو در آبادی پدیدهی نو در لحظه بود. به نظر می رسید که شادی و سرور و یک دنیای عینی قابل لمس در حال بود و مسافران بی خیال از آنچه گذشت همراه مردم آبادی آواز می خاندند، می فریاد می کردند، می خندیدند. همه کس و همه چیز بلند بلند حرف می زدند. گویی که کول بار دلشوره ها و نگرانی ها را بر دروازه آبادی آویخته بودند یا از جهانی دیگر، جهانی خیالی، به دنیایی متفاوت، دنیای واقعی رسیده بودند. مردم شاد بودند و راضی. ساربان در میان آن هم همه، قیل و قال و ازدهام، جوان را گوشه کشید و گفت با وجود بینی ها و احتیاطی که تا دیروز قبل از رسیدن به آبادی معمول بود، لازم است بدانی در سنت ما اعراب بادی نشین، آبادی های صحرا، هنگام بروز اختلاف و احتمالا جنگ سرزمین بی طرف به حساب می زیرا در آن مواقع تنها زنان و بچه ها هستند که در چادرشان به زندگی عادی ادامه می دهند و هیچ گونه مشارکتی در جنگ ندارند. حتی شنیده و دیده شده است که دو قبیله از دو آبادی نزدیک با هم در جنگند ولی میدان جنگشان فقط و فقط صحرای بین دو آبادی است و هیچگاه دامنه آن را به همان دلیلی که گفتم داخل آبادی خود نکشندند. بنابراین آبادی سرزمینیست بیطرف پناهگاهی برای زنان و بچه ها که باید مسون از عوارض جنگ و تعرضات جنگ جویان باشد. کاروان سالار افرادش را جمع کرد و دستوراتی به آنان داد. تا زمانی که جنگ بین قبایل ادامه دارد، کاروان و کاروانیان در آبادی خواهند موند. مسافران و افراد قافله در چادرهای ساکنان آبادی که به حکم قانون میهمان نبازی در اختیارشان قرار میگیرد، ساکن می شوند و شب و روز مدت اقامت خود را سپری می کنند. زمنن به نگهبان قافل دستور داد، صلاح خود را به افرادی که از سوی رؤسای قبایل تعیین می شوند، تحویل دهند. این هم یک قانون زمان جنگ بود که آبادی را از ریخت و پاش جنگی دور نگه می داشت و نمی گذاشت جنگ جویان از آن به عنوان پناهگاه استفاده کنند. جوان با تعجب دید که مرد انگلیسی از جیبش یک اسلحه کوچک کمری از جنس کروم درآورد و به شخصی که مشغول جمعآوری سلاح بود تحویل داد. پرسید: چرا یک تپانچه با خود داشتید؟ مرد انگلیسی رو و راضی با سیمایی که از شادی موج میزد گفت: جستجوهایم پایان گرفت، به مقصد رسیدم و آسوده خیالم. تپانچه را برای دفاع از خود در مقابل افراد ناباب و اتفاقات ناگوار حمله می کردم و در این آبادی به آن نیازی نیست. و جوان در رؤیای گنج خیش شد. میدید هرچه بیشتر به آن نزدیک می شود، حوادث و اتفاقات در و مسائل مبهمتر و مشکلتر می شوند. آنچه پادشاه پیر از آن به عنوان شانس مبتدیان یاد می کرد، دیگر دیده نمی میدانست که زمان، زمان عبور از یک مرحله است. زمان آزمایش است. زمانی که سخت کوشی و لجاجت خود را بروز دهد. زمانی که تیز هوشی و جسارت خود را ایان کند و نشان دهد که با حدیث خیش است. همچنین نباید شتاب زده باشد و کم حوصله حرکت با شتاب ممکن است خطرات احتمالی در پی داشته باشد و مانع دیدن نشانه‌هایی شود که خداوند در جای جای افق او قرار داده است اندیشید نشانه‌ها آفرید آفریدگارند و اوست که آنها را در مسیرش قرار می‌دهد از خود متعجب شد که فکر می‌کرد نشانه ها روی داد یا مظهری از جهان اینیند و همانند خوابیدن، خوردن، جستجوی عشق و عاشقی یا پی کار و شغلی رفتن و به دنیای مادی تعلق دارند. در حالی که میدید این نشانه ها بیانی هستند متفاوت که خداوند برای هدایتش کار برده تا او بداند چه می خواهد و چه باید بکند. بار دیگر به خود گفت کم حوصله و پرشتاب مباش و به روایت ساربان اندیشید که میگفت حوصله کن زمانی که گرسنگی خود را سیر کن شتاب مکن زمانی که نیاز به تحرک داری حرکت کن روز اول به رفع خستگی گذشت همه خوابیدند حتی مرد انگلیسی جوان کمی دورتر از دیگران خود را در چادری یافت که پنج جوان همسن سال خودش هم در آن بودند. آنها بچه های صحرا بودند، پاک و نیالوده. آنجا آمده بودند تا افسانه شهرهای بزرگ را بشنوند و او از ماجراها و اتفاقات زندگی چوبانیش گفت. انگامی که می‌خواست از تجربیات خود در بلور فروشی تعریف کند مرد انگلیسی وارد چادر شد و در حالی که همسفرش را از آنجا بیرون می برد، گفت تمام نیمروز گذشته را پی تو گشتم لازم است به من کمک کنی تا مکانی را که کیمیاگر در آن زندگی می کند پیدا کنم او سعی کرده بود کیمیاگر را بر اساس تصورات ذهنی و داده های فکریش پیدا کند که یک کیمیاگر در آبادی متفاوت از دیگران زندگی میکند زیر چادر خود اجاقی مشتعل با شعله های همیشگی دارد و با این تصور به هر سرک کشید به هر راه قدم گذاشت جستجوی بسیار و کوشش فراوان کرد ولی همه بی‌نتیجه بود اندیشید آبادی گسترده تر از آن است که تصور میکرد و چادرهای آن بیشتر از آنچه در تصور داشت وقتی به اتفاق همراهش کنار چاهی از چاههای آبادی نشست گفت تقریبا یک روز کامل را از دست دادم جوان جواب داد شاید بهتر بود قبل از هر تصمیمی پرسجو می کردی مرد انگلیسی محتاط بود و به هیچ وجه علاقه نداشت دیگران از انگیزه حضور او در فایوم مطلع شوند و از این کار پرهیز داشت. پس از اندک زمانی موافقت کرد و از جوان خواست برای پیدا کردن کیمیاگر به او کمک کند. زیرا او بیشتر به زبان عربی آشنایی داشت و بهتر از او میتوانست به آن زبان سخن بگوید. بنابراین جوان به اولین زنی که به چاه نزدیک شد تا مشکش را که از پوست گوسفند درست شده بود پراب کند رو آورد. سلام کرد و گفت، کیمیاگری که در این آبادی زندگی می کند در کجا ساکن است؟ زن پاسخ داد، هرگز چون این موضوعی را نشنیدهام و چون این شخصی را نمی شناسم و فلفور گذاشت و گذشت. در همان وقت جوان به خود هشدار داد. نباید با زنانی که جامعه های سیاه بتن دارند حرف بزند. آنها ازدواج کردند و شوهر دارند. باید به سنت احترام گذاشت مرد انگلیسی العاده افسرده بود همه زحمات و مرارتها و سرانجام سفرش را بی نتیجه و پوچ می دید قمگین بود به خلق مینگریست و همراهش هم همانند او خود را غمگین حس می کرد آن مرد هم در جستجوی حدیث خیش بود مگر نه اینکه پادشاه پیر گفته بود؟ اگر کسی در جستجوی چیزی باشد، کل کائنات میکوشند تا او به آنچه میجوید دست یابد. از خود پرسید، مگر میشود که پادشاه هم اشتباه کند؟ جوان به مرد انگلیسی گفت، تا اینجا به هیچ وجه از کسی نشنیدم که از کیمیاگر حرفی یا سخنی به زبان رانده باشد. با وجود این خواهم کوشید به شما کمک کنم. در چشمان مرد انگلیسی برقی دیده شد و نگاهش جرقه ای زد و گفت خوب معلوم است که کسی در اینجا نمیداند داند کیمیاگر کیست و کیمیاگری چیست بهتر است در جستجوی کسی باشید که بیماری دیگران را شفا می دهد. زنان بسیاری پوشیده در جامعه سیاه آمدند و مشکهایشان را پراب کردند و رفتند در هر آمده شد مرد انگلیسی اصرار داشت جوان از آنان سوال کند ولی او گفتگو با یک زن سیاپوش را دور از اخلاق و سنت میدانست. بنابر از طرح هر سوالی تفره رفت تا سرانجام مردی به چاه نزدیک شد و جوان از او پرسید در این آبادی کسی را میشناسید که بیماران را شفا دهد مرد که از دیدن این خارجی ها هول کرده بود و ترسی در چشمانش می در جواب گفت خداست که همه بیمارها را شفا می دهد. شما دنبال جادوگر هستید؟ سپس چند آیه از قرآن را زیر لب نجوا کرد. راهش را گرفت و رفت. مرد دیگری از راه رسید. پر سن و سال بود و بر جبینش خطوط تجربه و گذشته سالیان دیده می شد. سطل کوچکی حمل می کرد. از او هم سؤال شد پیرمرد عرب در جواب سؤال دیگری مطرح کرد در اینجا در این آبادی چرا در جستجوی چنین شخصی هستید پی کسی که بیماران را شفا میدهد؟ چون این دوستم رنج سفر چندین و چند ماهی را به خود هموار کرده است تا به این آبادی بیاید و با آن شخصی که در جستجویش هستیم ملاقات کند. پیرمرد پس از مروری در ذهن و اندکی مکس گفت اگر چون این شخصی در این آبادی ساکن بوده است حتما مرد توانا و معروفی بوده و مطمئنا خیلی ها هم را می شناختند. حتی... حتی رؤسای قبایل. آنها هم میبایست در صورت نیاز به او مراجعه میکردند و این او بود که تصمیم میگرفت رؤسای قبایل را بپذیرد یا نه. به نظر من بهتر است مدتی در اینجا بمانید تا جنگ تمام شود. آنگاه با کاروان بازگردید و بروید و سعی کنید در زندگی مردم ساده این آبادی هم کنجکاوی نکنید. ولی مرد انگلیسی زیربار بار چون این نمیرفت، از اطلاعات خود پیرامون کیمیاگر مطمئن بود. این آبادی را هم بی هیچ تردیدی محل زندگی او می دانست. راه خود را میرفت، حرف خود را می زد و اصرار داشت به هر وسیله علامتی، نشانی، رد پایی از کیمیاگر به دست آورد. در این زمان بود که شبه دختری، نمایان شد دختر جوانی با ای رنگین بر برشانه و دستمالی مالی بر سر که قسمتی از سر و گردن او را پوشانیده بود و صورتش به تمامی نمایان بود جوان به او نزدیک شد که در مورد کیمی آگر سؤال کند ولی به نظرش رسید که نخلستان شاد شد آسمان رنگ گرفت زمان متوقف کردید گویی که روح جهان با همه عظمت خود، با همه رمز و راز بیان بدون کلام خود بر او ظاهر شد. وقتی نگاهش را دید، خورشید را هم دید که به شب می نشیند و برق نگاهی را که از چشمان سیاه و همیشه مرتوب رنگ در افق طلوع می کند. لبانی را دید، فرزانه و نیمه باز، مردد بین سکوت و لبخند، بر نه روشن، نه تاریک، نه سوخته، نه بیرنگ، و دریافت، دریافت که راز بیان جهان چیست، و با ارزشترین پاره قابل فهم آن برای تمامی انسانها کدام است. قسمی را که انسان در وجود حیجن زده خیش احساس می نماید، در روح حراسان خود میبیند و در قلب ملتهب خود حس می کند نامش عشق بود چیزی قدیمتر از آفرینش انسان و پیدایش صحرا. چیزی که با درخششی متفاوت و نیروی رازگونه خود در افق احساس انسانها با تلاقی دو نگاه طلوع می کرد همانند دو نگاه و نگاه بر لب چاه به بهانه آب یا هر بهانه دیگر که به هم رسیدند لبانش به لبخند نشست و این علامت بود نشانه بود ای که جوان به انتظار آن همه زندگی خود را رها کرده و به دنبالش در کتاب ها ها و حقایت ها جو کرده بود در اندلس، در دشت ها همراه میشها در تنجه، در فروشگاه بین همه ها، در سفر در سایه کش قافله یا در سکوت باشکوه صحرا همه جا و همه جا در پی آن رفته بود و سرانجام در یک شهرک صحرایی در کنار نخلستان لب چاه، به بهانه آب یا هر بهانه دیگر به آن رسیده بود. لبخند رسیده بود لبخندی که نشانه بود خود زندگی بود یا بیان جهان بود بیان بدون کلام بیانی روشن بود و بدین گونه است که جهان نیازی نمیبیند تا حرکت مستمر خود را به سوی بی نهایت توجیه کند یا توضیح دهد جوان در این لحظه بدون اینکه کلمههای مبادله شود حرفی زده شود یا سخنی گفته شود فهمید که در مقابل زن زندگیش قرار گرفته است و تصور کرد که او هم باید فهمیده باشد و چنین احساسی را درک کرده باشد. از این احساس خود مطمئن بود مطمئن تر از همه دانسته ها, شنیده ها و دیدنی هایی که در دنیا بودند حتی بیش از گفته ها و اندرزهای والدینش یا پدر بزرگ و مادر بزرگش که معتقد بودند اول باید دوید به امکانات و پول رسید بعد سراغ زن، انتخاب و ازدواج رفت. کسی که چنین این می بیشک اسرار جهان را هرگز نشناخته است و به بیان آن آشنا نیست. زیرا هنگامی که در فضای رازگونش فرو رفت و غرقش شد، رفته رفته چگونگی اسرار آن برایش قابل دیدن می شود، قابل درک می شود و می تواند بفهمد همیشه در دنیا کسی در انتظار دیگری است. چه در عمق دشت های اندلوس، چه در گستره صحرای پرسکوت و چه در دل شب های پرتب وقتی او به دیگری می رسد و دو نگاه به هم می نشیند، همه لحظات گذشته و همه رویاهای آینده رنگ می بازند و کم نور می شوند. فقط آن لحظه باقی می ماند. ای که گویای حال است و بازگوی واقعیتی که گویی نگاهی همه آن را از پیش دید و دستی همه آن را از پیش نوشت. اما دستی که عشق را پدید آورد و عشق بزرگ را در دل نیمه دیگر انسانی جای داد که تلاش می کند، فکر می کند، استراحت می کند و زیر آفتاب به جستجوی گنج خود میرود. چه اگر چون این نبود رؤیاهای موجودی به نام انسان مفهومی نداشت. با خود گفت مکتوب. مرد انگلیسی که نشسته بود بلند شد. همراهش را گرفت و تکان داد. برو برو از او بپرس جوان. به دختر جوان نزدیک شد. لبخندی تازه بر لبانش نقش بست. او هم خندید، پرسید، اسم تو چیست؟ دختر جوان در حالی که نگاه به پایین داشت گفت، اسم من فاطمه است. اسم است نامی که برخی از زنان سرزمینی که از آن می آیم نامیده می شوند. فاطمه جواب داد، اسم دختر پیامبر است، و به وسیله جنگجویان ما به سرزمین شما برده شد. آن دختر جوان ظریف و پرطراوت با قرور خاصی از جنگجویان حرف می زد. مرد انگلیسی در حاشیه و ناآرام اصرار داشت از او سوال شود و جوان بالاخره پرسید آیا او کسی را می شناسد که بیماری بیماران را شفا بخشد؟ دختر جواب داد همان مردی که اسرار جهان را میداند و با جنهای صحرا محشور است و حرف میزند جنها همان همزادهای خوبی و بدی بودند و دختر جوان با حرکتی دلنشین جنوب آبادی را نشان داد جهتی که آن شخصیت ناشناخته در آن زندگی میکرد سپس سبویش را پر آب کرد و رفت و مرد انگلیسی هم در جهتی که نشان داده شده بود به جستجوی کیمیاگر رفت. جوان مدتی در کنار چاه نشست. روزی را به یاد آورد که باد همراه خود بوی زن آورد. بوی این زن را زنی را که دوست داشت بدون اینکه بداند وجود دارد. این پدیده مچول عشقی بود غریزی. و کششی بود فطری نسبت به زن که خود عاملی شد تا او به راز جهان برسد و آن را کشف کند فردای آن روز به سوی چاه برگشت تا شاید آن دختر با سبویش از راه برسد وقتی مرد انگلیسی را در آنجا دید که به تماشای صحرای ایستاده سخت متعجب شد مرد انگلیسی با دیدن او گفت همه بعد از ظهر و غروب را به انتظار کیمیاگر و او زمانی آمد که هوا گرگمی شد و به تاریکی رفت و اولین ستاره در آسمان صحرا نمایان شد و من همه ماجرا همه انگیزه ها و همه خواسته خود را برایش گفتم و از من پرسید که تا کنون از صرب طلا ساخته ام یا خیر در جوابش گفتم که این دقیقا همان چیزی است که آرزوی دانستنش را دارم سپس رو کرد به من و گفت برو برو سعی کن چیز دیگری بر کلماتش اضافه نکرد فقط گفت برو سعی کن جوان ساکت بود و در ذهن خود گذشته را مرور می کرد اندیشید که مرد انگلیسی همه مشکلات راه را بر خود هموار کرد و از صحرا گذشت تا سخنی را بشنود که خود از قبل میدانست. به یاد آورد که خودش هم برای شنیدن سخنی مشابه و رسیدن به نتیجه همانند شش رأس گوسفندش را به پادشاه داده بود. به مرد انگلیسی گفت، خوب، سعی کنید. معلوم است، کاریست که حتما انجام می دهم و از همین حالا هم شروع خواهم کرد. و رفت. اندکی بعد از رفتن آن مرد، فاطمه از راه رسید تا سبویش را، پر آب کند جوان به او گفت به اینجا آمدم که تو را ببینم و موضوع کاملا ساده ای را با تو در میان نهم علاقه مندم که تو با من ازدواج کنی چون دوستت دارم دختر جوان لرزید و سبویش از آب پر شد سرریز کرد و و جوان ادامه داد هر روز در اینجا به انتظارت خواهم نشست از صحرا گذشتم تا در جستجوی گنجی باشم که نزدیک اهرام است. خبر آوردند که جنگ است. در آن لحظه جنگ برایم زحمت بود و بدبختی. ولی اینک که در مقابل تو ایستاده هم می بینم که جنگ برایم رحمت آورد و خوشبختی. دختر جوان گفت، بالاخره روزی جنگ هم تمام می شود. او، نخل های آبادی نگاه کرد در آنجا خود را چوب دید با تعدادی گوسفند و فاطمه را که برایش بیش از گنج می‌ارزید دختر جوان گفت جنگجویان هم در جستجوی گنج خود هستند جوان با خود اندیشید او چگونه توانست فکرش را بخواند و زنان صحرا از جنگجویان خود راضی‌اند و مغرور پس دوباره سبویش را از آب پر کرد و رفت جوان به کنار چاه می رفت و به انتظار آمدن فاطمه لحظه شماری می کرد. برای او از زندگی چوپانی خود داستانها گفت و از چگونگی ملاقاتش با پادشاه پیر و مدتی که در بلور فروشی کار می کرد. همه و همه را با ذکر جزئیات و لحظات خوب و بدش بازگو کرد. آنها دوست شده بودند. و برای جوان، زمان بجز همان پانزده دقیقی که با هم بودند به جهنم تبدیل شده بود و روزها سخت طولانی. یک ماهی بود که در آن آبادی به سر می برد. یک روز، کاروان سالار همه کاروانیان را برای مذاکره جمعی فراخند و گفت ما نمیدانیم که چه وقت جنگ تمام خواهد شد و چه وقت خواهیم توانست به سفرمان ادامه دهیم. زد خرد بین متخاصمان شاید سالها به درازا بکشد. در هر دو سو جنگجویان رشید و جسوری وجود دارند و راضی به ادامه جنگند. جنگی است بین نیروها برای به دست گرفتن قدرت. و هر دو طرف با اعتقاد خود با تبسن به الله میجنگند و تا وقتی که یاور الله باشد، چون این جنگی به درازا خواهد کشید و سالها ادامه خواهد داشت، چون الله در آن واحد در کنار هر دو طرف است مردم متفرق شدند و جوان غروب همان روز فاطمه را دید و داستان فراخانی را برایش تعریف کرد دختر جوان به او گفت در دومین دیداری که داشتیم تو از عشقت سخن گفتی سپس چیزهای زیبا به من آموختی و مرا با بیان بدون کلام و جان جهان آشنا کردی رفته رفته همه آنها من را پاره ای از تو ساختند جوان صدای او را می شنید و آهنگش را زیباتر از وزش نسیم صبحگاهی نخلستان میدید مدتی است کنار چاه آمده در انتظارت تا بیایی از گذشته چیزی به یاد ندارم و بر پایه رسم و رسوم و آداب و آدات هم نمیدانم که مردان از زنان صحرا چه انتظاری دارند و مایلند که آنان چه رفتاری داشته باشند. وقتی خیلی کوچک بودم خواب دیدم که صحرا بهترین حدیه زندگیم را برایم خواهد آورد و این هدیه که بالاخره به من داده شد تو هستی. جوان خواست دستش را بگیرد ولی فاطمه دسته های را گرفت. فاطمه گفت، تو برایم حرفها داشتی، از خودت گفتی، از پادشاه پیر و از گنج. تو با من از نشانه حرف زدی، از بیان بدون کلام و روزهای پردرد و رنج. همه و همه گفته هایت سبب شدند تا در مقابل رویدادها سرسخت شوم و از هیچ چیز نهراسم. چون آنها را نشانه دیدم که تو را به من رسانیدند. اکنون من جزی از زندگیت شدم، جزئی از خودت، از رؤیاهایت و از حدیث خیش. به همین دلیل هم مایلم که تو به راحت در جهتی ادامه دهی که به خاطرش تا به اینجا آمده ای. اگر لازم است به انتظار خاتمه جنگ بمانی، بمان. ولی اگر باید زودتر راه خود را در پیش بگیری و بروی، برو. برو به سوی حدیث خیش تپه‌های شنی با وزش باد جابجا می‌شوند ولی صحرا همیشه صحرا باقی میماند. و همین است افسانه اشق ما و گفت مکتوب و ادامه داد اگر من قسمتی از حدیث تو باشم روزی باز می گردی وقتی او رفت جوان خود را اندوخین یافت به مردم ساده و مهربانی که شناخته بود فکر کرد. به چوپانها، چوپانهایی که ازدواج کرده بودند، نمیتوانستند خود را قانع سازند که به فراهم آوردن ضروریات اولیه بپردازند و مرتب در دشت بودند. در صورتی که ضرورت عشق حضور است در کنار آنچه چه دوست میداریم. فردای آن روز، همیان چرا که در ذهن مرور کرده یا اندیشیده بود برای فاطمه تعریف کرد و دختر جوان گفت صحرا مردان ما را میگیرد و به ندرت باز میگرداند و ما هم به تقدیر گردن مینهیم و از آن پس آنها را در عبری می میبینیم که میگذرند و باران نمی دهند در جمع جاندارانی که میان صخره پنهان میشوند و رو عیان نمیکنند یا در آب پرنعمتی که از اعماغ زمین بیرون میزند جاری میش و زندگی میآورد و و آنها ممسحری از همه چیز میشوند جزئی از کل یا عین جان جهان چند نفری هم بر میکردند و زنان صحرا با دیدن آنها با همه وجود خود شادی می کنند و بارغی امیدی در قلبشان گسترده می شود که شاید شاید روزی هم مردانی که آنها به انتظارشان چشم به صحرا دوخته بودند برگردند پیش از این وقتی زنی را در انتظار می دیدم به خوشبختی او رشک می بردم و آرزو می کردم همانند او باشم اکنون می بینم دیر نیست که به آرزویم برسم من یک زن صحرا هستم، مسرور و مقرور و مایلم که مرد من مثل باد بادی که دانه های ماسه را در صحرا جابجا می کند سبک بال و آسود خیال حرکت کند و آزاد باشد. آزاد و مایلم که مرد من به من امکان دهد که او را در صحرا بجویم در آب و در ماه جوان به دنبال مرد انگلیسی رفت که با او حرف بزند. بی آنکه که متعجب شود، دید که اجاقی کوچک در کنار چادرش ساخته است. اجاق عجیبی بود. روی آن انبر بود و لوله و ابریق شیشه‌ای. مرد انگلیسی اجاق را دائما با هیزم و متپاله شعلهور مینمود و صحرا را تماشا می‌کرد. چشمانش درخشان از زمانی بود که در کتابهایش قرق می شود. گفت، آنچه می بینیم مرحله نخست کار است. باید گوگرد ناخالص را تجزیه کنم و در این راه نباید از شکست بترسم. وحشت از شکست به دورهی مربوط است که تا به امروز مانع شده به اسرار خلقت پی ببرم. و حالا به کاری مشغولم که می از ده سال پیش هم شروع کنم. صورت خوشحالم که برای رسیدن به چنین روزی بیست سال دیگر منتظر نشدم. و در حالی که به صحرا نگاه می کرد شروع کرد به گذاشتن چوب در اجاق و بازی با آتش. جوان مدتی در کنار مرد انگلیسی بر جای ماند و هنگامی که خورشید صحرا را به خون نشاند و هوا گرگمی شد او هم در خود تمایل غریبی دید که به صحرا برود، تا شاید در سکوت آن بتواند آرامشی بجوید. بدون هدف راه میرفت، بیان که نخلستان آبادی را از نظر دور کند. به صدای باد گوش میداد و جابجایی سنگ ریزه ها را در زیر پاهایش حس می کرد. هر از گاهی هم تکی صدف می دید و به خود می گفت که این صحرا در زمانهای دور می بایست در دریای گسترده و عظیمی بوده باشد روی سنگ بزرگی نشست خود را در اختیار افقی که در مقابل داشت واگذاشت تا در آن فرو رود قرق شود نمی توانست عشقی در دل داشته باشد که هم نشین نباشد اما فاطمه دختری از زهرا بود و اگر قرار شود پدیدهای به او کمک کند بیشک صحرا خواهد بود رها بی آنکه به چیزی بیاندیشد شد لحظات را میگذراند تا اینکه متوجه شد چیزی آن بالا در حرکت است و آسمان که نگاه کرد پرواز دو شاهین را بر فراز سرش در آسمان دید شاهینها را دید و تصویری را که با پرواز آنان بر سینه آسمان نقش میبست در نگاهی گذرا و سطحی حرکت آنان مجموعه خطوطی نامرتب را القا کرد. ولی همان خطوط همان نقوش همان تصاویر برای او به طور حتم باید مفهومی داشته باشند که به سادگی موفق به فهمیدنشان نمیشد تصمیم گرفت همه ی حرکات آنان و تغییراتی را که در پرواز خود میدهند زیر نظر بگیرد شاید از آن طریق بتواند پیام‌هایی دریافت کند شاید هم صحرا بتواند به او کمک کند کمک به عشقی که در اختیار نیست احساس کرد به خواب می میرود رخوتی در خود دید ولی قلبش گواهی نمیداد که به خواب رود می بایست خود را رها کند گفت این من هستم که به محدوده رازگونه بیان دنیا نفوذ میکنم و آن نزدیک می شدم ای که همه دقایق آن مفاهیم خود را دارند از اینجا در این پایین تا به آنجا در آن بالا تا پرواز شاهینها هر لحظه آن معنایی دارد و مفهومی را در خود نهفته است اشقی که در دل داشت خوشنودش می کرد و فکر میکرد، کرد هنگامی که عاشقیم پدیده ها را با مفاهیم بیشتری میبینیم. ناگهان یکی از شاهینها ها چرخی زد و با سرعت به پایین متمایل شد تا به دیگری حمله کند. در این لحظه بخصوص ناگه تصویر کوتاهی شبیه یک وحی یا الهام در ذهن جوان ظاهر شد. گروهی مسلح شمشیر به دست به آبادی حمله کردند. تصویر بلافاصله فاصله و به سرعت از نظرش دور شد ولی اثر زنده ای از خود بر جایی گذاشت. از ها سخن بسیار شنیده بود. خود او هم چند تایش را در روزهای گرم صحرا دیده بود و میدانست که تمایلاتی هستند ذهنی که با ماسه صحرا همنشین و عینی شدند. و او مت تمایلی نداشت که گروهی مسلح را حمله ور به آبادی ببیند. خاست تصویر نقش شده را از ذهنش پاک کند و به فراموشی سپارد و به خلسه برگردد. سعی کرد اندیشه را دوباره بر روی سنگ ها و ماسه های سرخ صحرا متمرکز کند ولی چیز گنگ و ناشناخته در قلبش میدوید و مانع تمرکز وی میشد. پادشاه پیر به او گفته بود همیشه نشانه ها را دنبال کن به فاطمه فیتر کرد و سپس به تصویری که در رؤیا به او الهام شده بود ای به گستردگی همه ابرهای تیره بیباران در خود احساس کرد که بی هیچ مانعی بر قلبش سایه افکنده بود بلند شد و به سوی نخلستان بیش رفت یک بار دیگر جا به جای پدیده ها را با بیانی متفاوت حس می کرد. اندیشید اکنون آبادی پر پرخطر می شود و امنیت در جانب سهرا دارد. بود و آفتاب را میدید که غروب میکند جوان را هم دید که از پشت یک تپه شنی به سوی او میآمد نزدیک شد و به او گفت به من الهام شده است که یک گروه مسلح به آبادی نزدیک می شود ساروان جواب داد صحرا پر از تصاویری است که قلب مردان می ریزد و سبب توهمات مختلف می شوند ولی جوان برایش از پرواز شاهین گفت و از ای که به جان جهان نزدیک شده بود. ساربان دریافت همراهش چه میخواهد بگوید. جوابی نداد. او میدانست که هر پدیدهای در روی زمین هرچند بی اهمیت می تواند بازگوه کننده افسانه همه روی دادها باشد. وقتی کتابی را باز می کنیم و صفحهی را پیش رو داریم، مهم نیست چه صفه‌ای وقتی خطوط دست کسی را به بررسی می‌گذاریم یا به پرواز پرندگان خیره می‌شویم یا حتی ورق بازی را به دست می‌گیریم و به هر چیز و هر کار دیگری دست می‌زنیم به درستی در جستجوی رابطه‌ای هستیم رابطه‌ای بین خود و کسی یا چیزی دیگر که با یک نگاه یا لمس آن در درمی‌یابیم که کس یا چیز دیگری در مقابلش در حال زندگی است در حقیقت اتفاقات و رویدادها نه از خود چیزی بروز میدهند و نه در صدد توضیح خود هستند. این انسانها هستند که با مشاهده آنها با لمس آنها به نقششان پی میبرند و از رازشان آگاه می شوند و رفته رفته به جان جهان نزدیک می گردند. در صحرا آدمهایی زندگی میکردند که به سهولت قادر بودند در جان جهان مستحیل شوند ما آنها را با نام پیشگو میشناسیم زنها و پیرمردان از آنها وحشت داشتند به ندرت جنگ جنگجویی تن به طالب بینی آنان میداد چون رفتن به جنگ فی نفس مسئله بود و پیشگویی و دانستن زمان مرگ هم موضوع دیگر بنابراین چون این سوالی نمی توانست برای پیشگویان مطرح و قابل بررسی و پاسخدهی باشد. وانگهی، جنگجویان تعم مبارزه و حیجانات ناشناخته را ترجیح میدادند و آینده را هم جزئی از سرنوشت خود میدانستند و اعتقاد داشتند که از ازل همه چیز با دست او نوشته شده است. بنابراین به تقدیر دل بسته بودند و نسبت به جبر سرنوشت مؤمن بودند. به علاوه آنها در حال زندگی می کردند و به خوبی آگاه بودند که حال لبریز از اتفاقات غیرمنتظره است. بنابراین می بایست مواظب رویداد رویدادهایی باشند که به نحوی در مسیرشان ظاهر می شدند. چه؟ ضرب شمشیر کشنده یک دشمن باشد یا لغزش اسب در میدان جنگ در هر حال هر رویداد میتواند هم از مرگ بگوید و هم از زندگی ساربان جنگجو نبود ولی اتفاق افتاده بود که به پیشگو مراجعه کند بسیاری از آنان به او کلیاتی از زندگیش گفتند و بعضی هم به دروغ بافی و لافزنی پرداختند و موضوعات دروغ و مجعولی تحویلش دادند تا روزی یکی از مسنترین و مخوفترین آنها از او پرسید چرا میخواهی آینده را بشناسی؟ شناسی سارمان جواب داد برای اینکه بتوانم کاری کنم تا اتفاقات را آنطور که خواست من است تغییر دهم پیشگو در جوابش گفت، بنابراین این که آینده تو نخواهد شد. شاید دلیل دیگرش هم این باشد که میخواهم خود را در مقابل حوادث آماده کنم. اگر حوادث حوادث مطلوبی هستند، بهتر غیر منتظره باشند. اگر هم اتفاقات ناگوارند، در آن صورت از قبل باید درد و رنج رویدادی را تحمل کنی که معلوم نیست چه وقت روی می دهد. ساروان گفت: «میخواهم آینده را بشناسم چون یک مرد هستم و مردان در ارتباط و به تبعیت از آینده زندگی می کنند. پیشگو بی آنکه سخنی بگوید مدتی در اندیشه خود قوت خورد و زمان میگذشت. او چوبهای کوچک و کوتاهی با خود داشت. وقتی میخواست از گذشته یا آینده سخن بگوید، چوبهای کوچک را دسته میکرد و با هم روی سطح صافی میریخت. سپس حالات آنها نحوه پخش و چگونگی قرار گرفتن هر یک را به تعبیر و تفسیر میگذاشت. ولی آن روز از چوبهای کوچک خود استفاده نکرد، آنها را جمع کرد و در یک کیسه پارچه‌ای قرار داد، و در جیبش گذاشت و گفت «من زندگی خود را با پیشگویی آینده مردم تأمین می کنم از دانش خاصی بهرهمندم و چوبک ها هم ابزار دانش من هستند میدانم چگونه از آنها استفاده نمایم تا بتوانم به جان جهان نزدیک شوم و زمان را در اختیار بگیرم در آنجا می توانم گذشته را بخوانم و همه آنچه را که فراموش شده اند دوباره ببینم نشانه‌های حال را هم کم و بیش بفهمم وقتی مردم به من مراجعه می‌کنند و از من میخواهند تا از آینده‌شان بگویم آزرده می‌شدم چون قادر نیستم آینده را ببینم و برای آنها از مشاهداتم بگویم آینده را از روی قرائن حدس می‌زنم و گفته‌هایم بر اساس حدسیاتم اسلوبار می‌شوم آینده از آن الله است و در دست اوست که در مواقع خاص از آن خبر می دهد. بنابراین چگونه می توانم آینده را ببینم؟ لابد به لطف نشانه های حال. اسرار دنیایی در حال نهفته است. اگر در حال دقت کنیم می توانی لحظات خوبی داشته باشیم و اگر در جهت بهبود و اصلاح لحظات حال باشی و اشتباهات را حذف کنی آنچه پس از آن آیدت می شود باز هم خوب و دلنشین است آینده را فراموش کن و با توجه به تعلیمات الهی و الله توکل کن و هر روز از عمر خود را در اختیار بگیر و در لحظات آن زنده باش و زندگی کن چون هر لحظه پاره است از انایت او و هر روز بیانیست از جافتانگی او. ساربان علاق شد که مواقع خاص از آینده را که الله اجازه می تا دیده شوند بشناسد. به او پاسخ داده شد. الله به ندرت موردی را در آینده هویدا می کند. ولی مواقع خاص زمانی پیش می آیند که پدیده ای از آینده به خود شخص ظاهر می شود. از آنجا که آینده با دستی در گذشته نوشته شده است این مساعی و تمایلات و رؤیاهای انسان با رضایت الله میتواند سبب تغییراتی در آن شود ساربان به حرفهای جوان دقیق شد و فکر کرد الله جوان را که وسیله و رابطش بود از پدیدهای در آینده مطلع کرد رو کرد به جوان و گفت برو پیش رؤسای قبایل و با آنها بگوی که گروهی از مردان مسلح شمشیر به دست به زودی به آبادی نزدیک میشوند آنها مسخره میکنند. می کنند آنها مردان صحرا هستند و مردان صحرا هم به ها عادت دارند پس می بایست تا کنون فهمیده باشند این مشغله فکریشان نیست آنها فکر میکنند اگر قرار باشد در جریان وقای قرار بگیرند این اوست که خبر میدهد و کسی از سوی او آگاهشان خواهد کرد. موردی است که بارها اتفاق افتاده. ولی امروز این پیام آور تو هستی. جوان به فاطمه فکر کرد و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود. پیامی از صحرا آوردم. جوان با این جمله نگهبان مقابل ورودی چادر عظیمی را که در وسط آبادی قرار داشت مخاطب قرار داد و اضافه کرد، مایلم رؤسای قبایل را ملاقات کنم. نگهبان جوابی نداد، درون چادر رفت و پس از گذشت زمان نسبتا زیادی به اتفاق یک جوان عرب ملبس به جلابهی سفید با یراغ و قلاب طلایی خارج شد. جوان آنچه را دیده بود برایش تعریف کرد و جوان عرب از او خواست منتظر بماند و خود داخل چادر شد. خورشید آخرین تیغکهایش را از میان نخلهای نخلستان جمع میکرد. آبران و فروشنده ها با شتاب در رفته آمد بودند. رفته رفته آبادی در سکوتی فرو رفت که یادآور سکوت صحرا بود. در آن گستره فقط چراغ‌های چادر بزرگ روشن بود در تمام این مدت جوان بدون اینکه از حرفهای بعد از ظهر فاطمه چیزی درک کرده باشد لحظه ای از فکرش غافل نبود او را در ذهن خود داشت شبه سبو بر شانه اش را حرکات ظریفش را بیان شیرینش را و چشمان برنگ شبش را در کنار خود میدید سرانجام پس از مدتی انتظار نگهبان از او خواست وارد چادر شود جوان از آنچه میدید مبهود شد در خیرگی و حیرت فرو رفت هرگز تصور نمیکرد در قلب صحرا چون این چادر مجللی یا چون این فضای خیرره کننده وجود داشته باشد کفه آن مفروش از قالیهایی بود که هیچ وقت در طول عمرش ندیده بود و نرویش پای گذاشته بود. از سقف آن چلچراخ های بزرگ برنزی به رنگ طلا با شهم روشن آویزان بود. رؤسای قبایل در نیم دایره سدر چادر بر بالش های ابریشمی زردوزی شده تکیه داشتند. خادمان، با سینی های نقره مملو و از غذاهای مطبوع در رفت آمد بودند. چای و شیرینی و گروهی هم زغال مشتعل در تاج قلیان میگذاشتند و پک می‌زدند تا مخزن آن آماده با پر جنب و جوش شود تعم و عطر تمباکو فضا را پر کرده بود. هشت نفر از رؤسای قبایل در آنجا حضور داشتند و او به زودی فهمید کدام یک از آنها بزرگ قبایل و شیخ الرئیس است مردی عرب با جلابه سفید که های آن با نخهای تلایی رنگ قلاب دوزی شده بود در وسط نیم دایره صدر چادر نشسته بود و در کنارش مردی که قبلا با جوان صحبت کرده بود ایستاده بود یکی از رؤسا در حالی که به اون نگاه می کرد پرسید کیست بیگانه ای که از پیام سخن میگوید؟ جوان جواب داد من هستم و آنچرا که دیده بود برای حاضران شرح داد رئیس قبیله دیگر گفت چرا باید صحرا چون این موضوعی را به شخصی بگوید که از دیاری دیگر رسیده است؟ در صورتی که ما نسلا در نسل در این آبادی ساکنیم و هنوز مورد مشابهی را ندیده ایم و نشنیده ایم جوان در پاسخ گفت چون چشمان من هنوز به پدیده های سهرا عادت نکردند و می چیزهایی را ببینم که برای شما عادی شدند و مشاهده آن رویدادها برایتان ممکن نیست و فکر کرد همچنین جان جهان را می شناسم ولی از این مقوله کلمه ای به زبان نیاورد، چون تصور میکرد اعراب بادی نشین ساده اندیشند و با اعتقادات خود زندگی میکنند. سومی گفت، آبادی در قلب سهرا سرزمینیست بیترف، تا کنون سابقه نداشته کسی یا گروهی بخواهد به سرزمین بیترف حمله کند، به یک آبادی حمله بر شود. من فقط آنچه را که دیدم شرف دادم. اگر باورش ندارید، خود دانید. کاری هم نکنید. من اصراری ندارم. از من گفتم بود و از شما... و جوان ساکت شد. سکوتی سنگین فضای چادر را پر کرد. سپس گفتگوی ای بین رواسای قبایل در گرفت. آنها عربی را با گویش محلی تکلم می کردند که برای جوان قابل فهم نبود. اندکی بعد، وقتی با حرکت متظاهرانه خواستند بروند که نرفتند، نگهبان به او گفت، تو بمان. و جوان، رفته رفته می دید، ترسی در جانش جای می گیرد و نشانه ها به او می فهمانند که موضوع خاصی در حال شکل است. از اینکه ماجرا را با ساربان در میان گذاشته بود، احساس پشیمانی شدیدی کرد. ناگه، لبخندی مه و گذرا بر چهره صدر نشین چادر دیده شد و او نفس راحتی کشید. پیرمرد در گفت گوها مشارکتی نداشت و تا آن لحظه فقط گوش کرده بود بدون اینکه که یا جمله از لبانش خارج شده باشد. جوان به چگونگی بیان در سکوت آشنا بود و می توانست آرامش را دیگر بار احساس کند، و حرکت متواتر صلح و آسایش را ببیند که جای جای چادر را فرا می گرفت. شعور و احساس پیشرفتهاش به او می گفت مراجعه به رؤسای قبایل و آمدن به اینجا کار درستی بوده است. مذاکره به پایان رسید و همه رؤسای قبایل منتظر شنیدن سخنان پیرمرد شیخ رئیس شدند و او با چهرهی سرد و خشک رو به جوان کرد و گفت بیش از دو هزار سال پیش در سرزمینی دور مردی را که به خوابها و رویاهایش باور داشت به چا انداختند و سپس به عنوان برده در بازار برده فروشان فروختند بازرگانان ما او را خریدند و به سرزمینمان مصر آوردند همه ما میدانیم کسی که خوابهایش را باور می باید تعبیرش را هم بداند. جوان پیرزن کولی را به یاد آورد. اندیشید همیشه هم موفق نمی‌شوند انجامش دهند. پیرمرد در ادامه سخنانش گفت، تا اینکه فرعون خوابی دید و به بزرگانش گفت، من به رؤیا هفت گاوه فربه دیدم، هفت لاغر آنها را همیخوردند و هفت خوشه سبز و دیگر خوشگیده سوره یوسف آیه چهل بزرگان فرعون خود را از آن آجز دیدند و به او مراجعه کردند و او در زندان به سر می برد و گفت هفت سال پیاپی کشت می کنید هرچرا که درو کردید آن را جز اندکی که می‌خورید؟ در خوشه میگذارید. آنگاه از پی این سالها هفت سال سخت بیاید که آنچه از پیش برای آن نهاده اید، مگر اندکی که نگاه میدارید به مصرف میرسد. عاقبت از پی این سالها سالی بیاید که در اسنای آن مردم کمک میشوند و نجات مییابند سوره یوسف، آیه چهل شش تا چهل نه. به لطف و به خاطر این خواب بود که آن مرد مصر را از گرسنگی نجات داد. اسم او یوسف بود. در وضع و حال تو بود. تقریبا همانند تو، هم سن و سال تو. قریبی در سرزمینی بیگانه و قریب. سکوت مدتی سایه گستر شد و نگاه پیرمرد تیز و سرد به هر طرف می دوید. سخنانش را از سر گرفت و گفت ما همیشه سنت را پی گرفتیم و به آن احترام گذاشتیم و دیدیم که همین سنت در زمان خود مصر را از قحطی و گرسنگی نجات داد و مصریان را ثروتمندترین مردم آن دوره کرد و همین سنت به ما یاد داد که مردان برای ازدواج با دختران ما باید از صحرا بگذرند و سنت هم حکم کرد که یک آبادی سرزمین بی طرف است چون طرفین متخاسم خود آبادی دارند و آبادی های آنها هم آسیب پذیرند وقتی پیرمرد حرف می‌زد، هیچکس هیچ کس کلمه ای و حرکتی نمی‌کرد. همه جا در سکوت بود فقط او بود که با سخنانش فضای سکوت را در درمی نبردید همچنین سنت به ما گفته است پیامهای صحرا را باید باور کنیم، چون آنچرا که یاد گرفتیم و می صحرا به ما آموخت است. با دو دست، خطی به سوی آسمان کشید و گفت، یا الله! و همه اعراب به پا خواستند. خاموش شدند، جلسه خاتمه یافت و نگهبانان به نگهبانی ایستادند. جوان خود را آماده می کرد از چادر خارج شود که دوباره صدایان مرد بلند شد. گفت، فردا توافقی را که کرده بودیم تا کسی داخل آبادی با خود اسلحه نداشته باشد به طور موقت نادیده می گیریم. تمامی روز را به انتظار دشمن می مانیم و وقتی خورشید در افق سرازیر می شود و غروب می کند، مردان ما اسلحه هایشان را به من تحویل خواهند داد. برای هر ده نفر از دشمنان که کشته شده باشند تو یک سکه طلا دریافت خواهی کرد ولی اگر اسلحه ها بی آن که برای جنگ به کار روند از اسلحه خانه خارج شوند یا بخواهیم به خاطر هیچ آنها را از جایگاهشان خارج کنیم باید بدانیم که اسلحه مانند صحرا بلحوس و دمدمی است و ممکن است زمانی که آن نیاز داریم به ما جواب رد دهد و تیری نیاندازد. اگر هیچی از تفنگها فردا در صحرا برابر دشمن به کار نرود، حتما از یکی از آنها استفاده خواهد شد. آن هم علیه تو، وقتی از آنجا خارج شد ماه بر بام آسمان نشسته بود و بر تاج چادرها گرد نقره میریخت. نخلستان در سایر روشن محتاب وزش نسیم را در خود می‌شکست تا عطر صحرا را در خود بیامیزد و بوی تازه را سوار بر نسیم که او صحرا نخلستان و فاطمه را به یاد آورد تا چادرش 20 دقیقه ای راه داشت و به راه افتاد از آنچه گذشت ملتهب بود و نگران لحظه ای در جان جهان فرو رفت و اینک بهایی که برای آن لحظه باید بپردازد چه بسا به قیمت هستیش تمام شود چه بهای سنگینی چون این بهایی را یک بار دیگر هم پرداخته بود. و آن روزی بود که همه چیزش را رها کرد و گذشت. گوسفندهایش را فروخت تا به دنبال حدیث خیش باشد. کسی چه می دانست چه پیش می آید؟ فردا تصمیم با او بود. ولی انجامش؟ به روایت ساربان میاندیشید که می گفت مردن مردن است. چه فردا چه هر روز. و هر روز آغازی است برای زندگی و انجامی است برای مرگ و اینها همه در ارتباط با یک کلمه بودند مکتوب در سکوت راه میرفت به هیچ وجه از رویدادها متأسف نبود و خود را به اتفاق سپرده بود که اگر مقرر شود فردا بمیرد به یقین خواست خدا خواهد بود چه سعی خود را کرده بود اما او نخواسته بود که آیندهاش تغییر کند ولی فردا فردا وقتی خورشید در پشت تپه‌های شنی پنهان می‌شود وقتی صحرا خونین شده و دانه‌های شن با وزش نسیم جابجا می‌شوند و یا روز به ماتم می‌نشیند و جامعه سیاه بتن تن می‌کند و وقتی که فاطمه دور و دورتر می شود، او خواهد مرد بی دریغ و درد خواهد مرد چون او میمیرد. پس آنگاه که از های اندلس، از ترعه و از تنج گذشت، یا که را دید. پس آنگاه که به نور، به بیان رازگونه و به جان جهان رسید، یا که فاطمه را دید، چشمان سیاه او را دید و نگاه او را بر آویزگاه زمیر بیتابش آویخت تا هر از گاه نور شود، ماه شود، محتاب شود. به یاد می‌آورد از روزی که سرزمینش را ترک کرد، روزهای سخت و دشواری را سپری کرده است و لحظات اندوه باری داشته است. ولی از هر اندوهی ای و از هر روزی ای گرفت. پس چه باک از این که از اینکه که فردا بمیرد چشمان او در پهنه دشت جهان شناختها و ناشناخته بسیاری دیده بود چیزهایی که هیچ یک از چوپانان هنوز ندیده و نوس را شنیدند. پس چه باک از مرگ خود را با آن خاطرات تلخ و شیرین سرگرم می کرد و از آن همه شاد بود و راضی. ناگهان قررشی شنید شبیه نفیر باد و بوران و شبهی دید در نزدیکی که قفلتن جست زد آن هم با خشونتی که هرگز ندیده و نشنیده بود چنان گرد و خاک به هوا رفت که روی ماه را پوشانید در برابرش یک اسب سفید عظیم بر روی دوپایی ایستاده بود که شیه میکشید. کشید هنگامی که گرد و خاک کمی فرو نشست و بهتر توانست تشخیص بدهد که چه گذشته است بی اندازه وحشت زده شد مردی را دید که جامعی سیاه به داشت و قوشی بر شانه چپش نشسته بود دستاری به سر و دست مالی بزرگ به دور گردن و صورتش پیچیده بود و فقط چشمانش دیده میشد یک پیام‌آور صحرایی به نظر میرسید ولی حضور با جبر و زور و خشونت او معرف چیزهایی بیش از شبه یک پیام‌آور صحرا بود سوارکار عجیب و وحشتناک شمشیر بزرگی را که بر زین اسب آویخته بود از قلاف بیرون کشید تیغه فولادی و هلالی شکل او در زیر نور نقره‌فام ماه آنچنان می‌درخشید که چشمها را خیره می‌کرد. با صدایی خشن و قوی که گویی در نخلستان پیچیده و از درون پنجاه هزار نخل فایوم منعکس شده است پرسید چه کسی جرعت کرد که پرواز شاهینها را تعبیر کند؟ جوان گفت من، من جرأت کردم و مجسمه سژاک و صحنهای به نظرش آمد که او سوار بر اسب سفیدی بود و مغربیان را با یک ضربه شمشیر به دونین کرده بود و کافران را زیر سم اسبان خود داشت. اکنون هم همان صحنه را برابر خود میدید با این تفاوت که شرایط جابجا جا شده بودند. دوباره تکرار کرد، من جرأت کردم. و سرش را در برابر ضربه شمشیر خم کرد و ادامه داد. شما حساب همه چیز را کردید به جز بیانی که به جان جهان میرسد و او بود که جان بسیاری از انسانها را نجات داد. تیغه شمشیر برخیزد دست سوارکار به آرامی بدون اینکه ضربه محلکی داشته باشد به نحوی پایین آمد که نکه بسیار تیز شمشیر روی پیشانی جوان قرار گرفت اسب کاملا بی حرکت بود جوان هم فکر این که فرار کند حتی به ذهنش نرسید با وجودی که در معرض خطری جدی بود اما در عمق قلبش نسبت به سرنوشت خود احساس شادمانی کرد احساس محبت می کرد به خود گفت: می میرد در راه حدیث خیش می میرد. بالاخره نشانه ها درست گفته بودند یک دشمن آنجا بود و او در آن لحظه ترسی از مردن نداشت چون جان جهانی بود که او تا چند لحظه دیگر به آن می پیوست و به خاطر فاطمه می میرد و برای فاطمه فرصتی خواهد بود تا او را در ماه بجوید در آب یا در صحرا و او فردا به جان جهان خواهد پیوست غریبه از اینکه که شمشیر را روی پیشانی او نگه داشته بود خود را راضی می دید. از او پرسید برای چه پرواز پرندگان را تعبیر و تفسیر کردیم؟ من فقط به چگونگی پرواز پرندگان دقت کردم تا ببینم که چه حکایت می کنند آنها می‌خواستند آبادی را نجات دهند. شما و همه افراد گروهتان خواهید مرد. مردان آبادی به مراتب بیشتر از شما هستند. نوک شمشیر کماکان روی پیشانیش بود. تو کسی نیستی که بخواهی آنچرا که الله قلم زده تغییر دهی. جوان در حالی که گفته‌های ساربان را به یاد می‌آورد گفت: اگر الله لشگر شما را به وجود آورد پرندگان را هم آفرید و به من هم زبان پرندگان را آموخت همه این چیزها با همان دستی قلم زده شد که شما گفتید همان یک دست دست الله بالاخره سوارکار شمشیرش را از روی پیشانی جوان برداشت و او نفس راحتی کشید ولی نمی فرار کند و به او گفت نسبت به پیشگویی ها احتیاط کن. وقتی حوادث نوشته شدند، نمی توان از آنها احتراز کرد. من فقط گروهی مسلح را دیدم نه جنگ را. به نظر رسید، سوارکار از جوابی که شنید قانع شد. ولی کماکان شمشیرش را در دست داشت. و از او پرسید، یک قریب در سرزمین بیگانه چه میکند؟ من در جستجوی حدیث خیش هستم چیزی که تو هرگز نخواهی فهمید اسب سوار شمشیرش را قلاف کرد و گوشی که روی شانش نشسته بود فریاد خاصی کشید و جوان رفته رفته آرامش گرفت سوارکار گفت به شهامت تو را به آزمایش میگذاشتم شجاعت نفس پرهیزکاری است برای کسانی که در جستجوی بیان بدون کلام جهان هستند جوان حیرت کرد از این که می دید او از چیزهایی حرف می زند که تعداد کمی از مردم آنها را می شناختند و او ادامه داد هیچگاه نباید تلاش و جست و رها کرد حتی اگر مانند تو چنین از زادگاه خود دور باشیم باید را دوست داشت ولی هرگز نباید از آن کاملا خوشنود بود چون صحرا برای همه مردم یک سنگ محک است هر کس را به اندازه گامهایش و به فراخور توانش بازماییش میگذارد و کسانی را که از خود دست شسته و در آنجا رها می‌شوند می‌بلعد و می‌کشد سخنانش یادآور حرف‌های پادشاه پیر بود کار باز هم ادامه داد اگر جنگ جویان آمدند و اگر سرت برشانت بود فردا پس از غروب آفتاب نزد من بیا همان دستی که شمشیر را در مشت داشت شلاقی در خود گرفت اسب بار دیگر روی دفای خود ایستاد و شیه کشید بار دیگر گرد و قبار فضا را تیره کرد و پردهای بر صورت ماه کشید جوان فریاد کرد کجا زندگی می کنید? در حالی که کار دور می با همان دستی که شلاق را گرفته بود سمت جنوب را نشان داد. جوان و کیمیاگر به هم رسیده بود صبح روز بعد، دو هزار مرد مسلح در نخلستان قفایوم انتظار می‌کشیدند. قبل از طلوع آفتاب، شبه پانصد مرد مسلح در افق دیده شد. سباره در حالی که سلاحشان را زیر سفید مخفی کرده بودند، به آرامی از راه شمال وارد آبادی شدند و نقل و انتقالی را نشان می‌دادند که به ظاهر، عادی و سلهمیز به نظر می رسید. ولی وقتی در مرکز آبادی مقابل چادر بزرگ رسیدند، تفنگ خود را آماده کردند، شمشیر کشیدند و حمله کردند. حمله به یک چادر خالی. مردان مسلح آبادی های صحرا را محاصره کردند و کمتر از نیم ساعت نه جسد بر روی زمین پخ شد. زنان داخل چادرهایشان در سکوت برای شوهران دعا می کردند و بچه ها در سوی دیگر نخلستان در پناه بودند. آنها خاموش بودند و چیزی نمی اجساد مردان صحرا همه جا دیده میشد و رفته رفته به نظر می رسید آبادی زندگی عادی و روزانه خود را اثر میگیرد. فرمانده گروه مهاجم را زنده دستگیر کردند و غروب آن روز نزد رؤسای قبایل آوردند از او پرسیده شد چرا و به چه دلیل حریم سنت را نادیده گرفتی و نسبت به آن بی‌حرمتی کردی جواب داد که مردان در صحرا از گرسنگی و تشنگی رنج می‌بردند و از طولانی بودن جنگ خسته بودند فکر کردند به یک آبادی حمله بر شوند تا از تشنگی و گرسنگی و خستگی وارهند و بتوانند جنگ صحرا را ادامه دهند ده شیخ و رئیس برای جنگجویان اظهار تأسف و تعلم کرد گفت در هر شرایط و حال می به سنت احترام گذاشته میشد تنها تپه های شنی هستند که با وزش باد در صحرا جابجا میشوند. سپس فتوای مرگ او را داد، مرگی که می میبایست تمرد کسی را به نمایش گذارد که شرف و اعتبار سنت را در صحرا نادیده گرفت تا درس عبرتی برای دیگران شود. به جای اینکه با اسلحه سرد یا با تیر تفنگی کشته شود، به دارش زدند و به نخل خشکیده ای آویختند. پیکر فرمانده گروه مهاجم مدت‌ها در آویزگاه خود با وزش باد صحرایی تکان می‌خورد. بزرگ قبیله جوان قریب را احضار کرد و به او پنجاه سکه طلا داد و بار دیگر افسانه یوسف را در مصر برایش به تمامی تکرار کرد. آنگاه از جوان خواست مشاور آنها در آبادی باشد. این شعاع سرخ فام خود را از خط افق جمع کرد و پشت تپه ها در بستر ماسه های روان در صحرا فرو رفت اولین ستاره ها به تازگی بر بام آبادی نور گرفته بودند که ماه در سینه آسمان مانع جلوگریشان شد جوان راه جنوب را پیش گرفت و رفت به آنجایی رسید که فقط یک چادر برپا شده بود در طلاقی با اعراب آبر شنید وادی وادی جن هاست به انتظار نشست تا او بیاید مدت زمانی طولانی گذشت و هنگامی که ماه سینه آسمان را کشان کشان پیمود و بر تارک آن نشست کیمیاگر ظاهر شد بر شانه خود دو شاهین مرد داشت جوان گفت این منم تو در جستجوی حدیث خیش هستی نمی بایست به این آبادی آمده باشی چه کسی به تو گفته بود به اینجا بیایی راه گنج تو راه دیگر است در صحراست جنگی بین قبایل است و عبور از صحرا ممکن نیست کیمیاگر از اسب فرود آمد و با علامت دست دعوتش کرد به درون خیمه بروند. چادر به استثنای چادر بزرگ مرکزی که زیبایی درون آن افسانه‌های یک شب را تداعی می‌کرد، مانند دیگر چادرهایی بود که در سرتاسر سر آبادی وجود داشتند. جوان به دنبال اجاق و انبر و ابریغ و لوله‌های شیشه‌ای بود، ولی چیزی در چادر دیده نمی‌شد. مگر چند توده کتاب، چند قالیچه منقوش به نقوش اصرا رامیز و یک اجاق که برای پخت و پز به کار می رفت. گفت من چای درست میکنم و تدارک خوراک می تو شام را با من می بنشین. جوان از خودش پرسید که این پرنده ها همانهایی نیستند که روز قبل دیده بود، ولی چیزی نگفت. کیمیاگر آتشی روشن کرد، چیزی نگذشت که بوی دلپذیر کباب در فضای چادر پخش شد. بویی به مراتب دلچسب از بوی تنباکو و قلیان. جوان پرسید، چرا خواستید مرا ببینید؟ کیمیاگر گفت، خاطر نشانه ها. بعد برایم خبر آورد که تو آمده ای و به کمک نیاز داری. نه من نیستم یک خارجی دیگر است یک مرد انگلیسی است او به دنبال شما بود او قبل از پیدا کردن من باید چیزهای دیگری بیاموزد اکنون آن مرد در مسیر صحیحی است به سهرا مشغول است صحرا و به تماشای آن ایستاده است و من؟ کیمیاگر با صدا و کلمات پادشاه پیر سخن میگفت ادامه داد زمانی که آرزوی را در دل می‌پرورانیم، کاینات نیز می‌کشند تا به آرزوی خود برسیم. جوان خبر را گرفت و فهمید که مرد دیگری آنجاست در کنار او، در مسیر او، برای هدایت او، تا او بتواند به حدیث خیش برسد. پس مرا تحت تعلیم خود می‌گیرید؟ نه. تو همه آنچه را که تا کنون باید میدانستی میدانی. من فقط تو را در مسیری میگذارم که به به گنج خود برسیم. جوان تکرار کرد، بین خبایل جنگ است. ولی من صحرا را میشناسم. من همکنون هم گنج خود را پیدا کردم، شطوری دارم و اندوخته ای از دوران شاگردی در فروشگاه کریستال، و پنجاه سکیه تلا میتوانم در سرزمین خود مرد ثروتمندی باشم. همه آنچه چه گفتی همتای کشفیات در پای اهرام نیست. و فاطمه را هم دارم، گنج بزرگی که توانستم به دست آورم. او هم این گونه است. نزدیک اهرام هم نیست. اگر نیمه دیگر افسانه تو باشد، در هر شرایطی به تو میپیوندد. خاموش و بی شروع کردند به خوردن شاهین ها کیمیاگر در یک بطری را باز کرد و مایه قرمزرنگی در لیوان میهمانش ریخت شراب بود یکی از بهترین ها که تا آن زمان هرگز ننوشیده بود ولی شراب شراب که به حکم دین ممنوع بود کیمیاگر گفت بدی و شرارت آن چیزی نیست که از راه دهان وارد جسم انسان می شود، چیزی است که از راه آن خارج می شود. جوان با نوشیدن آن رفته رفته خود را سبک و ذهنش را صاف و روشن می دید، بلی کیمیاگر کمی او را می ترسند. با هم از چادر بیرون رفتند و نشستند. گستره صحرا را پیش رو داشتند و به تماشا و ستایش محتاب ایستادند که ستارگان را بینور کرده بود. کیمیاگر جوان را شاد دید و گفت از حال استفاده کن و بنوش همانند جنگ جویان پیش از آغاز جنگ کمی هم استراحت کن ولی فراموش نکن قلب تو همان جاییست که گنج تو آنجاست. و گنج تو به یقین باید پیدا شود تا آنچه در راه دیدی و کشف کردی و آموختی معنا بگیرند فردا در بازار شطور را بفروش و یک اسب بخر شطورها خیانتکارند هزاران قدم دارند بدون اینکه نشان دهند خستهاند و ناگه به زانو نشینند و می میرند ولی اسب ها کم کم خسته میشوند و تو غالبا میدانی تا کی از آنها بهره بگیری و چه وقت آنها را از دست خواهی داد قروب روز بعد جوان سوار بر اسب به چادر کیمیاگر رسید پس از اندکی انتظار او هم سوار بر اسبی سفید و قوشی بر شانه چپش ظاهر شد به جوان گفت زندگی را در صحرا به من نشان بده وقت آن کس که بتواند زندگی را در آنجا پیدا کند قادر است، گنج خود را هم در همانجا به آورد. آنها در نور محتاب حرکت کردند، ماسه ها تابی در نور نقره فام ماه شناور بودند. نسیم خونکی، پربار از بوی آبادی، بوی نخل، بوی در پی ایشان روان بود. جوانان دیشید نمیدانم اصلا نمیدانم که می توانم زندگی را در صحرا بجویم یا نه چون هنوز صحرا را نمیشناسم خواست این عکس عمل درونی را با کیمیاگر در میان نهد و برگردد ولی از او می ترسید به منطقه رسیدند صخره‌ای و سنگواری جایی که او پرواز شاهینها را در آسمان دیده بود حالا سکوت بود و وزش باد. سرانجام جوان به حرف آمد و گفت: نخواهم توانست نشانه زندگی را در صحرا ببینم. میدانم که وجود دارد ولی نمیتوانم پیدایش کنم. کیمیاگر پاسخ داد: زندگی زندگی را به سوی خود می کشد. و جوان منظور او را فهمید. آن وقت افسار را رها کرد تا راهش را در جاده پرسنگ و ماسه صحرا بجوید و پیش روید. کیمیاگر خاموش در پی او روان بود. نیم ساعتی این چونین پیش رفتند. آنقدر دور شدند که نه آبادی دیده میشد، نه نخلستان. همه جا تابیکران صحرا بود. همه جا تابیکران محتاب زیبا بود. در مکانی که برای جوان کاملا ناشناخته بود، ناگهان اسبش ایستاد و او به کیمیاگر گفت اینجاست، اینجاست که زندگی وجود دارد. اگر من آجز از درک بیان صحرا هستم، در عوض اسبم زبان زندگی را میشناسد. پیاده شدند، کیمیاگر ساکت بود و هیچ نمیگفت، به آرامی گام برمیداشت، سنگها را با دقت نگاه میکرد. ناگهان ایستاد و در نهایت احتیاط خم شد و در بین سنگ ها حفره‌ای دید. کیمیاگر با انگشتان دستش پیرامون آن را بررسی کرد. سپس دستش را تا شانه در حفره فرو برد. در عمق آن جانوری میجنوید و جوان باز و بسته شدن چشمان کیمیاگر را زیر نور ماه می‌دید. حرکات دست و بازوی او نشان میداد در جدال با جانوری است که در بن حفره مخفی شده بود کیمیاگر جستی زد و دستش را از حفره خارج کرد و به سرعت به پا خاست. ماری را که از دمان گرفته بود در دست داشت جوان هم جستی به عقب زد مار کشید خود را آزاد کند به خود پیچ و تاب می داد و با نفیر سوت مانندش که گذر باد را در نخلستان تدایی می کرد سکوت را می شکست در جدال بود، جدال برای زندگی یک مار اینکی بود، یک مار سمی واقعی چند دقیقه کافی بود تا زهرش هر جانداری را بکشد جوان بی آنکه کلمه بر زبان آورد در خیال خود گفت مواظب نیش مار باشید. ولی کی میآگر که دستش را در سوراخ مار کرده بود پس حتما می بایست نیشش زده باشد. اما حال ظاهریش بی بود و روحیش نشانگران که بی است و آرام. به یاد گفته مرد انگلیسی افتاد که سن او بیش از دویست سال است. و به خود گفت مسلمن میداند در مقابل مار چه باید بکند جوان همراه خود را دید که به سمت اسبش برگشت و شمشیر هلال مانندی را از قلاف کشید و روی زمین ای رسم کرد و مار را در داخل دایره نمود. جانور به سرعت خود را جمع کرد و آرام گرفت کیمیاگر جوان را مخاطب قرار داد و گفت ناراحت نباش از دایره خارج نخواهد شد ولی تو تو زندگی را در صحرا دیدی و به من نشان دادی نشانهای را که میبایست در توان تو میدیدم چرا به این موضوع تا به این حد اهمیت دادید برای اینکه اهرام در وسط صحرا قرار دارند جوان نمیخواست حتی كلمهای از اهرام بشنود از شب قبل قلبش سنگین و غمگین بود جستجوی گنج یعنی از دست دادن فاطمه کیمیاگر بار دیگر به حرف آمد و گفت تو را به گوشه و کنار صحرا خواهم برد جوان پاسخ داد مایلم در آبادی بمانم فاطمه را آنجا دیدم اینک او برایم از هر گنجی با ارزش‌تر است فاطمه دختر صحراست و میداند مردانی که در حركتند باید بروند تا برگشتی هم داشته باشند. او به گنج خود که تو باشی رسیده است و منتظر است تو هم آنچرا که در جستجویش هستی پیدا کنی. اگر تصمیم بگیرم در آبادی بمانم چه؟ یک مشاور آبادی خواهی بود. به اندازه ای طلا خواهی داشت که بتوانی با فروش آن تعداد زیادی گوسفند و شطر بخری با فاطمه هم ازدواج کنیم. سال اول را با خوبی و خوشی زندگی می و به پایان میبرید یاد میگیری صحرا را دوست داشته باشیم. همه پنجاه هزار نخل نخلستان را هم یک به یک خواهی شناخت. چگونگی رشد و گرد افشانی و به میوه نشستن آنها را خواهی دید و راز دنیای متغیر را هم که بی وقفه چهره عوض می کند خواهی فهمید. ادر می شوی نشانه ها را بهتر ببینی و بهتر تشخیص بدهی و بهتر به مفاهیم آنها پی ببری همه را از صحرا می آموزی چون صحرا بهترین است معلم معلم ها و در سال دوم به یاد می آوری که گنجی هم وجود دارد نشانه ها شروع می کنند به وسوسهت و تو سعی می کنی ندیدهشان بگیری همه دانش و تجربه خود را در جهت بهبود وضع آبادی و ساکنان آن به کار و رؤسای قبایل از تغییرات محسوس خوشحال و از تو خشنود و راضی میشوند و شترها هم برایت قدرت و ثروت میآورند. در سال سوم نشانه هم راحت خواهند بود تا از گنج با تو سخنگویند. گویند، و از حدیث خیش شبها و روزها را خواهی دید که به سرعت می‌گذرند و همه چیز را متحرک میبینی ولی تو ساکن هستی و خاموش و فاطمه هم همچنین در سکوت خود را غمگین خواهد دید چون میداند که حرکت تو جستجوی تو راه تو به خاطر او متوقف شده و از ادامه آن منصرف شدی و تو کماکان دوستش خواهی داشت و این عشق عشقی است متقابل حرفهای فاطمه را به یاد خواهی آورد که هیچگاه و هیچ وقت از تو تبقیه توقف در آبادی را نداشت و نخواست که تو به دنبال راه خود نباشی چون او یک زن صحراست بردبار است و به خوبی زمان برگشتن مردی را که رفت میشناسد و تو خود را در شرایطی نمیبینی که توقفت را به به حساب او بگذاریم. شبها و روزها بارها و بارهای دیگر قدم بر ماسه های صحرا خواهی گذاشت. در نخلستان پای هر نقل و کنار هر چاه در این فکر خواهی بود که شاید می توانستی به راحت ادامه دهی از فاطمه و از عشقت هم راضی تر بودی و به خود خواهی گفت اگر مندم اگر در آبادی ساکن شدم اگر به راه خود ادامه ندادم شاید دلیلش این بود که نتوانم برگردم و از ترس اینکه هرگز نتوانی برگردی متوقف شدی و وقتی خود را چنین دیدی نشانه ها نگرانت خواهند کرد گنج برای همیشه از دست رفت و در مکانی ناآشنا زیر خروارها خاک مدفون شد در چهارمین سال نشانه ها تو را ترک می کنند چون تو نخواستی به اشارات آنها به حرفهایشان توجه کنیم. رؤسای قبایل از موضوع آگاه میشوند و عنوان مشاور آبادی را از تو خواهند گرفت و تو در آنجا شخصی خواهی بود ماننده همه با این تفاوت که شتورهای فراوان در اختیار داریم محموله بسیار در انبار داری و ثروت بیشمار هم اندوخته‌ایم یک مرد ثروتمند در یک آبادی در قلب یک صحرا و بقیه عمرت را در نخلستان در صحرا روی می می‌گذرانیم و روزها، هفته ها و را به سرعت خواهی دید. و میدانی این تو بودی. فقط تو بودی که نخواستی به راحت ادامه دهیم. در جستجوی گنج خود باشی و با حدیث خیش زندگی کنی. و در خواهی یافت که انجام آن دیگر ممکن نیست. بدون اینکه بدانی و بفهمی، عشق هرگز مانع نمی شود که انسان، در جستجوی حدیث خیش نباشد و اگر چون این شد باید مطمئن بود که عشق عشق حقیقی نیست یا عشقی نیست که عین بیان جهان باشد کیمیاگر دایره را که روی ماسه های کشیده بود پاک کرد و کبرا به سرعت در میان بطه ها و قلو سنگ ها مخفی شد جوان بلور فروش را یاد آورد که همیشه آرزوی رفتن به مکه را داشت و مرد انگلیسی را که در جستجوی یک کیمیاگر بود. و در خیال خود زنی را دید که چشم به صحرا داشت تا مرد زندگیش را بجوید مردی که بتواند دوستش داشته باشد. و از راضی بود چون آنها بار دیگر پشت اسبها قرار گرفتند. ولی این بار جوان به دنبال کیمیاگر در حرکت بود. باد هیاهوی آبادی را با خود داشت و او سعی می کرد صدای فاطمه را در آوای باد بجوید. آن روز به جهت جنگی که در آبادی گذشت سرچاه نرفت ولی در گذر شب زمانی که به ماری در دایره خیره شده بود، یک سبار کار عجیب که قوشی بر شانه چپ خود داشت برایش از عشق سخن راند و از زنها زنهای صحرا نه زن صحرا و از گنج گفت و از حدیث خیش جوان گفت با شما میآیم بلافاصله آرامشی در خیال یافت و آسایشی در قلب خود احساس کرد کیمی جواب داد فرداب قبل از طلوع آفتاب حرکت می‌کنیم. جوان بی خواب بود و نگران دلشورهی بر جانش دویده بود و خوابش نمی برد. دو ساعت به سپید دمان مانده پسرکی را که در همان چادر بود از خواب بیدار کرد و از او خواست راه چادر فاطمه را نشانش دهد. در عوض پولی بگیرد که با آن گوسفندی بخرد. دو جوان به اتفاق خارج شدند و نشانی او را در پیش گرفتند و به آنجا رسیدند. جوان از همراه خود خواست تا فاطمه را بیدار کند و بگوید او بیرون چادر منتظرش است. پسرک عرب خواستش را اجابت کرد و در عوض معادل بهای یک گوسفند دیگر هم پول گرفت. به پسرک گفته شد که حالا ما را تنها بگذار. او به چادرش برگشت تا دوباره بخوابد. مقرور از اینکه توانسته بود، به مشاور آبادی خدمتی کند و خوشحال از اینکه پولی به دست آورده بود که با آن می توانست را بخرد. فاطمه در درگاه چادر ظاهر شد و به اتفاق به سوی نخلستان پیش رفتند. می دانستند که آنچه می کنند خلاف سنت است ولی حالا و در این شرایط برایشان مهم نبود. جوان گفت خواهم رفت ولی میل دارم بدانی که بر می گردم دوستت دارم برای اینکه فاطمه حرفش را قطع کرد چیزی نگو دوست داریم برای اینکه دوست داشته باشیم هیچگاه هیچ دلیلی برای دوست داشتن نبوده و نیست با وجود این او دنباله حرفش را گرفت دوستت دارم برای اینکه خوابی دیده بودم سپس پادشاه را دیدم، کریستال فروختم و از صحرا گذشتم. اشایر با هم جنگ را شروع کردند و من به چاهی رسیدم تا مکان کیمیاگری را بجویم. دوستت دارم، چون که جهان و هر آنچه در او سعی کرد تا به تو برسم، به تو آنها برای اولین بار یکدیگر را در آغوش گرفتند. جوان باز هم تکرار کرد: بر برمیگردم. به سویت برمیگردم فاطمه گفت: پدرم روزی رفت ولی به سوی مادرم بازگشت و هر زمان دیگر هم که برود باز هم بر میگردد. و حال تو میروی میدانم که برمیگردی. ولی اگر تا کنون نگاه کردن به صحرا برایم فقط یک حوض بود از این پس یک انتظار خواهد شد. یک امید و یک آرزو. خاموش شدند. هیچ نگفتند. کمی در نخلستان قدم زدند، جوان او را تا درگاهی چادرش همراهی کرد و گفت برمی کردم. همانند پدرت که به سوی مادرت بازگشت، من هم برمیگردم. چشمان فاطمه را دید که دریای عشق بود. گریه می او صورتش را پنهان کرد و گفت من یک زن صحرا هستم، ولی مهمتر از آن یک زن هستم. یک زن و داخل چادرش شد در سپید دمان انگاه که خورشید سینه آسمان را خونین کرد او برای انجام کار همیشگیش سبو شانه گرفت و از چادر خارج شد. اما چه سود؟ همه چیز تغییر کرده بود و جوان در آبادی نبود آبادی که از گذشته نزدیک برایش لبریز از انگیزه و جذابیت شده بود، دیگر مفهوم خود را از دست داد. آبادی آبادی همیشگی نبود. در آنجا پنجاه هزار نخل دیده نمیشد، سیصد حلقه حلق چاه وجود نداشت. شادی حجاج از سفر برگشته کسی را وسوسه نمی کرد. آبادی خالی بود. خالی از کشش، خالی از انگیزه و خالی از او. از امروز صحرا برای فاطمه مهمتر از آبادی می شود و همه وقت خود را به نگاه کردن به صحرا و ستاره ها خواهد گذراند تا بوی او را از نسیم بگیرد یا شاید ستاره ای را بجوید که او برای پیدا کردن گنج از آن کمک می گیرد. بوسه خود را سوار باد خواهد کرد تا شاید بر برگونه او بنشیند و به او بگوید که فاطمه زنده است و فاطمه منتظر اوست مثل هر زن دیگر در انتظار مرد خود که در راه است مردی که با شهامت است و در تلاش تلاش برای پرباری اندیشه یا تلاش برای رسیدن به گنج از امروز صحرا برای او فقط صحرا نیست که آرزوست آرزوی برگشت او ماسه ها در صحرا گاه لغزنده، گاه روان چه قافل که از هر گام آبر قالبی میساختند و باد چه آرام، چه تند دانه های بلورین و بیریشه صحرا را به هر طرف می برد و قالب های ماسه ای را پاک می کرد، محف می کرد تا رد پای آبری که گذشت به دور از نگاه بیمایگان باشد و راز مسافر، در دل صحرا بماند وقتی اسبها در آن صحرا روی ماسه ها یورتمه می رفتند آگر گفت به کسی که از او دور می فکر نکن چون همه رویدادها از قبل برای همیشه در جان جهان نقش شدند جوان کم و بیش دل بسته به صحرا و سکوت آن به همراه خود گفت مردان بیش از رفتن در رؤیای برگشتنند اگر آنچه که به دست آوردی دارای روحی پاک و منزده باشد همیشه به دور از آلودگی میماند و هرگز فراموشت نخواهد کرد و تو خواهی توانست روزی حتی برای یک لحظم که باشد برگردی حتی اگر آن لحظه به قدر عبور شهابی در سینه آسمان باشد یا حرکت مواج ستاره یا گذر نور چه بسا که به او نرسیم، ولی قبور شهاب را در سینه آسمان شاهد خواهی بود، حرکت مواج ستاره را دیدی و به نور رسیدی، و این خود تجربه است که به زحمتش میارزد. آن مرد با مفاهیم و عباراتی متفاوت سخن میگفت، ولی همراهش میدانست که او با گفته هایش در تصور فاطمه را تصویر میکند. و چه مشکل بود فکر نکردن فکر نکردن به کسی که دوستش میداشتی یا به آن کس که دور مانده است صحرا با هواشی یک نباخت و گوشه و کنار همانند خود ای مجالش نمیداد که بی خیال باشد و در خود غرق نشود جوان هنوز درختان خورما را میدید و چاه را و چهره و چشمان سیاه عشق نشسته فاطمه را مرد انگلیسی را هم در آزمایشگاهش می‌دید و ساربان را که یک معلم بود و قافل از آن و فکر کرد شاید کیمیاگر هم هرگز کسی را دوست نداشته است کیمیاگر با قوشی که بر شانه خود جای داده بود از جلو می‌رفت زمانی که متوقف می‌شدند تا دمی بیاسایند اوش که به حالات و زبان صحرا آشنایی داشت از شانه او پر میگشود و به جستجوی جوی شکار میرفت. روز اول با خود یک خرگوش صحرایی آورد و روز بعد دو پرنده. وقتی که ماه در آسمان رنگ میبخت صحرا به شدت تاریک میشد و سرد. آنها بی که آتشی روشن کنند بالا پوش خود را روی ماسه ها پهن می‌کردند و درون آن شب را به صبح می‌رساندند یک هفته‌ای گذشت در سکوت پیش می‌رفتند و کلمه مبادله نمی‌کردند نوعی احتیاط بود احتیاط برای اینکه از مردان جنگی دور باشند و در امان جنگ بین اشایر ادامه داشت و باد هر از گاهی بوی خون تازه میداد که نشانی بود از جنگی بی وقفه در نه چندان دور و باد وجود بیان متفاوتی را در ذهن جوان نقش می کرد بیانی که زبان نشانه ها بود و نشان نشاندهنده موجودیت واقعیت هایی که هرگز به چشم دیده نمی شدن. در غروب هفتمین روز سفر کیمیاگر تصمیم گرفت زودتر از معمول خیمه زند و جول و پلاسش را پهن کند. قوش به جستجوی شکار رفت و او قمقمه آب را بیرون آورد و به جوان تعارف کرد و گفت زودی به پایان سفرت خواهی رسید. همه وقت در به حدیث خیش بودی. به خاطر پای مردیت به تو تهنیت میگویم جوان رشته سخن را به دست گرفت شما هدایتم میکنید بدون اینکه ای گفته باشید و من فکر کرده بودم که مرا از دانسته هایتان بی بهره نمی گذارید و از اندوخته های علمی خود برایم خواهید گفت چند وقت پیش در صحرا هم سفر مردی بودم که کتاب های کیمیاگری فراوانی با خود داشت که من با خواندنشان نه چیزی فهمیدم و نه چیزی اندوختم کیمیاگر پاسخ داد، تجربه نوعی آموختن است که آن هم میسر نیست مگر با حرکت کردن. بنابراین فراگیری و آموزش فقط یک راه میشناسد. آن هم سفر کردن و سفر آنچه چرا که لازم بود بدانی به تو یاد داد. مگر یک چیز را. جوان علاقمند بود آن را هم بشناسد و بداند چیست؟ بلی کیمیاگر در کمین بازگشت قوش بود و چشم از افق بر نمی‌داشت. چرا شما را با نام کیمیاگر می‌شناسند؟ چون کیمیاگر هستم. و چه عاملی سبب عدم موفقیت کیمیاگران است که همه عمر در تلاش تبدیل فلز ناپاک به طلای پاک بودند؟ آنها فقط به پیدا کردن طلا دل خوش کردند. و گنج خود را در حدیث خیش می جستند بدون اینکه تمایلی داشته باشند که با حدیث خیش زندگی کنند. جوان سماجت کرد. چیست که هنوز باید بیاموزم و در پیش باشم؟ کیمیاگر کماکان به افق خیر ماند پس از اندک زمانی قوش برگشت و سیدی به همراه خود آورد. گودالی در زمین کندند و درون گودال آتشی روشن کردند تا شعلش را کسی در صحرا نبیند. او در حالی که غذای خود را آماده می کرد گفت من یک کیمیاگرم، همانی هستم که می بینی. و این را هم از اجدادم فرا گرفتم و آنها هم از نیاکانشان. از بد و آفرینش روش بقای این دانش چنین بود، و چون این هم خواهد ماند. در آن دوره می توانستند همه ی دانش را بر سطح یک زمرد ساده بنویسند ولی انسان برای سادگی اهمیتی قائل نبود. بنابراین شروع کردند به نوشتن رسالات و کتابها و تعبیر و تفسیر کلماتی که در نفس خود سادگی قابل فهم داشتند و شروع کردند به ربط تعابیر و تفاصیر به مسائل فلسفی به خصوص به ابعاد ماورا و بدینسان و دانشی که فقط بر سطح یک زمرد جای می گرفت زیر خربارها کتاب و رساله مدفون شد و بالاخره به زمانی رسیدیم که ادعاهای عجیب برتر بودن از دیگری هم آغاز گردید جوان پرسید چه چیز روی لوه زمرات نوشته میشد؟ کیمیاگر به نوشتن روی سطح ماسه صحرا مشغول شد و کارش بیش از پنج دقیقه طول نکشید. وقتی او به ترسیم عبارات خود مشغول بود، جوان به یاد پادشاه پیر افتاد و میدان مرکزی شهر، جایی که برای اولین بار ملاقاتش کرده بود، با خود گفت. خاطره است قدیمی، گویی که قبار گذشت سالها و سالها بر آن نشسته است. کیمیاگر پس از اتمام نوشته گفت این همه آن است که بر لوه زمرد را شده بود. جوان نزدیک شد. نوشته روی ماسه را و تعجب کرد. کمی سرخورده گفت این که فقط یک کد است. گویی که این آن در کتاب مرد انگلیسی هم وجود داشت. کیمیاگر پاسخ داد: خیر، این همانند پرواز شاهینها بر فراز آسمان در صحراست است و آن چیزی است که فقط به یک دلیل نمی بایست برای همه قابل فهم باشد. چرا که لوح زمرد تنها راه مستقیم و تنها وسیله حقیقی برای رسیدن به جان جهان است. دانایان و اندیشمردان فهمیده بودند که این دنیای فانی تصویر و است از جهان باقی و انگیزه آفرینش آن دادن نوعی اطمینان به انسان بود تا به موجودیت دنیایی برتر پی برد و واقف هستی در آن شود و همچنین با دیدن همه آنچه در پیرامون خود دارد بتواند به درک آموزش تعمقی برسد و زیبایی ها و جذابیت دانشی آن را بشناسد و این همان سیر است همان سفر است از مبدع و رجعت به مبدع. به این سفر است که حرکت میگوییم جوان پرسید میتوانم متن رازگونی لوح زمرد را بفهمم شاید نه اگر در یک آزمایشگاه کیمیاگری بودیم. ولی اکنون بهترین وقت است و بهترین وسیله در اختیار تا بتوانی به درک لوح زمرد رد برسیم. حالا در سهرا هستیم. در صحرا غرق شو و در آن قور کن. اندیشه کن. چون برای درک اسرار دنیا، صحرا همان مقدار مفید خواهد بود که چیزهای دیگر موجود در روی زمین کافی است به تماشای یک دانه ماسه بنشینی و همه شگفتیهای آفرینش را در آن ببینیم چه باید کرد چه کنم که در صحرا غرق شوم به قلبت گوش فراده چون او واقف به اسرار است و مظهر است از جان جهان از او می آید و روزی هم به او باز می گردد دو روز دیگر گذشت کیمیاگر خود را بیش از پیش مقاوم و خوددار نشان می داد. چون از منطقی می‌گذاشتند که در آن جنگی سخت در جریان بود و جوان با زحمت زیاد به خود تحمیل و تلقین می‌کرد تا آوای قلبش را بشنود قلب مشکلی بود و شنیدن آوای آن مشکل در گذشته همیشه آماده حرکت بود ولی حالا برای رسیدن عجول بود و شتاب زده و میل داشت به هر بهایی به مقصد برسد گاه میشد که قلب او مدتها ها افسانه های قمبار خاطره ها و یادها را در خود نجوا میکرد و گاه نیز غمخانه میشد پژمرده میشد آنقدر که جوان در سپید دمان صحرا پنهان از هر کس قطر عشقی بریزد وقتی سخن از گنج می میشد زربانش زیادتر میشد و آنگاه که نگاهش در بین نهایت صحرا گم میشد آرام میگرفت. هرگز خاموش نمیشد. حتی اگر کلمههای با کیمیگر حرف نمیزد. در پایان روز وقتی متوقف شدند، جوان پرسید: چرا باید به آوای قلبمان گوش دهیم؟ چونکه قلبتان جاییست که گنج تو. جوان گفت: قلبم ملتهب و آشفته است غمگین و سنگین است تب دارد و در خود می‌لرزد عاشق است عاشق یک دختر صحرا گاه خواسته هایی دارد و سوالاتی و شبها بی خوابم می‌کند تا به فاطمه فکر کنم علی است زنده و هوشیار است و آنچه در خود دارد و برایت نقل می‌کند گوش فراده تا یک روزی که گذشت با بسیاری از جنگ جویان سهرا برخورد کردند و شبه گروهی را هم در سایه روشن نور در افق می دیدند و قلب جوان در این زمان از ترس سخن می گفت و از داستانهایی که از جان جهان شنیده بود. داستانهایی هایی درباره مردانی که خود را گم کرده بودند. مردانی که قسمت مهمی از زندگی را صرف پیدا کردن گنج کردند ولی هرگز به آن نرسیدند. گاه نیز او را می‌ترسانید. فکرش را می‌لرزانید که او هم هرگز نخواهد توانست به گنجش برسد و در راه آن در صحرا خواهد مرد. زمانی دیگر می‌گفت اكنون شاد است و است چون او به عشقی رسیده بود و به مقداری سکه. وقتی توقف کردند تا اسبان از خستگی وارهند و نفس تازه کنند جوان روی کرد به کیمیاگر و گفت قلبم خائن است و ترسو. مایل نیست به راهم ادام دهم. کیمیاگر داد: خوب است. خیلی هم خوب است. این نشان میدهد كه که قلبت زنده است و ترس او هم طبیعی است. چرا که می بیند تو به خاطر یک خواب همه آنچه را به دست آورده بودی و پیروزی هایت را بر سر بازی سرنوشت گذاشتی بنابراین چرا باید به قلبم گوش کنم؟ چون هیچ وقت موفق نمی خاموشش کنیم. چنانچه کاری کنی که گفته هایش را نشنوی، او آنجا خواهد بود. در سینه تو آرام نخواهد گرفت. و همه آنچه را که درباره زندگی و اسرار دنیا فکر می بارها و بارها تکرار خواهد کرد. حتی در حال خیانت؟ خیانت ضربه ایست خیر منتظره، خارج از توقع و تصور. اگر قلبت را خوب بشناسی و مواظبش باشی، هرگز کاری نخواهی کرد که در تصور نگنجد. وانگه تو، هم رویاهایت را می شناسی و هم حوث هایت را بنابراین مجالی برای خودنمایی قلبت نمی‌ماند تا ضربتی دور از انتظار به تو بزند ظمنان باید بدانی که هیچکس کس نمی‌تواند از چنگ قلبش رهایی یابد و فرار کند بس بهتر است گفته‌هایش شنیده شود جوان بالاخره مجاب شد تدابیر قلبش را شناخت با خود و نیرنگ آن هم آشنا شد. تصمیم گرفت با او کنار بیاید. صدایش را بشنود و به ندایش توجه کند. در صحرا پیش می رفتند و جوان دیگر وحشتی احساس نمی کرد و علاقه ای نداشت تا قبل از پایان سفرش بازگردد. قلبش شاد بود و احساس میکرد کرد که بین فکر ندا و عمل هماهنگی وجود دارد. در یکی از همین شبها به جوان گفت: شرایط را مطلوب میبیند و از وضع موجود رازی است. و اگر کمی شکوه دارد و بهانه می گیرد، فقط به این دلیل است که من قلب یک انسانم. این گونه قلب اهل شکند، اهل شکایتند، اهل نالند، دلسوزند و بهانه گیر. همیشه نگران و وحشت زده‌اند وحشت زده از اینکه مردان رویاهایشان را نادیده بگیرند و رهایشان کنند نگران از اینکه تصور نمایند لایق سرنوشت خود نیستند یا فکر کنند را که در خواب دیدند تر از ظرفیتشان است حقشان نیست در پی تغییر راه خود باشند و بترسند که هیچگاه نتوانند مسیرشان را به پایان برند و به گنج نخواهند رسید یا از اینکه راهی را که در پیش گرفتند برگشتی نداشته باشد. ما قلبها از ترس می میریم اگر ببینیم اشقی که میتوانست شادی آفرین باشد و با زیبایی ها همراه گردد برای همیشه در زمان مدفون گردیده است ما قلب ها از ترس می میریم اگر ببینیم گنجی که می توانست پیدا شود همیشه در دل خروارها ها ماسه صحرا فراموش گردیده است. و ما قلب ها وقتی چنین می بینیم، وحشت می کنیم و نگران می شویم. درد آن را به جان می گیریم و در تب آن می سوزیم و می سازیم ولی خاموش نمی شویم. گله می کنیم، ناله می بهانه میگیریم. در یک شب محتابی که جلبه های ماه را تماشا می کردند، به کیمیاگر گفت: قلب من از رنج می ترسد و او بگو که ترس از رنج بدتر از خود رنج است. هیچ قلبی نیست که در پی آرزوهایش باشد ولی رنج نبرد. چون آرزوها بی پایان و دور از دست رسند و راه راه دشواری است. می میخواهد و تلاش و هر لحظه آن می تواند لحظه پایانی باشد لحظه دیدار با خدا یا لحظه پیوستن به ابدیت. و جوان به قلبش گفت هر لحظه از تلاش لحظه دیدار است وقتی در جستجوی گنج خود بودم همه روزها را درخشان می دیدم چون می دانستم هر ساعت آن است از رؤیای تلاش تلاش برای پیدا کردن گنج همچنین پدیده‌هایی را در مسیر خود دیدم که هرگز تصور دیدنشان را هم نمی‌کردم و اگر شهامت لازم را نداشتم که دنبال کارهای غیر ممکن باشم مانند دیگر چوبانها چوپان باقی می‌ماندم و قلبش تمام بعد از ظهر یک روز آرام گرفت و ندایی نداد جوان شب را با آرامش خوابید وقتی بیدار شد البش برای او داستان‌هایی از جان جهان گفت. گفت: مرد خوشبخت مردی است که خدا را در خود ببیند و در خود بجوید. همانطور که که کیمیاگر گفته است، خوشبختی میتواند حتی در یک دانه ناچیز ماسه صحرا هم دیده شود، چون یک دانه ماسه هم گویای لحظه‌ای از آفرینش است و کائنات برای پیدایش آن میلیون‌ها سال وقت گذاشتند. هرکس در روی زمین قسمتی یا گنجی دارد که منتظر است. از آنجا که غالب مردان در راه به دست آوردن گنج خود نیستند ما هم به ندرت از آن حرف میزنیم. مگر برای کودکان آن هم به صورت افسانه پریان یا افسانه قسمت رنج و گنج سپس زندگی را به حال خود رها می کنیم که سرنوشت خود را دنبال کند متاسفانه مردان زیادی در پی مسیر سرنوشت خود نیستند و با حدیث خیش زندگی نمی کنند و به سعادت عبدی نمی نمیندیشند و بسیاری هم به دنیا با چشم دیگر و نگاهی متفاوت می نگرند و آن را محیط وحشت و تهدید می بینند و به همین دلیل هم پدیده های دنیاوی خبر از وحشت می دهند و رویدادهای آن لبریز از تهدید می شوند. بنابراین ما قلبها رفته رفته صدای خود را کم و کمتر میکنیم و ندای خود را آرام تر. ولی هرگز خاموش نمیشویم. دعا میکنیم حرفهای ما شنیده نشوند چون مایلیم مردان از اینکه بی توجه به ندای ما به راه خود رفتند رنج نبرند. جوان از کیمییاگر پرسید چرا قلب ها به موقع به مردها ها اختار نمی کنند که باید در پی آرزوها بود؟ چون در این حالت قلب ها هستند که بیشتر رنج می‌برند و آنها هم از رنج بیزارند. از آن روز جوان به آوای قلبش توجه کرد و از او خواست هرگز ترکش نکند و هرگاه می بیند که او از آرزوهایش دور می شود سینهش را پر از درد کند. حشیارش کند و حشدارش دهد و قسم خورد که هر از گاه اگر حشدارش را شنید محتاط شود آن شب از آنچه که گذشت با کیمیاگر صحبت کرد و او دریافت قلب جوان به جان جهان نزدیک شد از کیمیاگر پرسید حالا چه کاری باید بکنم؟ کیمیاگر جواب داد در جهت اهرام پیش بروم به نشانه ها دقت کن. قلبت اکنون قادر است تو را به گنج برساند. پس آنچه نمیدانستم همین ماجرا بود؟ نه. آنچه نمیدانستی را برایت خواهم گفت. جان جهان آنهایی را که در راه انجام آرزوهای خود هستند به آزمایش می‌گذارد گذارد. کار و علاقه آنها را معاینه می‌کند. قدرت گذشته آنها را می‌سنجد سماجت و پای مردی آنها را می‌بیند البته برای این کار خیال بد نباید به خود راه دهیم چون آزمایش برای این است که ما به موازات گام هایی که در جهت انجام آرزوهای خود پر می داریم، درس هایی هم در مسیر فرا بگیریم که چگونه باید به سوی او برویم و این لحظه است که بیشتر رهروان نفیش می کنند و از آن می گذرند. و این حرکت شبیه است که مردان در صحرا می گویند وقتی نقلهای آبادی در افقه است مردن از تشنگی برای چیست؟ همیشه آغاز یک تلاش با شانس مبتدیان همراه است و پایان آن با سخت کوشی و مقاومت فاتحان و جوان به یاد زربلمسلی از سرزمین خود افتاد. تاریخ ترین لحظه، لحظه قبل از طلوع خورشید است. از خواب سحرگاهی بیدار می شد که اولین نشانه خطر خود را نشان داد سه مرد جنگی به دو آبر نزدیک شدند و پرسیدند اینجا چیکار می کنید؟ کیمی آگر جواب داد من با غوشم به شکار آمدم یک نفر از جنگ جویان گفت ما باید شما را بازرسی کنیم تا مطمئن شویم اسلحه با خود ندارید کیمیاگر به آرامی از اسب بزیر آمد و همراهش هم. جنگجو با دیدن پول جوان پرسید. این همه پول برای چیست؟ جواب داد. آسم مصر هستم. مردی که کیمیاگر را بازرسی می کرد. یک ظرف کوچک شیشهی مملو از نوعی مایه جسمی به رنگ زرد تقریبا شبیه و کمی بزرگتر از یک تخم مرغ پیدا کرد و از او پرسید. اینها؟ اینها چه هستند؟ کیمیا و اکسی که نتیجه سالها زحمت کیمیاگرانند. کسی که از این جوهر بنوشد هرگز مریض نمی شود و ذره از آن هم هر فل زیرا به طلا بدل می کند. سه مرد جنگی به قخه خندیدند و کیمیاگر هم با آنان خندید. آنها جواب خندهداری شنیده بودند. وقتی مطمئن شدند که اسلحه‌ای همراهشان نیست از آنها دست کشیدند و اجازه دادند با وسایل خود به راهشان ادامه دهند مردان جنگی رو به سوی میدان خود کردند و پس از اینکه مقداری دور شدند جوان از کیمیاگر پرسید شما دیوانه اید چرا چون این جوابی دادید برای اینکه قانون ساده ای را که در دنیا حاکم است بهتر نشان داده باشم و آن اینکه وقتی گنج بزرگی را زیر چشم داریم هرگز آن را نمی بینیم. میدانی برای چه؟ برای اینکه انسان افسانه گنج را باور ندارد. آنها همانند روزها که در پی روان بودند به راهشان ادامه میدادند. قلب جوان هم بیش از پیش آرام می گرفت به هیچ وجه از پدیده‌های گذشته و رویدادهایی که در پیش داشتند نگران نبود و خود را با تماشای صحرا و رفع آتش از جان جهان راضی می‌دید. او و قلبش با هم عجین شده بودند و با هم آنچنان دوست شدند که خیانت یکی به دیگری دیگر مفهومی نداشت. قلبش وقتی سخن می‌گفت که جوان را برانگیزد به هیجان آورد و تشویق کند تا روزهای فوق‌العاده سخت و یکنواخت صحرا را در سکوت خود تحمل کند پیش از هر چیز از خصلت بزرگش گفت که با چه همتی توانست از گوسفندهایش دل بکند تا با حدیث خیش زندگی کند از جنب و جوشی که در بلور فروشی از خود نشان داد همچنین موضوعی را مطرح کرد که جوان هیچ وقت به آن توجه نکرده بود. آن هم خطراتی که از کنارش گذشت بدون اینکه که موجودیتشان را حس کرده باشد. مثل روزی که اسلحه کمری پدرش را از جلد خارج کرده بود و با آن ور میرفت، از اینکه ممکن است زخمیاش کند. یا روزی را به یادش آورد که در وسط صحرا دلدرد گرفته بود و حالش به هم خورده بود، ای کرده بود و همانجا برای مدتی به خواب رفته بود کمی دورتر دو نفر راه زن کمین کرده بودند که او را بکشند و گوسفندهایش را ببرند پس از مدتی انتظار راه زنان تصور کردند که چوپان راه خود را تغییر داده است و از مسیری دیگر گذشته است در حالی که او در خواب بود پس آنها هم راه خود را گرفتند و رفتند. از کیمیاگر پرسید ها آیا همیشه به مردان کمک می‌کنند فقط به آنهایی که به حدیث خیش مانوسند اما به کودکان و مستان و به سالمندان فراوان کمک می‌کنند مفهومش این است که خطر وجود خارجی ندارد کیمیاگر جواب داد نه مفهوم سادهش این است که ها به اندازه توان خود عمل میکنند و را که قادرند انجام میدهند پاره شبها از کنار اردوگاه یکی از عشیر در حال جنگ میگذشتند و جنگ جویان را میدیدند با جامعه سیاه و صلاح آماده که به کشیدن قلیان مشغول بودند از جنگ حرف میزدند و توجهی هم به دعاور نداشتند وقتی از آنها دور شدند جوان گفت هیچ خطری وجود ندارد. کیمیاگر قرید و بتندی گفت: به قلبت مراجع کن. فراموش نکن که هنوز در صحرا هستی. وقتی مردان میجنگند، جان جهان هم فریاد جنگجویان و آوای جنگ را میشنود. و از آنچه در زیر سقف کبود می‌گذرد، کسی را پناهی نیست. جوان فکر کرد: همه چیز فقط در یک پدیده نهفته است. و از آنجا که صحرا میخواست گفته کیمیاگر پیر تایی شود ناگهان دو سوار کار در پشت آبران ظاهر شدند. یکی از آنها با خشونت گفت: نمیتوانید جلوتر بروید چون در منطقه هستید که در آن جنگ است. کیمییاگر مستقیم به چشمان مرد جنگی نگاه کرد و گفت، خیلی نزدیک نخواهیم شد. چند لحظه، بدون اینکه کلمه ای گفته شود گذشت. سپس اجازه دادند آبران راه خود را در پیش بگیرند و بروند. جوان صحنه را دیده بود و با تحسین گفت با نگاه خود مطیع و مجابشان کردید. کیمیاگر جواب داد چشمها آینه روحند و نگاه نشان نشاندهنده نیروی لایزالان. جوان با خود گفت. درست است و به یاد آورد مردی را که در میان جماعت جنگجو در اردوگاه با نگاهش کیمیاگر و او را می کرد. اگر خطوط چهره آن مرد را به علت بعد مسافت نتوانست تشخیص دهد ولی حتم داشت که سوارکار همان مردی است که آنها را زیر نظر گرفته بود سرانجام وقتی خود را آماده می کردند که از خط کوهستانی که در درازای افق دیده میشد بگذرند کیمیاگر گفت تا اهرام بیش از دو روز راه نمانده است جوان گفت اگر قرار است که به زودی از هم جدا شویم بهتر از کیمیاگری را به من بیاموزی چیزی نیست که یاد بگیری کافی است قادر باشی در جان جهان نفوذ کنی و نجیرایی را که برای هر یک از ما در نظر گرفته شده است پیدا کنیم. منظورم آن نبود. منظورم دانشی است تا با آن بتوانم از فلز ناپاک به فلز پاک برسم. کیمیاگر به سکوت صحرا برگشت، خاموش شد و چیزی نگفت تا اینکه در مکانی برای خوردن غذا توقف کردند. آنگاه گفت: در جهان همه چیز در جهت تکامل پیش می رود. برای آنهایی که واقفند، تلا فلزیست که بیش از هر فلز دیگر تکامل یافته و پاک شده است. علت آن را از من نپرس، نمیدانم. فقط میدانم آنچه را که سنت می آموزد، همیشه درست است و عین حقیقت است. این انسان‌ها هستند که یاد نگرفتند تا گفتار دانایان و اندیشمردان را آگاهانه و دقیق تعبیر و تفسیر کنند و بدین سان است که تلا به جای اینکه نماد تکامل باشد نشان و انگیزه جنگ شد جوان با دقت گفته های کیمیاگر را شنید و گفت رویدادها با بیان و زبان گوناگون حرف میزنند. خود من نعره شتور را شنیدم که چیزی بجز فریادش نبود ولی اندکی بعد همان فریاد زنگ خطری برای کاروانیان شد و بالاخره کابوس خطر دوباره به آوای شطر بدل گردید جوان خاموش شد و زیر لب نجوا کرد که همه این چیزها برای کیمیاگر روشن است و او واقف به همه این گونه مسائل و موضوعات در همین زمان او به سخن آمد و گفت با بسیاری از کیمیاگران واقعی آشنا بودم آنها خود را در آزمایشگاهشان زندانی میکردند و سعی داشتند مثل طلا پاک شوند منزه شوند و به تکامل برسند و به کیمیا رسیدند چون میدانستند اگر پدیده‌ای در حال تکامل و تغییر باشد همه چرا که در اطراف خود دارد به طبعیت متغیر و متكامل میشوند. گروه دیگری هم بر حسب تصادف به کیمیا رسیدند و آن هدیه ای از روح تکامل یافته آنان بود. تعداد آنها ناچیز است و غالباً به حساب گرفته نمیشوند. بالاخره گروه سومی هم فقط در جستجوی طلا بودند که هرگز به اسرار آن نرسیدند و راز آن را کشف نکردند. چون فراموش کرده بودند که صرب و مص و آهن هم در حدیث خیش زندگی می کنند. و کسی که در حدیث دیگران کنجکاوی کند هرگز موفق نمی شود حدیث خیش را بشناسد گفتار کیمیاگر درباره این گروه آهنگ لعنت و نفرین داشت خم شد و از روی سطح صحرا صدفی برداشت و گفت در قدیم اینجا دریا بود جوان پاسخ داد به این موضوع توجه داشتم و آن را دریافتم کیمیاگر از جوان خواست که صدف را به گوش خود نزدیک کند ولی او در دوران طفولیت بارها و بارها این کار را کرده بود و صدای دریا را از درون صدف شنیده بود صدای امواج دریا همیشه در این صدف شنیده میشود. چون دریا هم قسمتی از حدیث آن است و هرگز آن صدا در صدف قطع نمی شود، مگر روزی که صحرا به دریا بدل شود سپس سوار اسب شدند و به سوی اهرام مصر پیش رفتند وقتی خورشید غروب میکرد قلب جوان خبر از یک خطر داد آنها در محاصره یک تپه شنی بودند و کیمیاگر ظاهراً موقعیت را ندیده بود بعد از پنج دقیقه دو سوارکار که پشت به خورشید داشتند و تیغک های نورانی به غروب نشسته افق را پاره می‌کردند از مقابل به سویشان آمدند قبل از اینکه به کیمیاگر بگوید چه می‌بیند دو سوارکار در مقابل چشمان زده جوان ده نفر شدند و سپس به صد رسیدند و آنگاه همه تپه‌های شنی اطراف را پوشیده از جنگ جویان دید. این مردان جامعه آبی رنگ به تن داشتند و دستاری به سر که تصمه سیاه رنگ سه بار به دوران حلقه زده بود. چهره آنها با دستاری دیگر به رنگ آبی آنچنان پوشیده شده بود که تنها چشمانشان دیده می شود. با وجود فاصله‌ای که داشتند برق چشمانی که از پس دستار دیده می معرف روح سرکش و خوی خشن آنها بود. این چشم ها از مرگ میگفتند مسافر به یک اردوگاه نظامی در همان حوالی برده شدند سربازی کیمیاگر و همراهش را به جلو راند تا داخل چادری شوند. کاملا متفاوت با چادری که در آبادی بود داخل چادر همه فرماندهان جنگی نشسته بودند سربازی رو به فرماندهان کرد و گفت اینها اسیر هستند و جاسوس کیمیاگر گفت ما فقط مسافران سادهی هستیم. سه روز پیش شما در اردوگاه دشمن دیده شدید و با یکی از افرادشان هم مذاکره کردید. من مرد آواره هستم که در صحرا وقت می گذارنم. را می شناسم. هیچ اطلاعی هم از گروه ها و حرکت قبیله ها ندارم. راهنمای این دوستم هستم که به اینجا رسیدیم. فرمانده پرسید دوستت که و کارش چیست؟ کیمیاگر جواب داد یک کیمیاگر است او اسرار و نیروهای طبیعت را میشناسد و مایل است قسمتی از ظرفیت و نیروی خارق و خود را به فرمانده نشان دهد جوان با دقت به حرفهایش گوش میداد. خاموش بود و وحشت زده یکی از مردان پرسید یک مرد قریب در سرزمین بیگانه چه می کند؟ قبل از اینکه جوان دهن باز کند و کلمه ای بگوید کیمیاگر حرف آن مرد را قطع کرد و گفت مقداری پول آوردیم تا به اردوگاه شما تحویل دهیم و پول را گرفت و به فرمانده کل داد پول قابل توجهی بود و می توانستند با آن مقدار نسبتا زیادی سلاح جنگی بخرند مرد عرب با دیدن پول پرسید یک کیمیاگر چه می کند مردی است که دنیا و طبیعت را میشناسد و آنچنان نیرویی دارد که اگر بخواهد فقط با استفاده از نیروی باد این اردوگاه را ویران میکند مردان حاضر که با خشونت جنگ و سختی روزهای صحرا عادت داشتند از حرف کیمیا به خنده افتادند آنها به تجربه دریافته بودند که در آن پناهگاه باد نمیتواند با شدت خود به آنان گزندی برساند. تا چه رسد به اینکه بخواهد ویرانگر و مرگآور باشد با وجود این آنها هم بدوی بودند هم ساده اندیش بودند و هم مردان صحرا آنها هم ترس را می شناختند و گاه و بیگاه حرکت آن را در وجود خود حس می کردند آنها هم میترسیدند، ترسیدند به خصوص از جادوگران وحشت داشتند فرمانده گفت مایلم چون این چیزی را با چشم خود ببینم. کیمیاگر در جواب گفت او برای اینکه بتواند نیروی خود را به شما نشان دهد، باید به باد بدل شود و برای این کار ما به سه روز وقت نیاز داریم تا همه چیز آماده و فراهم گردد. و چنانچه نتوانست نیرو و قدرتش را به نمایاند با تیب خاطر آماده ایم زندگی من را به قبیله شما اهدا کنیم. فرمانده با قرور خاصی گفت شما نمیتوانید چیزی را که به من تعلق دارد به من اهدا کنید. ولی با سه روز وقتی که خواسته بودند موافقت کرد. جوان متبهش بود و نگران. در خود قدرت حرکت نمیدید. کیمیاگر دستش را گرفت و کمکش کرد از چادر بیرون بروند. به او گفت خود را این همه ترسو نشان نده آنها مردان شجایی هستند و از آدمهای های زبون و ترسو بیزارند. جوان زبانش بند آمده بود و تا مدتها نتوانست سخنی بر زبان آورد. در اردوگاه قدم میزدند، اعراب اصفهایشان را گرفته بودند و دلیلی نمی دیدند زندانیشان کنند. یک بار دیگر دیده شد که دنیا چهره دیگری از خود نشان داد و با زبانی دیگر، رویدادها را بیان کرد. صحرا تا آن لحظه دشتی گسترده آزاد و نامحدود بود و دیواری بلند و غیرقابل قابل عبور. جوان گفت شما همه ی هم را با آنها دادید. همه ی آن چرا که در طول زندگی به دست آورده بودم. وقتی باید بمیری با پول خود چه می توانی بکنیم؟ همان پول فعلا جانت را برای روز نجات داد و این کاری نیست که بتوان همیشه انجام داد و با پول زمان مرگ را به تعویق انداخت. جوان متوحشتر از آن بود که بتواند این حرف کیمیاگر را بشنود و دریابد. زمنان او که یک کیمیاگر نبود و از آن دانش هم اطلاعی نداشت. وانگهی چگونه میتوانست خود را بدل به باد کند؟ کیمیاگر از یکی از مردان جنگی چای خواست و آن مرد اندکی از آن را روی دستان جوان ریخت موجی از صفا و سادگی در جانش دوید به نفی که وقتی کیمیاگر آغاز سخن کرد گفته هایش را دریافت کیمیاگر با صدای آرامی گفت در ناامیدی هم میتوان به قلب خود مراجعه کرد بس در ناامیدی هم امید هست و از امید قافل مشو ولی من نمی توانم خود را به باد تبدیل کنم کسی که با حدیث خیش زندگی می کند می داند آنچرا که میخواهد میتواند می, خواهد می تواند به دست آورد باید امید داشت تنها یک چیز است که دسترسی به امید را غیر ممکن می سازد. ترس از باخت من از باخت ترسی ندارم فقط میگویم قادر نیستم و نمیتوانم بدل به باد شوم پس لازم است که یاد بگیری به زندگیت به بودن و نبودنت بستگی دارد اگر موفق نشدم خواهی مرد در حالی که در حدیث خیش زندگی کردی و این خود مرگ با ارزشی است. به مراتب با ارزشتر از مرگ میلیون ها انسانی که در طول حیات خود حتی نفهمیدند که حدیث خیش چیست. ولی نگران نباش، غالباً مرگ کاری می کند که انسان بهتر و بیشتر به زندگی رو میآورد. اولین روز گذشت، جنگ سختی در آن حوالی جریان داشت و زخمی های فراوان به اردوگاه آورده شدند. جوان فکر کرد با مرگ چیزی عوض نمی شود. جنگ جویانی می میرند و دیگران به جایشان می نشینند و زندگی ادامه می یابد. یکی از سربازها در حالی که جامعه های رفیق کشته شده را از تنش خارج می کرد گفت دوست من می توانستی دیرتر هم بمیری حتی در زمان صلح بمیری ولی در هر صورت دیر یا زود می مردی. نزدیک غروب بود که جوان به سراغ کیمیاگر که قوش را با خود به سهرامی برد رفت و باز هم از نگرانی خود حرف زد و گفت من نمیتوانم به باد بدل شوم. آنچرا که به تو گفته بودم به خاطر آور و به یاد داشته باش که دنیا فقط جزئی قابل رؤیت از معنویت است و کیمیاگری استفاده از وسایل قابل رؤیت برای تکمیل فضایل و رسیدن به معنویت است. و شما چه می کنید؟ به قوشم قضا می دهم. اگر موفق نشبم به باد بدل شوم هر دو نفر خواهیم مرد. پس قضا دادن به قوش برای چیست؟ کیمیاگر پاسخ داد. تو، تو خواهی مرد. ولی من میدانم چگونه به باد تبدیل شوم. در دوم این روز جوان بر فراز ای در نزدیکی اردوگاه رفت. نگهبانان مانعش نشدند چون شنیده بودند جادوگر خود را به باد بدل خواهد کرد نخواستند به او نزدیک شوند. وانگههی میدانستند که صحرا دیوار غیرقابل عبوری به دور خود کشیده است. او ی بعد از ظهر دومین روز را با صحرا گذراند و به قلبش گوش داد و صحرا هم گوش به ترسی داشت که در قلب جوان بود. هر دو زبان مشترکی سخن می گفتند. در سبومین روز فرمانده کل دیگر فرماندهان را فراخواند و به کیمی گفت برویم برویم ببینیم که این جوان چگونه باد می شود؟ و او جواب داد برویم. جوان آنها را به جایی برد که روز قبل آنجا بود و از آنها خواست تا بنشینند و گفت این کار به کمی وقت نیاز دارد. پاسخ داده شد عجله نداریم ما مردان صحرا هستیم جوان به افق خیره شد در آن دورها شبه کوه ها را دید سپس خود کوه ها را صخره سنگی را دید و تپه های شنی را و گیاهان خزنده ای را که در ستیز با زندگی بودند و دشت سوزانی که ادامه حیات را غیر ممکن می نمود آنجا سهرا بود، با همه ویژگی هایش، که شناخت آن به ماهها و ماهها وقت نیاز داشت، ولی او فقط محدوده کوچکی از آن را می شناخت و در همین محدوده کوچک با مرد انگلیسی آشنا شد. کاروان را دید، ماجرای جنگ بین عشایر را شنید و به آبادی رسید، آبادی که پنجاه هزار نخل به بار نشسته داشت و، سیصد حلقه چاه آب و... صحرا از او پرسید، از من چه میخواهی؟ دیروز به اندازه کافی در هم قرد نشدیم و به کفایت گفتگو نکردیم. کسی را که دوست دارم، در گوشه از پهنه پهناورت حفظ می کنی. وقتی به گستره ماسی تو نگاه می‌کنم، نگاهم در جستجوی اوست، میخواهم به سمت او برگردم به کمکت نیاز دارم تا به باد بدل شوم صحرا پرسید عشق چیست عشق وقتی قوش از روی ماسه های تو پرواز می‌کند و همه گستره تو را با نگاه خود می‌ستاید نگاهش به تو نگاه یک عاشق است به عشق خود و این است عشق او همه پستی و بلندی هایت را می شناسد، کوه هایت را، تپه های شنیت را، ارتفاعات سخریت را، هیچگاه بدون سید باز نمیگردد و رفتار تو با او سخاوتمندانه است. صحرا گفت، قوش با منقارش، تکه های وجود مرامی رو باید. برای که سالها چیزی از او مزایقه نکردم، محل شکارش را نشانش دادم تا به راحتی تغذیه کند و قطرات آبی را که بتواند با آن رفع اتش نماید تا یک روز یک لحظه ای که نوازش نخجیری را روی ماسه های خود حس می کردم قوش از آسمان به زیر آمد و او را گرفت و با خود برد نخجیری را که با هزار مرارت بزرگش کرده و به او اونس گرفته بودم جوان جواب داد، دقیقا، دقیقا پایان عمرش بود، پایان عمر نخجیری که تغذیهش نمودی، آبش را فراهم آوردی و با هزار مرارت بزرگش کردی، پایان عمر نخجیر برای تغذیه گوش و گوش هم به نوبه خود انسان را تغذیه میکند و انسان هم روزی بدل به ماسه های تو میشود و روزی ماسه ها هم نخجیرهای دیگری را روی خود بزرگ خواهند کرد و چنین است راز دنیا و چنین است گردش کائنات پس این است عشق بله همین است همان چیزی که نخجیر را وسیله تغذیه قوش می سازد و قوش هم انسان را و انسان بار دیگر با صحرا یکی می شود و خاک می شود و همین است که سرب را بدل به طلا می کند و طلا را در زیر خاک دفن می کند. صحرا گفت: حرفهایت را نمیفهمم. پس حداقل شرایط زنی را که در یکی از گوشه های گسترده ماسه‌ای تو به انتظارم نشسته است در نظر بگیر. من به احترام انتظار پر التحاب اوست که باید باد شوم. صحرا مدتی خاموش ماند و سپس گفت: ماسه هایم را به تو می دهم تا جابجا جا شوند و باد بوزد. این کاریست که می توانم بکنم و بیش از آن توقعی نداشته باش. از خود باد تقاضای کمک کن. نسیمی شروع به وزیدن کرد. فرماندهان از دور جوان را میدیدند که با زبانی حرف میزند که تا آن وقت ندیده و نه شناخته بودند. کیمیاگر خندید باد به جوان نزدیک شد و بر صورتش وزید. از ماجرا خبر داشت. گفتگوی او و صحرا را شنیده بود. باد همیشه همه چیز را میداند. در دنیا به هر سو می رود بدون اینکه محل تولد یا مرگش معلوم باشد جوان گفت کمکم کن روزی تو نجوای عاشقانه کسی را به من رسانیدی که دوستش دارم چه کسی به تو زبان صحرا و باد را یاد داد؟ جوان جواب داد قلبم باد نامهای مختلف داشت در اینجا سیروکو نامیده میشد چون عرب تصور داشتند که این باد از سرزمین های پر آب با ساکنان سیاهپوست میآید. در سرزمین دورتر از آنجا که جوان آمد لوان نامیده می شود. چون مردمان دیار تصور میکردند که این باد از زهرا میآید و شنهای صحرا و فریاد مهیب جنگجویان جویان مغربی را با خود می آورد شاید در دور دوردستها دور از دشت هایی که گوسفندها در آن میچریدند مردم گمان داشتند که باد در اندلس متولد می شود اما باد از جایی نمی آید و به جایی هم نمی رود به همین دلیل باد همیشه از صحرا قوی تر است شاید روزی بتوان بر سطح صحرا درخت گاشت و گوسفند داد ولی هیچ وقت نمی توان باد را مسخر کرد باد به جوان گفت تو نمیتوانی باد شوی چون طبیعت ما متفاوت است درست نیست؟ من وقتی دنیا را با تو می به اسرار کیمیاگری رسیدم همه ی آن چرا که در دنیا آفریده شدند در خود دارم سهراها را، بادها را، اغیانوسها را، ستارگان را و... من و تو با یک دست روی صفحه روزگار نقش شدیم و یک روح داریم من میخواهم تو شوم، به هر جا نفوذ کنم از دریاها بگذرم از روی صحراها که گنج مرا در خود پنهان نمودهاند پرواز کنم و بگذارم تا صدای کسی که دوستش دارم به من برسد از گفتگوهای تو با کیمیا گراغا هم و همه را شنیدم آن روز او می که هر چیز حدیث خیش را دارد بنابراین موجود انسانی نمیتواند بدل به باد شود جوان تقاضا کرد فقط چند لحظه برای چند لحظه به من یاد بده باد شوم. پس از آن خواهیم توانست از امکانات نامحدود انسان ها و باد ها حرف بزنیم باد کنچکاف شد چیزهایی می شنید که نمی شناخت میل داشت درباره چنین موضوعاتی حرف بزند ولی این نمی دانست چگونه انسانی را بدل به باد کند با وجود اینکه به رمز و راز بسیاری از پدیده ها داشت و اسرار بسیاری از عینیات را می شناخت با وجود اینکه قادر بود ها را بسازد جنگلها را خراب کند آسمان را برای ملبانان تاریک نماید و با آهنگها و صداهای مختلف از شهرها بگذرد و با قدرت وسیع و نامحدودی که در خود می شناخت اینک جوانی را می دید که به او می گفت باد می تواند به نیروهای ناشناخته خود واقف شود و کارهای دیگری هم انجام دهد جوان وقتی دید که خاستش در نهاد باد آشوبی به پاساخته است و او را در لحظه تصمیم گیری گذاشته است گفت به آن عشق هم میگویند و آنچنان نیرویی است که اگر بخواهیم میتوانیم با به یاری گرفتنش از پدیده به آفریده دیگری بدل شویم وقتی که کسی یا چیزی را دوست داریم نیازی به درک الالان نداریم چون همه عینیات در درون خود انسان شکل میگیرد و به معنویات میرسد و بدین شکل است که انسان میتواند بدل به باد شود واضح هست که باد هم باید بخواهد و کمکش کند باد بی مغرور بود آنچه جوان می گفت سبب خشمش شد نفیری کشید و ماسه های را را به کرد و با شدت بیشتر شروع کرد به وزیدن فهمیده بود هنوز از بسیاری نیروهای خود آگاه نیست حتی با وجود عبور از تمامی سطح دنیا قادر نیست انسانی را به باد تبدیل کند و مهمتر که هنوز عشق را نمیشناسد. باد عصبانی از عدم شناخت نیروهای نامحدودش گفت در عبور از گوشه و کنار جهان بسیاری از مردم را دیدم که به آسمان نگاه میکنند و از عشق سخن میگویند. شاید درخواست کمکی از آن بالا داشته باشند و خورشید را نشان داد جوان بار دیگر تقاضا کرد پس کمکم کن این منطقه را پر از گرد و قبار و آسمان را آنچنان تاریک کن که بتوانم به خورشید خیره شوم بدون آن که کور شوم بعد با شدت هرچه تمام تر شروع به وزیدن کرد گرد و قبار همه جا را گرفت ماسه ها آسمان را آنچنان تاریک کردند که خورشید همچون گویی طلایی دیده می شد در اردوگاه تشخیص اینکه افراد و اشیاء کجا قرار دارند مشکل میشد مردان صحرا این باد را که سیمون نامیده میشد و از طوفان های دریا هم بدتر و سختتر بود به خوبی می شناختند اسبان شیه میکشیدند و اسلحه ها در زیر شن و ماسه مدفون میشدند روی صخره یکی از فرماندهان رو کرد به فرمانده کل و گفت شاید بهتر بود آنجا می مندیم. حالا دیگر جوان به زحمت دیده می شد چهره ها کاملا با دستارهایی به رنگ آبی پوشیده شده بودند و از نگاه ها فقط ترس می بارید. یکی دیگر از فرمانده اصرار کرد به این ماجرا خاتمه بدهیم فرمانده کل با صدایی که آمیخته با احترام بود گفت میخواهم عظمت و بزرگی الله را به چشم ببینم میخواهم چگونگی تبدیل یک مرد به باد را ناظر باشم در همان حال سعی کرد اسم این دو فرمانده ترسو را در خاطر داشته باشد تا بعد از فروکشی باد آنها را از فرماندهی خل نماید مردان صحرا که نباید ترسو باشند جوان خورشید را مخاطب قرار داد و گفت بعد به من گفته است که تو عشق را می شناسی. اگر چنین است حتما جان جهان را هم که به وجود آورنده عشق است می شناسی جواب داد از جایی که هستم میتوانم جان جهان را ببینم او با روح من در ارتباط است و ما به اتفاق سبب رویش گیاهان میشویم. و میش را که به دنبال سایه و پناهگاه هستند هدایت میکنیم. از آن جایی که هستم که بینهایت از زمین دور است دوست داشتن را یاد گرفتم و میدانم اگر کمی بیشتر به زمین نزدیک شوم. همه آنچه در رویان است از بین خواهند رفت. ولی جان جهان کماکان باقی می ماند. بنابراین ما از دو نقطه مقابل همدیگر را میبییم. و قدر یکدیگر را می دانیم و همدیگر را دوست داریم من به او گرما و زندگی می بخشم و او به من علت زندگی را جوان تکرار کرد تو عشق را می شناسی؟ من جان جهان را می شناسم با هم در سفر در این عالم بی انتها فراوان بحث و جدل داشتیم به من گفت بزرگترین مشکلی کتاب امروز داشت این است که فقط پدیده های معدنی و گیاهی توانستند بفهمند هیچ نیست مگر پدید آورنده یک تا. با این اصل دلیلی دیده نمی شود که آهن شبیه مث باشد و مس همانند طلا. هر رویدادی در جای خود در جوهر هستی ظاهر می شود و نقش خود را به آخر می برد. و مجموعه حرکت هماهنگ این رویدادها می توانست سمفونی صلح و آرامش باشد اگر دستی که همه چیزها را نوشته در همین لحظه متوقف میشد لحظه ای که پنج روز اول آفرینش بود. ولی ششمین روز آفرینش هم وجود داشت. جوان گفت: «تو عالمی همه چیز را از راه دور میبینی ولی عشق را نمی شناسی اگر ششمین روز آفرینش نبود آدم وجود نداشت آبی از آسیاب نمی‌افتاد. مص همیشه مص بود و صرب هم صرب و در نتیجه هر پدیده ای فقط با حدیث خیش بود و با آن زندگی میکرد درست است که هر کس یا هر چیز با حدیث خیش است ولی باید دانسته شود که حدیث خیش هم پدیده است که روزی به پایان خود میرسد و در آن روز لازم است که آن کس یا آن چیز بدل به کس یا چیز والاتری شود در این صورت دیده می شود که شکل جدیدی از حدیث خیش که پاک است و منزه در صفحه روزگار نقش میگیرد و به جان جهان میرسد و آن هم به نوبه که وارسته است و والا نیکست و پرهیزکار به سوی پدیدابرنده یکتا داشته تا به او برسد، در او بیامیزد و با او یکی شود خورشید میاندیشید و درخشش خود را بیشتر میکرد بعد که از این گفتگو خوشش آمده بود نفیری کشید و وزش خود را بیشتر کرد تا خورشید بیرنگ تر شود و چشمان جوان را کور نکند جوان ادامه داد در توجیه این موضوع لازم است گفته شود که علمیست به نام کیمیاگری که میگوید هر مردی به دنبال گنج خیش است گنجی که در خود او نهفته است برای به دست آوردنش او خود را ناگزیر از بهتر شدن و تغییر می‌بیند به تسکیه درون خود می‌پردازد تا به مرحله والاتر جایگاه گنج برسد بنابراین مرحله را به انجام میبرد و مرحله دیگر را آغاز می کند. صرب هم همینطور تا وقتی صرب باقی می ماند که در عالم نقش داشته باشد وگرنه بدل به طلا می شود. یک کیمی موفق می شود این انتقال را انجام دهد یا این تلاش را تکمین کند و به تغییر و تبدیل برسد. به ما یاد می دهد چگونه باید تسکیه یافت و خالص شد؟ به والایی رسید، یعنی صعود از مرحهای به مرحهای دیگر در این انتقال است که خود شخص تغییر می کند و کامل می شود و آن آنچه در پیرامون است نیز در پی آن تغییر می کند و کامل می شود؟ خورشید پرسید: چرا می گویی که من عشق را نمی شناسم؟ چرا که عشق طاقت ندارد همانند صحرا باشد و ساکن؟ مثل باد باد باشد و گذرا و نه همانند تو ناظر از راه دور باشد و آبر عشق نیرویی است که جان جهان را تعبیر می‌دهد و مفهومی است که جان جهان را تعبیر می‌کند. وقتی که من برای اولین بار عشق را شناختم، تصور داشتم که آن خود به تنهایی کامل است، ولی دریافتم که انعکاس و برگردانی است. از همه آنچه آفریده شده است پس آن را پدیده دیدم با شوریدگی ها شیفتگی ها نگران ها استراپ ها کوشش ها و کشش هایش. این ما هستیم که جان جهان را با اعمال خود تقضیه میکنیم و زمین که در روی آن زندگی میکنیم میتواند بهتر یا بدتر شود اگر ما بهتر یا بدتر شویم و همینجاست جاست که حضور عشق را می بینیم چون وقتی که آشق هستیم برای عشق خود ما یلیم که بهتر شبیم و به کمال برسیم خورشید پرسید از من چه توقعی داری؟ جوان پاسخ داد کمکم کن مرا به باد بدل کن خورشید گفت طبیعت مرا همچون بزرگترین اندیشمند جهان خلقت میشناسد. اما من نمیدانم چگونه تو را بدل وباد کنم. پس به چه کسی پناه برم؟ خورشید چند لحظه خاموش شد ولی باد همه گفتگوها را شنید و ضعف خورشید را هم درک کرد و در چهار گوشه جهان فریاد زد که دانش خورشید هم محدود است و نمیتواند از چنگ جوانی که به بیان بدون کلام جهان آشناست فرار کند. خورشید گفت به دستی مراجع کن که همه چیز را دید و نوشت. بعد، متعجب از گفته حکیمانه خورشید فریادی از شعف برآورد و با چنان قدرتی وزید که خود نیز هیچگاه به یاد نداشت. چادرهای برپا شده در صحرا به زودی کنده می شدند و حیوانات نیز سعی داشتند خود را از بند رها کنند و روی سخره مردان خود را به هم پیوسته بودند تا باد یکی اکی آنها را نبرد. پس جوان رو به سوی دستی آورد که همه چیز را نوشته بود. پیش از بیان حتی ای حس کرد کائنات در سکوتی سنگین و جرف فرو رفتند. پس اونیز ساکت ماند جلوه یک عشق در قلبش جرقه زد و او به عبادت نشست. عبادتی متفاوت از همیشه، عبادتی بدون کلام که در آن هیچ خواهشی نداشت و حتی، حتی سپاس هم به جای نیاورد. از مراتهی که در اختیارش گذاشته بود تا گوسفندهایش را در آن تغذیه کند و حتی، حتی شکر گذار نبود از اینکه فروش ظروف کریستال بیشتر شده بود یا تمنایی نبود برای زنی که دوستش داشته و همکنون در انتظارش بود. در شیفتگی سکوت دریافت که صحرا، باد و خورشید هم در جستجوی نشانه هایی هستند که آن دست دیده و نوشته و در روی زمین و فضا پراکنده بودن. میخواستند راه خود را بشناسند و اسرار آنچرا که روی لوح زمر رو شده بود بدانند. چون علت وجودی خود را نمیشناختند و نمیتوانستند به راز آفرینش برسند. حتی هیچ دلیل واضحی برای اثبات موجودیت و هستی آفریده ها نمیدیدند و نمیدانستند چرا آفریده شدند چرا هستند و به کجا خواهند رفت. اما آن دست فقط آن دست دلیل قانع کننده خود را داشت دستی که فاعل بود و قادر و می توانست معجزه کند از اقیانوس صحرا بسازد و از انسان هم باد جوان دریافت قدرت لا در کائنات است که شش روز پیدایش را بدل به آفرینش کرد پس در جان جهان غرق شد و دید که جان جهان است از پدید یکتا و پدید یکتا را در وجود خود یافت و خود را نمادی از او دید باد سیمون با شدت و خشونت انچنان به هر طرف تاخت که خود هرگز به یاد نداشت در طول نسل عرب افسانه جوانی را نقل می‌کنند که باد شده بود تا اردوگاهی را محو کند و نیروی غیرقابل انکار الله را به بزرگترین فرمانده جنگی صحرا نشان دهد. وقتی سیمون آرام گرفت همه نگاه‌ها رو به جهتی داشت که جوان رفته بود. ولی جوان آنجا نبود. او در کنار نگهبانی دیده شد که سوی دیگر اردوگاه نگهبانی میداد و در آن لحظه تقریبا همه پیکرش در زیر ماسه ها پنهان بود. مردان از جادوگر وحشت داشتند، فقط دو مرد در آن لحظه می خندیدند. کیمیاگر که صحابه واقعی خود را پیدا کرده بود و فرمانده کل که عظمت و شکوه الله را یک بار دیگر به وسیله این صحابه به چشم دیده بود. فردای آن روز فرمانده کل دعای خیر خود را بدرقی جوان و کیمیا گر کرد و همراهانی فراهم آورد تا آنها را به آنجا که دل خواهشان بود برسانند. ام روز در راه بودند طرفهای غروب بود که به یک صومعهٔ قبتی رسیدند كیمیاگر همراهان را بازپس فرستاد و از اسب به زیر آمد و گفت از اینجا تنها خواهی بود تا اهرام فقط سه ساعت راه است جوان گفت متشکرم، تو به من بیان جهان را آموختی فقط توانستم آنچه را که میدانستی به یادت آورم. کار دیگری نکردم. کیمیاگر آویزه در سومه را گرفت و چند بار به آن کوفت. کشیشی سیاه جامع در را باز کرد. آن دو نفر مدتی به زبان قبطی با هم حرف زدند و پس از آن کیمیاگر از جوان خواست داخل سومه شود و گفت از او خواستم اجاقش را چند وقتی در اختیارم بگذارد و به سمت آشپسخانه به براه افتادند کیمیاگر آتشی روشن کرد و کشیش هم مقداری سرب آورد سرب را در یک قالب چودنی ریختند و روی آتش گذاشتند تا زوب شود وقتی سرب کاملا زوب شد، کیمیاگر از کیف خود، همان جسم عجیب زرد رنگی را که همراه داشت بیرون آورد. مقداری از آن را جدا کرد و مفتولی به نازکی تار مویی ساخت و به موم آغشت و در داخل ظرفی که مایع سرب در آن بود انداخت. ترکیب به دست آمده رفته رفته به سرخی زد و سرانجام کاملا قرمز شد. کیمیاگر قالب را رو از روی آتش برداشت و کناری گذاشت تا خنک شود. در این فاصله با کشیش از جنگی که بین اشایر در صحرا میگذشت حرف زد و به او گفت جنگی است که ادامه خواهد داشت. و او مخالف بود. میدید که کاروان ها به خاطر جنگ در جیزه متوقف‌اند. رو به کیمیاگر کرد و گفت شاید خواست خدا باشد. کیمیاگر جواب داد، چنین است. وقتی ترکیب به دست آمده کاملا سرد شد، کشیش و جوان از دیدن زیبایی داخل قالب حیرت کردند. می دیدند فلزی که در داخل قالب سرد شده است، فلزی نیست که کشیش آورده بود. فلز دیگر سرب نبود، لا بود طلا جوان پرسید آیا روزی میرسد که بتواند با این مهارت چنین کاری بکند کیمیاگر جواب داد این حدیث من است حدیث تو نیست با این کار خواستم به تو بگویم و به تو نشان بدهم که ممکن است به اتفاق به سمت راهروی خروجی صومعه رفتند کیمیاگر گوی طلا را به چهار قسمت تقسیم کرد در حالی که یکی از چهار قسمت را به سوی کشیش گرفته بود به او گفت این سهم توست به خاطر محبتی که نسبت به زائران و آبدان داری کشیش به او گفت این پاداش بالاتر از خدمت ناچیز من نسبت به زائران است و این اوست که چنین نیرویی به من ارزانی داشت به اوست که باید سپاس گذاشت آنچه گفتی حقیقت است ولی زندگی قادر است سخنانت را بشنود و آنگاه ممکن است سهم تو به قدر قناعت کم شود سپس به جوان نزدیک شد و گفت این هم برای توست به جای سکه هایی که به فرمانده جنگ جویان سهرا دادیم جوان در صدد بود به کیمیاگر بگوید آنچه به او داده فراتر از سکه هایی است که به فرمانده دادند ولی مفهوم جواب کیمیاگر به کشیش را گرفته بود و میدانست که چه گفت بنابراین این بهتر دید چیزی نگوید و خاموش باشد سومین نصیب را هم کیمیاگر به دست گرفت و گفت این هم قسمت من است او دیگر بار از صحرا برگردم صحرا هنوز هم در جنگ است هیچ معلوم نیست چه در پیش است فقط الله میداند شاید این قسمت هم نصیب دیگران شود و چهارم این قسمت رو هم به کشیش داد و گفت این قسمت هم به جوانی که در اینجاست تعلق دارد به امانت به تو سپردم تا اگر روزی به آن نیاز داشت، به او بدهیم. و جوان گفت، من گنجم را به دست می آورم و اینک از آن دور نیستم. کیمی پاسخ داد؟ اطمئنم که آن را به دست خواهی آورد. پس این تکه اضافی برای چیست؟ برای اینکه تا کنون دوبار پولی را که در طی سفر با مرارت و گذشت به دست آورده بودی از دست دادی یک بار دوزدی آن را با خود برد و بار دیگر فرمانده جنگی در صحرا. و من یک مرد پیر عرب خرافاتی هستم و تمثیل های سرزمین خود را باور می کنم یکی از آنها این است که آنچه یک بار اتفاق افتاد ممکن است هرگز دیگر اتفاق نیفتد، ولی اگر دومین بار تکرار شد باید برای بار سوم هم منتظرش بود و بر اسبان خود سوار شدند کیمیاگر گفت مایلم داستانی از خواب برای تعریف کنم جوان اسبش را نزدیک تر کرد و او گفت در زمانهای دور در روم قدیم در زمان امپراتوری تیبر پیرمردی زندگی میکرد آزاده و نیکسرشت. دو پسر داشت. یکی سپاهی شد و معمور خدمت در دورترین نقطه امپراتوری و دیگری شاعر شد و روم را بازی با ایهای کلامش تسخیر کرد. شبی خوابید و خواب دید فرشتهی به او نزدیک شد و گفت کلام یکی از پسران تو در دنیا به اوج میرسد و ورد زبانها میشود. و برای همیشه باقی می ماند. پیرمرد از خواب پرید، صورتش از شادی پر اشک شده بود. چون میدید زندگی چهره با محبت خود را به او نشان می دهد و او را از آنچه لازمه غرور یک پدر است لبریز می کند. دیری نپائایید که پیرمرد در راه نجات کودکی که چرخ عرابه ای او را زیر گرفته بود، جان خود را از دست داد، و از آنجا که در طول زندگی درست بود و با شرف، به کسی بدین نکرده بود و بد کسی را هم نخواسته بود، مستقیما به آسمان ها رفت. در آنجا، فرشته ای را که در خواب دیده بود، بار دیگر دید. فرشته به او گفت، تو انسان خوبی بودیم، با عشق زندگی کردی و مرگت هم با گذشت و ایثار همراه بود. امروز می توانم تو را به آرزوهایت برسانم. پیرمرد جواب داد. زندگی همیشه روی خوش خود را نشانم داد. و انگامی که تو به خوابم آمدی دریافتم همه مسایی من در زندگی به حق به نتیجه مطلوب رسید. چون اشعار پسرم قرنها و قرنها در حافظه مردم باقی خواهد ماند. من آرزویی برای خود ندارم. با وجود این هر پدری از شهرت کسی که در دامن خود بزرگش کرده خوشحال می شود و مقرور قرزو دارم که در آینده دور باشم تا آن کلامی را که جاودان شده است بشناسم فرشته دست بر شانه پیرمرد گذاشته و به اتفاق از بعد زمان گذشتند و به آینده دور رسیدند در مقابل آنها میدان بزرگی دیده میشد شد که مردم در آن به هر طرف در آمد شد بودند و با زبانی نا سخن می گفتند. چهره پیرمرد از شادی قرق عشق شد و به فرشته گفت می دانستم که اشعار پسرم زیبا و دلنشین و جاودانیند. میل دارم به من بگویی کدام یک از اینها مشغول خواندن قزلی از زرودهای پسرم است. فرشته با مهربانی بسیار به او نزدیک شد و با هم روی یکی از نیمکت های آن میدان گسترده نشستند و فرشته با متانت خاصی شروع کرد به حرف زدن. اشعار و سروده های پسر شاعرت در رم بسیار محبوب و شناخته شده بودند و همه مردم از خواندنشان لذت می بردند. ولی زمانی که حکومت تیبر پایان گرفت، آن سروده زیبا هم به فراموشی سپرده شدند. ولی گفتاری که ماندنی شد، گفته های پسر دیگرت است، پسری که نظامی بود و سرباز. پیرمرد با تعجب نگاه کرد و فرشته ادامه داد. پسرت نظامی شد و مأمور خدمت در دورترین سرزمین امپراتوریم، در آنجا افسر شد و رئیس یک گروه پیاده نظام، خدمه سخت مریض شد و کسی را توان معالجه او نبود. پسر تو یک خواخام را می شناخت که بیماران را شفا میداد. برای پیدا کردن او به هر سو رفت تا به مردی رسید که به وسیله آن شخص معالجه شده بود. آن مرد به پسر تو گفت: کسی که در جستجویش و هستی مسیح نام دارد. و خود را پسر خدا میخواند. از آن پس پسر تو گوش به کلامش داد و دل به تعلیمش بست و با همه وجود خود به اعتقادات او روی آورد. مؤمن و پرهیز کار شد تا اینکه در یک صبح سال و صادق نزد خاخام رفت و برایش ماجرای بیماری یکی از خدمه هایش را گفت. خاخام با گشاد رویی اعلام کرد آماده است او را تا خانه همراهی کند. پسر تو از این بزرگ منشی خاخام یک که خورد و بر چهره و قامت او نظر افکند. از جرفای نگاه او دریافت به راستی در مقابل پسر خدا ایستاده است و دیده بود مردمی را که در آن حوالی به هنگام عبور او به احترامش از جای خود برمیخیزند فرشته به پیر پیرمرد گفت اینها هستند گفتههای پسرت گفتاری که در آن لحظه به خاخام گفته بود یا حضرت، خانه من لایق نیست در آن پانهی بیمار من فقط با دم مسیحاییت شفا می کیمیاگر به اسبش حیزد که تون برود و ادامه داد مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد. ولی هر شخصی در روی زمین نقش امدهی در ساخت تاریخ دنیایی دارد که معمولا خود از آن بی است جوان خندید هرگز تصور نمیکرد زندگی یک چوبان این همه با اهمیت باشد کیمی آگر گفت خدا نگهدارت باشد پاسخ شنید خدا تو باشد حدود دو ساعت و نیم در صحرا پیش رفت. در تمام مدت سعی می‌کرد گوش به گفته‌های قلبش داشته باشد. چون از این پس او بود که می توانست مکان گنج را نشان دهد. کیمیاگر گفته بود، قلبت آنجاییست است که گنج توست.» جوان می‌دید که قلبش ساز دیگر می‌زند. از گنج حرف نمیزند، قصه دیگر میگوید قصه پرهادسه جوان چوبانی را که گوسفندهایش را ترد کرده تا پی خوابی باشد که دوبار دیده بود یا از حدیث خیش میگوید حدیث همه مردانی که در پی گنج به سرزمین‌های ناشناخته و دور رفته بودند مردانی که با سرسختی و تحمل بسیار سعی میکردند تا با حدیث خیش باشند و با آن زندگی کنند مردانی با ایده ها و اندیشه‌های متفاوت یا در طول مسیر از کشفیات حرف می‌زد و از کتاب‌ها یا از اتفاقات و التهابات قصه میساخت. در حالی که از یک تپه شنی بالا می‌رفت ناگهان نجوای قلبش را شنید مواظب باش اینجا همان جایی است که گریه خواهی کرد. همان جایی که من خودم را پیدا میکنم و همان جایی است که تو هم به گنجت میرسی. آرام آرام شروع کرد به بالا رفتن از تپه شنی. آسمان پر ستاره دیگر بار محتابی شد و او یک ماه تمام در زیر آسمان صحرا راه رفته بود و شرم ستاره را در مقابل بیشرمی ماه می‌شناخت. میدانست که هر وقت ماه در سینه آسمان خود نمایی میکند، جایی برای سو سوزیدن ستاره‌ها نمیماند ماه تپه شنی را روشن کرد و سایهی هم از تپه بر روی سطح گسترده صحرا بر جای نهاد. صحرایی که خود دریا بود، دریایی مواج با امواج نغرفام که زیر انوار ماه تا بی میدرخشید. محتاب خاطره ای از خاطره های جوان را نیز در ذهنش روشن کرد و به خاطرش آورد. محتاب شبیه را که افسار اسبش را رها کرده بود تا زندگی را بجوید و نشانه را که کیمیاگر منتظرش بود نشانش دهد و بالاخره محتاب سکوت صحرا را در خود قوصل می‌داد و مردی را هم که در جستجوی گنج خود بود چند لحظه‌ای گذشت به بالای تپه رسید در آنجا زربان قلبش را می‌شنود پرواز قلب را در قفس سینه می‌دید می‌دید درخشش صحرای سفید را که زیر انوار ماه نگاه را گمراه می‌کند و آنگاه اهرام را میدید، اهرام پر و و با عظمت مصر را. به زانون نشست و گریه کرد. سپاس گفت خدایی را که به او امکان داد تا حدیث خیش را باور کند. که به او مجال داد تا روزی از روزها پادشاه را ملاقات کند و فروشنده را و مرد انگلیسی را و کیمیاگر را و بالاتر از همه که به او آنچنان اقبالی داد تا با یک زن صحرا آشنا شود تا دریابد عشق هرگز مانعی نیست که مرد در پی حدیث خیش نباشد قرنها اهرام از قدمت و قامت خود خوشنود بودند و فاخر و مردی در پایشان در مقابل عظمت بی همتای آنان از بخت خود مسرور بود و شاکر اکنون اگر می‌خواست توانست به آبادی برگردد با فاطمه ازدواج کند و مثل یک چوپان ساده زندگی کند همچون کیمیاگر که در صحرا زندگی می‌کند که بیان جهان را می‌شناسد که میتواند سرب را به طلا بدل کند و اسرار دانش خود را هم به کسی نیاموزد. او هم میتواند در صحرا زندگی کند چون او که به راه حدیث خیش رفت که بسیاری از چیزهای ضروری را آموخت که پادشاه را دید که با کیمیاگر آشنا شد و با همه ی آنچه که آرزو می کرد، زندگی کند زندگی کرد و حال می تواند, می تواند با فاطمه ازدواج کند می تواند مثل یک چوپان ساده در کنار صحرا در آبادی که پنجاه هزار نخل دارد و سیصد ست حلق چاه زندگی کند اما او به گنج خود رسیده بود و یک اثر کامل نمی مگر اینکه مراد از آن حاصل شود. آنجا در بالای تپه او گریه کرده بود. در جایی که عشقهایش ریخته شده بودند، مارمولکی را دید که به هر طرف می و گاه آرام گاه تند می دوید. در مدتی که در صحرا گذرانده بود، شنیده بود که در مصر مارمولک را نشانی از خدا میدانند نشانی از زندگی مطفون در قرون و اعثار مارمولک یک نشانه بود بنابر این جوان شروع کرد به کندن محدوده‌ای که مارمولک در آن جولان میداد زمین را میکند و میکند در حالی که به فروشنده یک کریستال فیک میکرد که میگفت اگر در طول زندگی به اندازه توان خود سنگ جمع کنی باز هم نخواهی توانست در باغچت هرمی بسازیم. سراسر شب نقطه مشخصی از زمین را کند ولی هیچ نیافت. کند و کند. لحظه‌ای نیاسود و کارش را متوقف نکرد. بابات هم از اینکه گودال کند شده را پر میکرد در ستیز بود. دستانش خسته بودند و اندکی بعد هم زخمی شدند، ولی زمین را میکند و به ندای قلب خود اعتماد داشت. چون قلبش گفته بود، آنجایی را حفر کن که قطرات اشکت می ریزد. در حالی که سعی میکرد چند سنگی را که مانع بودند جمع کند، ناگهان صدای پایی شنید. مردانی را دید که به او نزدیک میشوند و نور ماه چنان بر آنان میتابید که صورتشان تاریک شده بود و چشمانشان دیده نمیشد یک نفر از تازه رسیده ها پرسید چه می کنی؟ جواب نداد ولی ترس در جانش لانه کرده بود به خود گفت چرا ترس حالا که روی گنج خود ایستاده هم و چندی دیگر از دل خاک بیرونش میآورم چرا باید بترسم؟ دیگری گفت، ما فراریان جنگی هستیم، می بدانیم چه چیزی در آنجا پنهان می ما به پول احتیاج داریم. جوان جواب داد، چیزی را پنهان نمی کنم. ولی یکی از مردان دست او را گرفت و با خشونت از گودال بیرون کشید. دیگری شروع کرد به بازرسی بدنی او. و بالاخره تکه طلایی را که در یکی از جیبهایش بود پیدا کردند. یکی از مهاجمان گفت: او طلا دارد. مهتاب صورت کسی را که در حال بررسی جوان بود روشن کرد. در چشمان او خشونت موج می‌زد و از نگاه او مرگ می‌بارید. دیگری گفت: او طلا پنهان کرده، باز هم باید داشته باشد. و مجبورش کردند به کندن زمین ادامه دهد. چیزی پیدا نمیشد. آنها شروع کردند به زدن و آزار او. تمام شب کتکش زدند و این کار را آنقدر ادامه دادند تا نخستین موج روشنایی در افق ظاهر شد. لباسهایش پاره شدند و او چهره مرگ را از نزدیک می دید. در آن حال و هوا، گفته یک به یادش آمد که وقتی که باید بمیری پول به چه کار آیدد و به ندرت پول جان کسی را نجات می بالاخره جوان گفت در جستجوی یک گنج هستم. با وجود زخمی که بردهان داشت و صورت باد کرده از ضربات مشت مهاجمان ادامه داد گنجی را در خواب دیدم که نزدیک اهرام است مردی که به نظر می رئیس مهاجمان است مدتی خاموش ماند و سپس به یکی از زیر دست های خود گفت باگذارین برود چیز دیگری ندارد این طلا آن را هم شاید دزدیده باشد جوان با صورت روی زمین افتاد چشمان رئیس گروه در جستجوی نگاه جوان بود و نگاه او به سوی احرام رئیس به همراهانش گفت از اینجا برویم و سپس برگشت رو کرد به جوان و گفت تو نخواهی مرد زنده میمانی یاد بگیر انسان اجازه ندارد این همه ابله باشد در همین جایی که هستی دقیقاً دو سال پیش من خوابی دیدم که تکرار هم شد خواب دیدم که باید به اسپانیا بروم و در دشتهای آن به جستجوی کلیسای مخروبه و متروکی باشم که از نمازخانه آن درخت چنار پرشاخ و برگی سر به آسمان دارد و محل آمد و رفت چوپانان است. زیر آن درخت چنار به گنج خود می رسیدم. اما من آدم ابلهی نیستم که برای رفتن به آنجا بخواهم از صحرا بگذرم. آن هم فقط برای خوابی که دیدم یا خوابی که تکرار شد و رفتند. جوان بلند شد بدون اینکه دردی داشته باشد یک بار دیگر بهرام نگاه کرد اهرام به او خندیدند و او هم به اهرام خندید و قلب او مالمال از شادی شد او گنج خود را پیدا کرده بود بفتار. اسمش سانتیاگو بود شبانگاه به کلیسای کوچک خراب و ای رسید که درخت چناری در نمازخانه خانه مخروبه آن هر روز بیشتر از پیش رشد می کرد ستاره ها هنوز از لای شاخ و برگ آن و سقف نیم ریخته نمازخانه دیده می شدند به آورد روزی را که با میشهایش به آنجا رسیده بود تا شب را به صبح آورد. شب سختی بود و در سفید دمان خوابی تکرار شده بود. خوابی که نوید سفر میداد. سفر به صحرا، اهرام و گنج. اکنون او آنجاست بی و گوسفند فقط بیلی با خود داشت. مدت به تماشای آسمان پر ستاره ایزداد. سپس از خرجینش شیشه شرابی بیرون آورد و از آن نوشید. به یاد صحرا افتاد. را که با کیمیاگر ستاره ها را میشمردند و شراب می نوشیدند. به یاد راه پر مخاطری افتاد که شب و روز میپیمودند و به یاد آن لحظه افتاد. لحظه ای که مهاجمان چه قافل راه گنج را نشانش دادند اندیشید اگر خواب و آن را باور نداشتم کولی را نمیدیدم و پادشاه یا دوزد را و و به خود گفت درست است که این تومار سر درازی دارد ولی نباید فراموش کرد که همه راه از پیش علامت گذاری شده مشخص و معلوم بود و اگر چونان نبود به یقین به اشتباه میافتادم و به خطا می‌رفتم. بی خیال و با آرامش کامل خوابید. وقتی بیدار شد که خورشید در اوج آسمان بود. بیل به دست گرفت، به پای درخت چنار رسید و شروع کرد بکندن در فکر بود و با خود گفتگو داشت. ای جادوگر پیر تو از همه چیز مطلع بودی. حتی میدانستی که باید تکی طلا برای برگشت من به اینجا بگذاری. و تو ای کشیش با دیدن حیعت به هم ریخدم یا لباس پاره پارم چقدر خندیدی و تو تو ای جادوگر پیر نمی توانستی از آنچه باید بر سرم بریزد حشیارم کنی؟ صدای باد را شنید. نه. اگر به تو گفته بودم هرگز موفق نمی شدی اهرام را ببینی. خیلی با عظمت و زیبا هستند. مگر نه؟ صدا صدای کیمیاگر بود. خندید و به کندن پای درخت چنار مشغول شد. نیم ساعتی گذشت. بیل به جسم سختی رسید. یک ساعت بعد صندوقی در مقابلش بود، مملو و سکه های قدیم اسپانیا سنگ های ها و ماسک های با پرهای سفید و سرخ غنیمتی از یک فتح که فاتحان برای آیندگان بر جای نهاده بودند و سالها و سالها به فراموشی سپرده شده بود از خرجینش اوریم و را بیرون آورد از آنها تنها یک بار کمک گرفته بود در یک میدان در یک صبح راه زندگیش همیشه پر از نشانه بود آنها را در جعبه ای از طلا گذاشت و با خود گفت آنها هم قسمتی از گنج هستند به یاد آورد پادشاه پیر را وندی شید که اگر او را نمی‌دیدم. و زیر لب زمزمه کرد باید به تاریفا بروم و یک دهم آنچه آنچرا که پیدا کردم به پیرزن کولی بدهم کولی ها چقدر آینده نگرند باد شروع به وزیدن کرد باد لوان بود باد خاوری بادی بود که از آفریقا می آمد نه بوی صحرا داشت و نه درد حمله مغربیان در عوض با خود تعم و بوی دیگری داشت بوی آشنا و تعم بوسه‌ای به نرمی مخمل که به آرامی پیش می‌آمد تا با نسیم به صورتش بوزد و بر لبانش بنشیند او خندید اولین بار بود که او را میبوسید در حالی که چشمانش از شادی دریای عشق گفت: فاطمه این منم که به سوی تو میآیم.